متن کتاب به یکباره چشمانم را در جهانی باز کردم که از آن هیچ نمی دانم. شاید گفتن این کلام بدون تعمق بران ای دور از انصاف باشد شاید برای مدت طویلی در این جهان زنده بودم و شاید حال پس از مدت مدیدی است که دوباره به دیدار این جهان و جهانیان آمده ام و شاید برای چنین فریزه ای. برای دیدن به جهان پای گذاشتم نمی توانم افکارم را ساماندهم دهم و همه چیز را درست در سر جای خود بگذارم شاید دلیل اصلیش شناخت کم از خیشتنم باشد هرچه که هست نمی توانم به درستی درک کنم که چرا و چگونه پای بر این جهان هستی گذاشتم باز دنیایی از چراها در میان افکارم پرسه میزند. معنای این باز در جمله‌ام چه بوده است چرا با تاکید اعلام داشتم که باز به جهان آمدم شاید این هم یکی از همان شرایطی است که مرا بیشتر به آن سوق می دهد که این بار نخستینی نیست که در این جهان هستم و شاید این قدرت تلقین آنقدر در تار و پودم تنیده شده است که اینگونه فکر می‌کنم هر چه که هست باید بیشتر از این با خود کلنجار بروم شاید با چنین هایی زاده شده‌اند حال که برای اندک زمانی است حواسم را به سر جای آورده‌ام نمیتوانم به درستی تعریف مشخصی از جهان پیرامون خود بدهم چقدر ماندن در میان این افکار جان فرسا و دنباله‌دار است در پی اولین سؤال باز دریایی از ها به اشکال مختلفی بر ذهنم تداعی شود و دلبستم به این افکار میتواند. جهان را در آن غرق کند شاید باید بیشتر از این دنیای درونی فاصله بگیرم و شاید باید به کمی دورتر سرک بکشم شاید نیاز است برای شناخت بهتر دیگران را بشناسم صدایی مهیب مرا به خیشتنم فرا خاند. چه چیز باعث شد تا دوباره سر بر این جهان برآورم شاید صداهای دنبال داری مرا به خیشتنم فرا خاند. وای که باز این چراهای بیشمار مرا احاته کردند باید کمی از این دنیای درونیم فاصله بگیرم شاید با پیش رفتن بتوانم از جهان خیشتنم چیزهای بیشتری فراگیرم شاید این دید و شنیده ها دنیای مرا نقش دادند و مرا به خیشتنم رسندند از کمی بالاتر و با فاصلهی دورتر به زمین نگاه میکنم هوا است. است. اما در فضایی دورتر از جایی که من قرار دارم و در تیر رس دید من نورهای فراخ و چشم نوازی می کنند این نورهای متراکم مرا به خود فرا می خانند. این نورها در کنار هم به نوری یک بار چه بدل می شوند که به شدت اقواگر است باید خیشتن را به سوی این نور متراکم بر جهان پیرامونم برسانم شاید پاسخ تمام چیستی های دنیای من در همین نور خلاصه باشد آری بدینگونه است باز ذهنم در حال تراوش افکار بسیاری است حال این افکار دوباره به من میفهمانند که جستن هر چرایی در جهان در دل نور خلاصه شده است پس باید خود را به منشأ این نورها برسانم و پاسخ پرسش هایم را از میان همان که پرسش آفری دریابم تعقیب این نور دنبال دار مرا به صحنی برده است صحنی زیبا و با وای که چه دنیای عظیمی است وای که چه رنگ و رونق سرشاری به خود دارد ساختمان های سر به آسمان کشیده که دل کبود را در نوردیده و به پیشگاه ابرها رسیده است نور متراکم این دنیا که مرا به خود فراخواند از دل این شهر آمده بود شهری زیبا و بزرگ مغازه های بیشماری سطح این شهر را فرو خوردند آنقدر نورانی و جذاب هستند که هر آبری را شیفته خود کنند نگاهم را به یکی که آنان می وای که چقدر زیباست؟ ویترین های برازنده با اشکال مختلف و گوناگون با نور بسیار که هر بیننده ای را در حسرت خیش اسیر خواهد ساخت فراتر از این مغازه ها و کمی بالاتر از آنها تابلوهای بزرگی در دل این شهر خود نمایی می کنند تمثیل چهره های بسیاری برانه است که هر کدام گونه ای از احساس را به دل زنده خواهد کرد از زنهای زیبا و خوش رو تا مردان آراسته و جذاب از اجسامی که هر کاری را به سهل به پیش خواهند برد تا اشیایی که برای رفاه با هم به ستیز برآمدهاند. همه نور می‌پرورانند و آسمان و ماه هم در سکون به نور پرفروغ آنان دل بسته است. آنان باید که نور افشانی کنند و دلهای بیشماری را به دست آورند آنان آمده اند تا اغوا کنند و حال فرصت در اختیارشان است حال گوی و میدان را به دستان آنان سپردند تا هرچه چه میخواهند را به پیش برند و من در این دنیای دیدنی ها افزون شدم قدرت تکان خوردن را هم ندارم دوست دارم بمانند آبران بیشمار این خیابان ها بر جای خود خشک بمانم و ساعت ها چشم این ویترین های زیبا بدوزم و از آن لذت ببرم دوست دارم خیشتن را در بالاترین طبقه از این برچ های باشکوه و فرا برای سانیه هم که شده مجسم کنم اما شاید خیشتن هم بتوانم سر بر آسمان برم شاید در خیشتن چنین توانی داشته باشم که پرواز کنم به آسمان پرکشم در بالای آن برچ ها و در پشت پنجره آنها چه افق نامعلومی در اختیار ماست و به چه فضای دوری میتوان دل سپرد باید در اعماق آن افق خیره شد و برای چند سباهی دل به دریای دید آن سپرد وای که چقدر زیاد مرا به خود میخواند میخواند تا به پیش روم و آن نگاه بر دور دست ها را تجربه کنم اما فراتر از این بورچ های عظیم این مغازه های زیبا این تابلوهای های چشم و این نور به تسخیر آمده باز هم فراتر چه بسیار دنیای قابل است. این اوتوموبیل ها که هر جای این شهر را پر کردند آمدن تا هر سرا از این دایره گردون برگیتی را به تسخیر آدمیان درآورند. از زمین و دریا آسمان تا کرات و تمام سیارات از آن همینان است و حال انقدر ساختند که بر همه جای حکومت برانند و مغرور در جهان خیشتن را صاحب و مالک بینگارند. صدایی آرام در گوشم تنین انداز است. شاید نجوایی است که مرا میخواند، شاید از درون سینه است و شاید از درون سینه خیشتن است. هرچه هست میگوید، از اشرف بودن، از حرمت و کرامت، از بزرگی و والایت، از در اختیار داشتن و از سلطه و حال آن است که باید چشم بر این لایق ترین جانها دوخت و دوباره دنیای آنان را نظاره کرد. باید آنان را دریافت که چگونه در این دنیا گام بر می دارند و پیش می روند. چه بسیارند، تمام سطح این توپ گرد را گرفتند جای جایش را تصاحب کردند و حال مالک بر آن در همه جا حکم رانی می کنند مالکان چه مغرورانه بر جهان هستیگام برمیدارند دارند انقدر اشیا و اجسام ساختند تا هر کار که می را به سهر صورت ممکن پیش ببرند انقدر ابزار ساختند تا پادشاه جهان شوند. ندایی درونم مرا فرا میخواند و میگوید اینان همان جانداران ابزار ساز بودند حال در این چرخه دوار ببین به کجای رسیدند ببین تا کجای را فتح کردند و ابزار پیش پا افتاده دیروز را تا به کدامین قله ها رساندند ابزار بسیار در گوشه و کنار دنیاهای آن اما در صورتی از آن همه مشترکند آنچه بیشتر مرا به خود فراخاند و در این نگاه‌های دار مرا مجذوب به خود کرده است ستی است نورانی در آغوش آنان از هر چیز بیشتر به چشم میخورد هر کدام حداقل یکی از آن را در آغوش گرفته و به او عشق میورزند. او را آرام در آغوش می لمس می کنند و آشغانه در گوش آنان نجوا کرده است بیشتر از هر چیز دیگر این سطح نورانی در اختیار آدمیان است نامش را نمیدانم. اسم اسمان را شنیدم اما باید بیشتر و فراتران را فراخواند. شاید باید به او سطح نورانی گفت شاید باید عشق زمینی بر او لقب داد هرچه که هست بیشتر از هر ابزار دیگری جهان آنان را تسخیر کرده است. است تا سریع به چرخانم به هر گوشه و در کنار هر کدام از انسانها که میروم این سطح نورانی را در آغوش آنان می بینم و می توانم ساعتها به عشق میان آنان چشم به دوزم از دیدنش متحیر شوم. چگونه ابزار ساخته را در آغوش می گیرند. آن را به آرامی لمس می کنند، حافظ آن در برابر هر ناملایمات می شوند. هر ثانیه بر نور تراوش کرده از آن چشم دوختند، هر غم و درد را با او درمیان میان گاه به پرخاش با او مشاجره کردند و گاه با عشق برایش ساعات طولانی نجوای عاشقانه خاندند. تمام احساسات آنان شریک شده با این سطح نورانی است که به آنان جان تازهی دمیده و زندگی را با آنان به اشتراک برده است آدمیان به نظم در آمدند. هر کرده و نکرده آنان دارای نظمی است که از پیشتر برایشان ترسیم شده صبحها در ساعتی مشخص از خواب بر هر کدام به سویی که در انتظار آنها است ره سپار می شوند بسیاری در انتظار آنها هستند تا آنها را در ساعت مشخص به میادگاه معلوم برسانند و آنان باید در ساعتی معین در جایی از پیش فراخانده شده آن وظیفه که به دوششان محول شده را به بهترین شکل به پیش برند جمعیت های بسیار آنان در چهار گوشه این شهر در کنار هم در ساعت معین به پیرون می آیند. با هم و در کنار هم به میادگاه های مشخص شده می روند و آن وظیفه به دوش را به بهترین شکل به سرانجام می رساند. همه در نظمی به شکل چرخای گردون این راه در آمده تا ماشین بزرگی را به حرکت درآورند. و هر کدام در این چرخه منظم وظیفه خود را به درستی انجام می دهد آنکه به دوشش وظیفه بردن است به ساعت معین می آید و این جمع را به خانه دور می رساند آنکه باید همه چیز را نظارت کند ناظرانه چون امروز من جهان را از کمی دورتر نظارت کرده است آن کس که باید بسازد می سازد و آنکه باید به پیش برد به پیش می برد. باز این چرخه به پیش می رود تا در ساعتی معین چرخ گردون را به نظم به چرخش درآورند روز از پی شب بگذرد و شب در انتظار گذر روز بنشیند هر دو به چرخند و بگردند تا یکدیگر را تکمیل کنند و این نظم را به گردش درآورند و انسان در این چرخ آرام در حال پیش بردن است آری این جاندار ابزارساز آمده تا باز هم بسازد. کمی پیش در جعبه جادویی را به جهان داد و بعد طرها سطح نورانی و شاید در دور دستری کره ای از قدرت را پیشکش کرد. و حال این آدمیان پرجان و با تلاش هر روز در این چرخ گردون در حال پیش پردن این نظم هستند تا باز هم ابزار تازهی پدید آورند و خیشتن را در این نظم شریک و موثر بدانند حال که این جمع کثیر از آدمیان را دیدم این نظم گردون و این چرخ دوار را احساس کردم شاید ذرهی به خیشتنم آگاه گشتم شاید من هم بخشی از این چرخ گردونم شاید بخشی از این چرخ گردون بودم یا نه فراتر از آن من هم ناظری بر این چرخ گردون هستم شاید اصلا همین انسانها مرا پدید آورده اند تا ناظر بر اعمال آنان باشم تا آنان را قضاوت کنم اما چرا کسی به سراغ من نمی آید تا داده هایم را دریابد؟ شاید چون این دستاورد ها کم و اندک است شاید باید بیشتر از آنان دریافت و در دور دستی کسی به سراغم آمد فیا من به سراغ کسی رفتم این دریای افکار مرا از اصل خواستم دور کرده است و من طالب دیدن جهان آدمیانم من آمده تا جهان آنان را بشناسم من آمده تا به زیر و بم های دنیای آنان آشنا شوم آمدم تا جهان آنان را دریابم و باید نگذارم تا این دریای افکار مرا از وظیفه خود دور کند حال که این نظم آدمیان را دریافتم شاید بیشتر دوست دارم نظم خیشتن را دریابم شاید وظیفه بردوش خود را درک کرده و حال باید به مثال آنان برای گرداندن این چرخ مددی برسانم نباید بازی استاد، باید به پیشرفت و تمام قله را درنوردید قله ها، کوه دریاها از آنها هیچ خبری در میان نیست؟ چرا آنها را به خاطر میآورم؟ اما هیچ از آنها ندیدم؟ شاید از ما دورتر هستند شاید آن جنگل های و جانبخش دورتر از این آشیانه آدمیان قرار گرفته است اما تا بخواهی و تا چشم کار کند تمثیل آنان را دیده ای؟ آیا اینها زیبا نیست؟ آیا این دریای خروشان بدل شده به تشبیه که آدمی این ابرجاندار ابزارساز ساخته است زیبا نیست؟ آیا این کوه های باشکوه، این طبیعت خود ساخته این دریای بیبدیل این قله ها و صخره ها این سازه ها که آدمیان ساختند با شکوه نیست. زیباست و باید آنها را دریافت باید آنها را دید باید به با آنها نزدیک شد. اناوین بسیار از آن در جایجا شهرها ساختند جای پارک است شبیه سازی شده از جنگلی انبوه در دور دست ها. جای استرخیست بزرگ و خروشان به موج‌های مصنوعی مزین شده تا بار دیگر تصویر دریایی را تصور کند. کوه‌ها جای خیش را به برج‌های بلند آدمیان دادند و شاید کمی دورتر ابرماه و خورشید هم همتایی از این آدمیان ابزارساز داشت و جایگزین آنان شدند. به جای آنان نشستند و آنچه آنان کردند را شبیه سازی شده و در حد نیاز آدمیان در اختیار دادند حال دیگر به مثال دورترها نیست حال دیگر جنگل هر جا که بخواهد سرک نمی کشد و برون نمی آید. آنجا که آدمی میخواهد ساخته و پرداخته می شود و شاید در دیرترها خواست آدمی تا همه چیز را در اختیار و به زیر پرچم خیش درآورد و از آن استفادهای ببرد که خیشدن می خواهد فوج فوج آدمیان از کارها به خانه باز می گردند و باز هم سطح نورانی در آغوش آنهاست در انتظار محبت از آنهاست اما آدمیان آشق در خوری بودند در تمام روز و همه ساعات آنان را دریافتند و به محبت مزینشان کردند هر از چندگاهی آنان را به آغوش گرفتند و در گوششان نجواهای آشقانه گفتند و حال این مشروعان پر رمز و راز آرام به خواب می و در آغوش عشق لمیدند آدمیان به خانه می در شهری که همه آن امن است. امن و آرام در اختیار آنان. آنان به راحتی زندگی می کنند. نه کسی مخل آسایش هاست و نه کسی به آنان دست رازی می کند. افسران بیشمار محسوس و نمحسوسی در تغییب شبان روزی هستند تا هر کسی که نظم را برهم زند از میدان به در کند. و این گونه است که این جمع آدمیان به دور از هر بینظمی و هر جمرش در امنیت و آرامش میروند و باز میگردند همه چیز این شهر منظم است. همه در جای خود ایستادند، خبر از بیقانونی نیست. انقدر ابزار ساختند که در جای مناسب از هر کدام بهره ببرند و برای ماندگاری این نظم هم به آن متوصل شوند. حتی برای لحظه هم بینظمی مشاهده نکردم همه چیز بر طبق اصول و قواعد خود در حال پیشرفتن است هر چیز به موقع و درست پیش می رود همه در جایی که به آنان گفته شده آرام اند. چیزی که گهگاه چشمانم را به خود مجذوب کرده افرادی است که در هر گوشه و کنار این شهرها آرام در انتظارند آرام نشستهاند تا فرمانی بشنوند تا دریابند و بین را ریشهكن کنند نمیدانم چرا هرگاه احساس میکنم خیلی بیشتر از این افراد یک دست و یک شکل بیشماران دیگری در لباس مبدل در نقش همینان فرو رفتهاند شاید اینها هم همه از بدگمانی من است باز از خیشتن است شاید من به خاطرات بیشتری آلوده شدم شاید به واسطه این خاطرات این گونه قضاوت می کنم اما اگر از سوی آدمیان برگزیده شده تا آنان را نظارت کنم حتما آنان از گذشته من بیشتر می دانستند. شاید اصولا از سوی آنان نیستم و وای که باز این دریای چراییها ها در برابرم نخش بسته و سفارایی می کند اما حال توان پاسخ به اینا نیست باید بیشتر به جهان آدمیان غرق شوم و از آنان بیشتر بدانم در دل این شهر بزرگ و با به هر گوشه که نگاه میبری بستری فراهم شده تا هر نیاز از آدمی گرفته شود. آنقدر در برطرف گردن نیازها پیشرفت گردند که هر نیاز را با هزاری را درمان اند. از هرچی که دلت بخواهد برای در اختیار گذاشتن ساختند. گاه احساس نیاز گرستگی جانت را به تنگ میآورد حال هزاری به انواع طبق، رنگ، بو، تعمها در انتظار تو هستند تا تو به دریایان انتخاب کنی آنچه را روزی در سر آرزو ای؟ اگر تشنه شدی چه؟ آنقدر تعم و مزه برایت ساختند که دیگر نتوانی از میانشان انتخاب کنی اگر به شهوت نیازمند بودی چه؟ برای دریایی از افکار و کردار و پندار شهوانی ساخته شده است تا به دریای آن خیشتن را غرق و آرام سازی این جهان آدمیان است برای هر نیاز هزاری پاسخ دادهاند آنقدر پاسخ در آستین پروراندند تا تو بی نیاز شوی است تا تو بخواهی تا تو اندیشه کنی تا نه و برایت اندیشه کنند دریای بیدریغ آنان در برابر چشمان توست حال بیا و از آن دریاب هرچه در فکر داشته و نداشته کافی حساب برای چند سباهی در خیابانهای این شهر پرسه بزنی از هر کوی و برزن نور میتراود چشمانت را میانگیزد و دلت را با خود به پیش میبرد در گوشه پارک همان جنگل شبیه سازی شده آدمیان، در کنار دریاچه‌هایشان، در میان اتومبیل‌ها و رفت و آمدشان، در دل تابلوها و اعلاناتشان، در دل سطح نورانی و جعبه جادویشان، همه و همه برایت هزاری آفریدند. آنقدر آفریدند که فراتر از حس شهفت و گرستگی و تشنگی به هزاری دیگر نیاز در دل بپرورانی و پیش روی. حال که آرام در دل این پیاده رو قدم میزنم، بیشتر از دیدن انسان دوست دارم تا به جهان ساختهشان بنگرم دوست دارم خیشتن را در این ویترین های پرزرق و برق رها کنم هر بار به چیزی چنگ بزنم که اینان همه مرا فرا خوانند راستی چرا در من احساس نیازی نفته نیست چرا از آن دیربازی که چشم را بر این جهان گشودم گرسنه یا تشنه نشدم نکند من اصلا همتای این انسان ها نیستم آری حال بیشتر از بیش برایم مجسم است که من همتای اینان نیستم آنان قدرت ساختن هر ابزاری را دارند و حال بیشتر درام فکرم که اینان مرا ساختند اینان مرا ساخته تا از شناخت من به جهان بهره برند هرچه هست من با دنیای آنان تفاوت دارم و حال که به این دریای از پاسخ بر نیازها چشم دوختم، دوست دارم بیشتر آنان را دریابم شاید خود انسان هم همینگونه اند. شاید دیگر برایشان این زرق و برق از خویشتن هم مهمتر شده است. اما اینها تمام دیده های من از دورتر فرازی از جهان آنان است. اما چرا اولین تلنگور ذهن من این نقطه مبهم بود؟ تابلوها، ویترینها، مغازه ها، بروشورها، تبلیغات، سطح نورانی، جعبه جادویی همه و همه فرا می خانند. هزاری را فرا می خانند. هر بار به شکل و در ظرف خاصی پیش می آیند و در برابرم نشستند هر بار به نیازی چنگ میزنند و مرا باز برخیش فرا می و انگاه چه زمانی خواهد بود که من خیشتن را از خود دور دارم و به تسلیم در برابر زرقی از آنان مجذوب بنشینم حال که تنها طالب دیدنم طالب چشم به جهان آنها اما شاید به دور و نزدیک زمانی مرا به راه خود فرا خواندند و بدان دان مجذوب واماندم همه چیز مبدل به کالایی شده و باید جان را فروخت به پشت این شیشه ها گاه لباس است و گاه جان گاه جان ها به رقص در می آیند کارگر می شوند، آمل می شوند و باز مجزوب می کنند و گاه جان به خون عطق می و شامه ها را به خود می کشانند. آنان به رقص آمده دل بیشمارانی را تحریک کردند. آنان در ازای پول و اینان در ازای پول حال در حال بدبستان جان یکدیگرند و نظمی فراتر از آنان همه چیز را در آرامش و امنیت فراخوانده است. امنیت ساختن برای این دریای بیکران از زیبایی‌های های خود ساخته سخته است اما هنوز نتوانستم ذره این نامنی را دریابم هنوز هم که به هر جامعی رویم نظم و امنیت را در و حال برایم محکم و سوار است که چیزی فراتر از این ناظران یک شکل و یک دست وظیفه سامان دادن را بر عهده اند. آری حق است این نهای حقیقت در این دنیای آملان است آنان دانسته و انگیشیده تا چه کنند آنان به آزمونهای بسیار دریافتند تا چگونه این نظم و امنیت را برقرار سازند به طول هزاری سال دریافتند که هماره چوب و تیغ پولادین راهکشای جهان هستی نیست و گاه این جانهای كمفروغ در برابر اربابان نیازمند تشویق و تحسینند گاه باید به سلاحهای دیگر مزین شد تا همه را دربر گرفت همه را همرنگ و رنگ ساخت شاید باری به زور تو پاسوزاندند لیک باید راه‌های نوین در این ورته از بودن را دریافت که تکامل آدمیان به دانستههایشان در ارزشهای خودساخته هر بار نیرومندتر جهان آنان را به پیش برده است چه عوامل دیگری در این نظم بخشیدن مؤثر است چه چیز دیگری تا این حد این جماعت چند رنگ را به تعظیم و سجود واداشته و از این هزار رنگان یک رنگانی ساخته است. نه تنها این ناظران یک دست و هم شمایل نه فقط این بوغ و مداوم نه فقط این حسه بودن یک پارچه و در کنار هم چیزی فرای اینها نیز در راه آرام کردن آنان در تلاش است. او هم به مدد آنان آمده است تا در این نظم و امنیت در این یکسان سازی و سکون کمک کند مدد برساند چه با شکوه آنجا که این جماعت چند لایه و متفاوت یک راه و یک صدا در کنار هم برای تغییر حرکت می چه شور و هیجان غریبی جهانشان را در نوردیده است حال دیگر تمام سلاها رنگ و جان تازهی گرفتند، حال دیگر به مثال سابق در حال فروش اجناس دیر روزگاران نیستند، اجناس تازه به میان آمده است حال سرنوشت و بودن را درگیر کردند، تغییر را فرا و حال روز تغییر و دگرگونی است آگهی نماها شمایل تازه‌ای به خود دادند در جای جای شهر و دیار این آدمان مغرهای است تا از تغییر بگوید تا از بهتر شدن ایام نقل کند و جماعت بیشماری را گرد خود درآورد. حتی محشوخ هم نقل بسیار برای آشغش خوانده است به نجوای عاشق دلباخته سطح نورانی آواز میخواند رنگ می بازد از تغییر سخن به میان میآورد و معشوق را به دنباله خویش خواهد کشاند او به پیش می رود و معشوق زمینی در جستجوی اوست جعبه جادویی به میان آمده است همه و همه در کنار هم یک صدا از تغییر تازه سخن می رانند. نفراتر از تغییر رفتند آنان را درگیر در این بازی تازه کردند آنان درگیر به بازی قدرت خواهند شد آنان برای داشتن سرنوشتی متفاوت به بازی تازه‌ای گام نهادند آنان می‌دانند و دانسته شده اند که راه تغییر و مشارکت در قدرت همین بستر پیش روست دیگر نیاز به بلوا و جانفشانی نیست دیگر فریاد راه نخواهد بود حال آدمیان در تمدن قرقند. حال دریچه تازه در برابر آنان است و حال خواهند توانست تا در این دریچه برامده راه درست را برگزینند به پیش بروند و هر انجه از قدرت میخواهند را طلب کنند. امروز آگهی نماها فریاد میزنند سطح نورانی به کنش آمده است. جعبه جادو با هزاری سخن و راهکار میداندار است و آدمیان چشم دوخته بر لبان اینان در تقسیم قدرت مشارکت می کنند چه با شکور صفحای طویلی که پشت در پشت هم دا گوش هم در کنار هم سیل می سازند راه می از ریشه بر می کنند و تغییر می نشانند آمدهاند تا سامان دهند آمدهاند تا حرکات باشکوه پیشین را با تمدن غالب به پیش برند میدانند چه میخواهند هر روز به طریقی اولاتر از پیش بدآانها گوش زد شده است که چگونه به این راه بزرگ خواهید رسید هر روز از ارزش والای این حکومت مردمی بر آنان در اشکال مختلف سخنها روا شده است میدانند که امروز خیشتنشان در این تغییر راهگشا هستند و حال باید با شکوه به مثال طوفانی بیایند و همه چیز را بدل کنند به آنچه در ذهنی پرورانده است اما ذهن آنان چه میگوید؟ به دنبال چه چرایی مانده است در طلب کدام تغییر است وای از این سوال های هزار تو که مرا از این عظمت و شکوه، از این همبستگی و تجدد از این بودن و مشارکت دور کرده است حال زمان پرسیدن نیست حال زمان لذت بردن است حال زمان بهره از این دستاورد بشری است حال باید صحفهای طویل براه انداخت از شکوه و همبستگی سخن راند آراب و اهداف به دست گرفت و در صندوقها انداخت تا به فردای نزدیک هر تغییر را به پیش دید مدام تغییرات و چرخه این تغییر به جانشان گوست شده است. میدانند دانند تمام تفاوتها را شناختند از همه چیز برایشان گفتند گاه با نجواهای آشغانه سطح نورانی که دلبرانه به میگوید. طلب تو از تغییر در دل راه راست در پیش متوالی است گاه به فریادهای جعبه از جادو، گاه به قدرت چشم نوازی و زرق و برخهای خیابانها و گاه نور متراکم به میان می آید، و برق بر جان آنان، چنگ بر نان آنان، راه بر گام آنان خواهد نهاد باز چرخ این جهان به گردش در آمده است و در کمی دور دست ها نشستند و در پی کار این جماعت همیشه در صحنه ایستا مندند. آنان آنچه خواسته و باید را کمی پیشتر انجام دادند و حال زمان حرکت این توده های بیشمار است زمان دیدن است، زمان لذت پردن است و گویی من نیز باید به کمی دور دست پیش روم. بر آسمان بنشینم و در منزلگاه دور از آدمیان حرکت با شکوه آنان را تعقیب کنم باید ببینم این دنباله به کجا خواهد رفت چه راه را بر پیش خواهد ساخت و حال که در پی تغییر آمده است چه چیز را به کرسی خواهد نشان به همه پرسی و به همدانی به مشارکت و به هم همبستگی به تغییر و به تمدن به تجدد و به پیشرفت به همه سلام میگویند و در صحفهای طویل آرزوها و آمال را به صندوق‌های پیشرو میسپارند می نویسند نامه است آرزوست می نویسد تا آنچه به آمال در طول این سالیان از زبان همه و همه از جان نورانی تا فریادهای جعبه جادو از هر که بود و نبود از دیرترها و آنچه به آینده خواهد بود بدانند که تغییر در پس این مشارکت و با هم بودن است پس پیش رفتند به ارزش پیش آمده در برابرشان سلام گفتند تا آنچه به دل و در آرزو در پی سالیان جان داشتند را عملی سازند و این صحفهای باشکوه ساخته شد قدرت به مشارکت درآمد و به آرای عموم گذاشته شد تا سعادت و خوشبختی را در منزلی نزدیک به خویشتن با مشارکت و همبستگی در آغوش بگیرند در این جهان مدرن و بی هم تا آدمی که همه چیز جهان در اختیار گونه به تکامل رسیده ای از جان هاست قدرت های بیشمار بسیاری در جهان وجود دارند آنگاه که به آسمان می‌روم، به پرواز در می‌آیم، چه که بسیار از این آدمیان را می بینم که در سراسر جهان گرد هم آمده و در حال ساختن جهان بهتری برای خود هستند امروز اصولی ارزش حقیقین جهان آنهاست، اصولی که همه می‌دانند، تخطی از آن به معنای پسرفت و عقب ماندگی است. پس همه خود را به این هزار توی پرشوکت می و در این بخبه از یکدیگر دیگر می گیرند. کشورهای بیشمار جهان و قدرتهای بزرگ در عالمی از رقابت در حال رقابت آنان میتازند تا در این ارزشهای تازه ساخته شده بشری از یکدیگر گوی سبقت را بروبایند و در این رقابت بزرگ پیروز باشند از این روز که هر روز قدرت تازه‌ای سر برمیآورد می‌آورد چند قدرت همیشگی هماره وجود دارد و برای تصاحب دیگر جایگاه‌ها باید که دیگران با دیگران به مبارزه درآیند آنان به این رقابت با این چهارچوبها واقفند و برای پیروزی دست به هر کاری میزنند فرای اینها جامعه بشری پیشرفت دست به ساختن سازمان تازه‌ای نیز زده است سازمان بزرگ و جهانی برای پاسداشت از ارزشهای انسانی ارزش های تازه ساخته ای که جهان بهتر و زندگی راحت تری را برای همه ابنای بشر به ارمغان خواهد آورد. این ارزش های تازه و این زندگی نو نیاز به سازمانی دارد تا از آن پاستاش کند، پس آدمیان پس از جنگ ها پس از کشتار ها پس از خون ریزی ها و استثمار ها بران شدند تا در ساختمانی برای نظمی نوین به همکاری هم جهان را پاستاش کنند از ریختن خون ها جلوگیری کنند حافظ جهان تازه ساخته خود باشند و برای ماندن در این جهان تازه تأسیس تلاش کنند نام این سازمان پاسدار حقوق همه ها چه بود شاید سازمان ملل شاید سازمان حقوق بشر و شاید هزاری اسامی دیگر اما پیش از اسم آن وظیفه خطیر بر دوش آن مهم و چشم نواز بود دیدن این سازمان این بودن انسانها، این فکر کردن و این سامان دادن باز مرا مس این هوای انسانی می کرد و دوست داشتم بیشتر به پرواز درآیم بیشتر ببینم اما دریخ که دیدن های من هم کم و کوتاه بود اما باز هم باید دید به پیش رفت باید تمام دریچه های ساخته به دست بشری را به بوته آزمون گذاشت و بیشتر از آن درک کرد در این دنیای ساخته به دست آدمیان گروه های بسیار ساخته شد آدمیان باز به مسابقه تمام تاریخشان از هم دور و چند دسته شدند. تعدادی کار کردند تا بسازند کسانی فکر کردند تا بیالایند، کسانی کسانی حکم کردند تا بیارایند. گروه و گروه ها از پیه هم این جهان تازه را ساختند و پیش بردند اما گروه تازهی قدرت و شن را به کام خیش برده بود صاحب بود و چون دیر بازان عجر فراتر داشت آدمیان میدانستند. ارزش کار والای آنان را درک کرده بودند. این جهان پیشرو را از برکات آنان داشتند، پس آنان باید که بالک میشدند. این منطق هزاران ساله آدمیان بود و باید بدین راه احترام میگذاشتند. حال عالمان بودند و علم بود که راه و طریقت می ساخت. علم یک که سوار بر کرسی قدرت میتاخت و آدمیان دنیای تازه را بدانها مدیون بودند هرچه در این دنیا میخواستند اراده کافی بود تا به دست این عالمان بر دست روز معشوق خواستند پس پیش آنان معشوقه ای تازه بر جان آدمیان بود روز از کار به تنگ آمدند، پس کارگران ساده در برابر رویشان بود روز فریاد برآوردند و طالب قدرت شدند آلمان پیش رفتند تا طریقتی تازه برگیرند آنقدر بسازند و بخواهند که هیچ درمیان نباشد آنقدر پیش بردند که نام ساختهشان بس بود که جهان در خوف قدرت آنان هرچه میخواستند بکنند عالمان پیش رفتند و همتا ساختند هم پیاله و همراه راه آفریدند، خالقی شدند، خلق کردند هر چیز شده و نشده را تحلیل کردند آموختند، دانستند و این طریقت را قدوست بخشیدند حال دیگر روزگاران پیشتر آدمیان نبود حال روزگار علم و نموه این خواستگاه آدمی به میان آمده بود حال روزی بود که علم نه ابزار که حقیقت بود که نراهی برای ساختن ابزار تازه که قداست بود حال هر که از ش این در گران مایه دور بود هیچ بود و در عدم محکوم به ماندن میشد. حال علم راه و طریقت بود همه چیز این جهان مدیون همین دانش آدمیان بود. حال انسانها میدانستند تنها عامل پیشرفت آنان همین بودن آنان است همین دلیل بقا و ماندن آنان است هزاری به خود خانده بودند که اگر تا به اینجا رسیدند از همین حس درونی آنها نشعت گرفته است آری با صدای بلند خیشتن راه موجود ابزار ساز خاندند. و در این ساختن پیش رفتن و خود ساختن را ارزش ساختند دیگر وسیله نبود حق بود حقیقت بود همه چیز در همین ساختن خلاصه بود ساختن چه و چگونه ساختن در میان نبود چرایی ها باز هم به فراموشی سپرده شد تا به جای هر چرایی وجود ساختن علت و قایت هر اتفاق جهان باشد پس آلمان پیش رفتند و هر روز در این رقابت مرگبار از یکی یار پیشی گرفتند. پادشاه آن بود که بیشتر و با کیفیت خلق می کرد. گاه کمیت به کیفیت چربید و گاه کیفیت اصل و بنیان شد. اما چه که بود و مهم و اصل داستان خلق کردن بود و نه خالق به چه شدند حال آلمان پادشاه بر موجود ابزارساز بودند که او عامل به ساختن بود او فکر پروراندن بود او هدف و قایت پیشرفت و پیش بردن بود پس هرچه بر سر داشت پروراند و ساخت گاه بوم پای ساخت تا قدرت را تسبیت کند گاه موجود تازه خلق کرد تا خلقت را تقلید کند گاه بدل و شکل ساخت تا حکمت را تنبیه کند و انقدر ساخت تا هر چه تاج و تخت بر جهان بود را برخیش تنفیز کند این طبقه حال معنای آن اشرف و برتر بودن بود حال مالک بر کرامت بود حق را در خیش دانست و عامل پیشرفت بود و آدمیان چه سری بر پای این بوت تازه ساخته سایدند که همه میدانستند چه برتر و والاتر از افکار چرخ این زندگی تازه را همین پیشرفت در ابزار ساخته است پس فرمان رواه حقیقی جهان او بود و باید به پیشگاهش خدمت کرد آدمیان نخوس به لذاتش پاسخ گفتند و در آن غرق به خدمتش درآمدند و از خدمت خیش راضی و سرخوش زنده به پیش رفتند فرای این فرمان روایان بی تاج و تخت دیگرانی نیست پیشگام و پیش فرمان در پیش بودند گاه تاج داشتند و گاه بر تاج دیگری الماس میشدند. آنان وظیفه در پیش رویشان بود که گاه سرگرم کنند، گاه برخصانند گاه بچرخانند گاه مجذوب کنند، گاه تاثیر بگذارند و فرای همه اینها از احساس به احساس دیگری نفوذ کنند. خزیده خزیده به جان روند و از جان شوند. هنرمندان پیش رو بودند. آنان که به طول هزاری از احساس برآمدند و بر احساس دیگری نشستند، حال در پیش روی بودند تا باز احساس برانگیزند. اما شاید این بار زمانه تغییر کرده بود. همه چیز به پیش رفته بود و دیگر نیاز به برانگیخته شدن احساسات نبود. حال زمانه زمانه شناخت و تحلیل بود. حال زمانه دانستن و تحمیق بود، حال باید می باید خداگاه و به دور از هر احساس، احساس برمیانگیختی. این هنر بود، نه فراتر از این بود، هر چه بود و نبود، باز هم در میان بود این تاج بر سر دیگری و به کام آن یکی و به جان هر کسی باز هم در پیش بود باز قلندرانه علم و قلم به دست میگرفت باز پیش میرفت باز همه جا را تسخیر میکرد قلوب در برابرش بود ابزار پرنفوذ بر احساس دیگری بود قوه محرکه و تشخیص بود همه معانی را به خیش میبلعید و به هزاری رنگ بدل میشد هر بار در رنگ و ساعتی خاص تبلور می آفت و باز به پیش میرفت و جماعت بیشماری ساعت مدید در انتظار رخ با کمالاتش در انتظار می نشستند. حسرت میخوردند و دیوانه او میشدند حال باز هم باید همه ابزارها به کمک میآدند تا او را ببینند و احساس کنند. آمده بود تا احساسات را برانگیزد شایدان چه دیگران نمی توانستند بکنند و همه را به دوش او گذاشتند او باید تنها همه زحمات را به جان می خرید و به پیش می برد حالا وظیفه تهییج داشت وظیفه تحمیق داشت وظیفه تبلیغ داشت هر بر دوشش بود باید که به پیش میبرد و همه ابزارها هم به کمکش می آمدند. اگر نیاز بود جعبه جادو ساعتها برای بستش سخن می‌راند اگر نیاز بود سطح نورانی می‌گفت و به گوشها نجوایش می‌کرد اگر می‌خواستند هر چه تابلو در خیابان بود را به خدمتش می‌آوردند ابزار به راه ابزار همه به همه سود می‌رساندند و بر پایه این نظم به کمک همه آنان و در کنار هم بود باید دید باید همه را از دور دید و از بالا به نظارهشان نشست و منی که حالا در این سکوت به نظاره این شکوه نشستم هرچه به دل اینها نهفته باشد را بیکم و کاست خواهم پذیرفت تا ذرهای به نوای آنان گوش ذره ذرهای دور شوم. آنقدر در این دوراهی پرقدرت مرا به چالش کشیدند آنقدر زندگی بر ابزار را به جانم خوراندند که باید در این تحییج احساسات از جان و دل بیخود خود و فرارمم باید دست به دامان آن صدای برخسم به و بمانم که بودن و بقایم در شنیدن و خواندن و دانستن همینان است اما چرا تا این حد باز بر دنیای آنان بیشناخت پر از تصمیم و باور شده‌ام آنان که هیچ به من نگفتند آنان که هیچ از دریای دنیایشان بر من نگشوده‌اند اما باز همین بدبینی به جانم رخنه کرده است آری حال زمان درگیری در این بدبینی نیست حال باید دید بر آسمان پرکشید از شکوه و هیجان اینان گفت از مجالس پربزم و رخص و شادی و سرور آنان از شادمانی و سرمسی از تهیج و فرارفتن از رهایی و در آسمان پرکشیدن از پیشرفت و بالاتر رفتن باید همه اینها را دید باید دید که این موجود ابزارساز چگونه توانسته است تا به بدین درجه پیشرفت کند که در این برهوت عدم و پوچی هرچه بخواهد را بسازد گاه تخیلات خیش را آنقدر جنبه بر حقیقت داده است که حتی تشخیص رویا و واقع آن غیر ممکن است آنقدر در این پیشرفت از خیشتن پیشی گرفته که هر ناممکن را به ممکن هر ناجود را به وجود بدل ساخته است هر چه خواسته را به دست آورده و حال که در این شهر آدمیان گام برمیدارم در گوشه و کنارش هرچه چه می بینم از پیشرفت و بالارفتن آنان است آری اینها قابل رؤیت و دیدن است از هیچ دیترها هیچ باقی نمانده و هرچه هست از آن همین موجود ابزار ساز شده است هرچه خواسته را در آغوش کشیده و هرچه خواسته را به چنگ آورده هرچه خواسته را به عشق بدل ساخته و هرچه خواسته را از بین برده است آیا اینها مفهوم پیشرفت و دگرگونی است؟ آیا این حد نها از خواسته های آدمیان است؟ پاسخ در پرسش نفته است کدامین آدمیان اگر انسان به شمایل آن موجود ابزار ساز براید بیشک هرچه خواسته و فراتر از آن را کسب کرده است شاید باز هم طالب داشتن فراتر باشد که هست که به دل و خواستهش هر روز در حال فزون است اما باز باید دوره کرد که در بدر در به دنبال کدامین طریقت جان می سپارت. آریم روز هر هست از همان ابزارساز دیرترها سخن به میان آمده و چرا مرا در این حجم از خوشبینی و بدبینی غرق کرده است حال که همه چیز در سطح و پیش روست من هر بار به دیدن هر اتفاق برداشت خاصی را پیش کردم شاید درمان من به درون عمق آنان است شاید باید از این نگاه بر سطح فاسره گرفت باید هرچه بیشتر و بیشتر در عمر رفت و اماق را دریافت حال که همه چیز را میبینم هر سطح را بران چه در پیش رو نمایانه است دریافتم باز هم از دنیای آنان هیچ نمیدانم هیچ از درون آنان آگاه نبودم و شاید باید به پیشواز این اعماق بروم در این دنیای تازه ساخته آدمیان چه روی پای نهادم باز همین سوال همیشگی به همراه من است چرا چیزهای متفاوت از گذشته و حالشان میدانم همه چیز در بس در اختیار دیدهای من نیست و فراتر از آن در ناخودآگاه به همراه من است آیا این است بر دوش من آیا وظیفه من شناخت و دانستن دنیای تازه ای آنهاست نمیدانم همه چیز برایم هم گنگ و است. شاید پرسش درست فهمیدن چرایی و بودن خیش باشد، شاید باید این چرایی را ابتدا در جهان پیرامون به کنکاش نشست همانطور که از ابتدا کردم و خواستم، ابتدا دنیای پیرامون خیش را بشناسم و به شناخت آنان از خیش به شناخت برسم اما حال فرای همه اینها میدانم که فراتر از این شناخت نیاز به رفتن در میان اعماق افکار آنان دارم حال باید به پیش روم سعت را بشکافم و اعماق را دریابم این ایستابودن من در دیدن سطح هر بار مرا از واقعیات دنیای آنان دور خواهد کرد از دنیای آنان چه دریافتم آری دیدم همه را دیدم از جعبه جادو تا سطح نورانی تا اجرام آسمانی تا اشیای همانند و مشابه همه را دیدم نظم آنان را شناختم امنیت را درد کردم مشارکت و با هم بودن را دوره کردم دیدم چگونه این موجود ابزارساز پیشرفت و پیشرفت از آن خود کرد دیدم آلمان به کجای چنگ انداخته و در پیشگاه این ساحت مقدس به کجا رسیدند همه را دیدم احساس را دریافتم به هنر مزین شدم و از حجوم احساسات به خیش لغزیدم همه را دیدم و دریافتم اما درد در کجای این منزلگاه لانه کرده بود چه باعث شد تا همه چیز را در نیابم و باز در چراهای خیش خوته بخورم آری باید سعت را شکافت و عمر را دریافت که سعت برای اقواب پیش آمده و شاید اگر حقیقتی بود در عمق خانه باشد پس قام بعدی که نمیدانم وظیفه‌اش را چه کسی بر عهده امนาด نزدیکی و دریافتن یافتن عمق کتاب اقوا اثر نیما شاهسواری بخش دوم در میان این سفر طول و دراز با دیدن جهان تازه آدمیان هر بار در جانم احساس تازهی زنده می شود و از هر چیز بیشتر دوست دارم دیدن را بیشتر دوست دارم ببینم و از آنان دریابم اما به راستی وجود من از چیست؟ آیا من هم مثال آنان انسان هستم؟ آیا به مثال آنان تکامل یافتم؟ آیا به اندازه آنان ارزش زندگی کردن را دارم؟ در همین چند سباه و در همین روزگاران دیده هایم می دانم که انسان بودن نعمتی است بس شگرف آری، این است بزرگ و این را هماره آدمیان با رفتارها و کردارهایشان به من ثابت کردند. حال بیشتر از پیش می‌دانم که بودن از آنان است که لایق هر جنبنده ای نخواهد شد. راستی چقدر از دیگر جنبندگان کم به جهان مانده است؟ چقدر آنان را در این دنیا کم دیدم؟ حال دنیا دنیای انسان هاست؟ اینان مالک بر زمین هستند و پادشاه زمینیان و بودن از آنان خود مرتبتی فراتر از دیگر جانداران است حال باید به انسان بودن وانمود کرد؟ باید خویشتن را در پوستین آنان جای داد نمیدانم هنوز هم نمیدانم که ماهیت و هویت من در چیست اما این را خوب می‌دانم که آدمیان دریچه‌ای را برای ساختن هویت باز نهاده‌اند و خواهم توانست به زودی هویت تازه‌ای برای خیش تعریف کنم اما باید که به قواعد بازی آنان واقف باشم باید راه و طریقت آنان را بشناسم و با پیروی از این راه و کار آنان به آنچه چه می‌خواهم دست یابم که تخطی از ارزش‌های آنان عواقب سهمگینی به بار خواهد آورد پس فراتر از خیش و هویتم امروز باید بیشتر آنان را بشناسم باید بیشتر به جهان آنان نزدیک شوم این دیدگان از دور این پرواز در آسمان ها آن چیز که لایقه عصر را به من نرساند و حال که میدانم وظیفه‌ای بر دوشم سنگینی میکند باید بر آن شوم تا آنان و جهانشان را بیشتر از پیش بشناسم باز هم به قلب همین شهرهای انسانی گام برمی دارم. باز هم آمدم تا جهان آنان را از نو سر آغاز کنم. باز هم ببینم و بیشتر دریابم. اما نه این بار دوست ندارم که به آسمان پرواز کنم. دوست ندارم از کمی بالاتر جهان را زیر نظر بگیرم. دوست دارم در کنار آنان و بخشی از آنان باشم. چند باری خواستم تا با یکی از آنان سر صحبت را باز کنم. اما او چیزی از من نشنید و آرام از کنارم دور شد هرچه کردم تا با او ارتباط گیرم راه چارهی نبود و دلسرد شدم شاید برای نزدیکی به جهان آنان باید جزی از آنان بود و من دور از دنیای آنان لانه کردم و شاید ده فراتر از آن باید به آنان بود و من از آنان دور و دورتر شدم حال با تمام آنچه چه می دانم و ارتباط میانمان هیچ طریقتی به خود ندیده اما میتوانم از نزدیک آنان را زیر نظر بگیرم شاید چند سباه دیگر که کسی به بازخواستم آمد تا از اینان گزارشی بگیرد بتوانم از دیده هایم به نزدیک و به نفسهایشان آنچه می میخواهد را به او بازگو کنم اما نه فراتر از آن برای خیشتنم دیدن و شناخت آنان پرارزش است. پس باید همه این لایه ها را به کناری زد و بیشتر بر آنان نزدیک شد مثال همکنون که نفس در نفس یکی از آنان هستم به نزدیکی چند انگشت، انقدر به اون نزدیک شدم که گرمای نفسش را بر جانم احساس می کنم. باز هم جان به پیش آمده و حال میدانم که به داشتن این نقطه با هم مشترکیم هرچه تفاوت میان ماست، دور باد که به جان هم تراز و یکسانیم این نزدیکی، این دیدن، این آزمودن آه که هیچ تغییر از آن دیر روزگاران نکرده هنوز هم همان دست ها، همان پاها، همان انگشتان و همان انسان این همان انسان گذشته هاست اما مگر من از آن دیرباز چیزی به خاطر دارم آری حتما دارم که مدام بر سرم تکرار می شود اینان همانها هستند که به طول این هزاران سال جهان را در نوردیدند اینان همان قوم دیر پا هستند که از گزند رد و باران پناه می گرفتند و ساعتها به دل قار اشک و شیون می کردند از صدای زوزه های حیوان به درد می آمدند و از تنهایی و فقدان قدرت اشک می ریختند و حال هر کدام به تاجی مزینند حال هر کدام پادشاه و سروری بر این جهانند و این پادشاهان تاجدار یک قدرت بر زمین به حساب آمدهاند. دوست داشتم بیشتر از این به آنان نزدیک باشم دوست داشتم برای چند سباهی هم که شده به اندرون جان آنان سرک بکشم آنقدر پیش روم تا هیچ ناگفته ای از جان این جانداران برایم باقی نماند به همه چیز دنیایشان واقف شوم. شاید بتوان پیش رفت به اندرون جانشان و جهانشان رفت و بیشتر جهانشان را شناخت آری حال که در چند گامی آنان هستم حال که به زمین و در کنار آنان نشستم باز هم بیش از هر چی سطح نورانی مرا به می انگارد باز اوز که مرا به خود جلب می کند شاید سطح نورانی بود و شاید هزاری دیگر اما هرچه هست شاید این همان تاج بر سر آنهاست شاید اسبابی برای نفوذ بر آنهاست و شاید ابزاری برای نفوذ آنان به اقیار است. نمیدانم. هر هرچه هست آنقدر بزرگ و با شکوخ که همه دنیایشان را پوشانده از جعبه جادو تا سطح نورانی تا هزاری دیگر اسباب که امروز جهان آنان را ساخته است تا نوازش و پچپچ پچ های تا در آغوش گرفتن و ندای دل دردانه همه از آن آنان است و آنان از آن آنند هرچه بیشتر پیش میروم و منزدیکتر بر آنان میشوم های بیشتری از این آلات اقواگر جهانشان را دربر گرفته است برکوی و برزن در دل خانه و رخت خواب، در دل شهر و به سر کار، از لب یار و خلوت رهدار، همه و همه در چنگ سطح نورانی برآمده است. اوس که در آغوش است، اوس که نجوا می کند و به نجوایش سرخوش و سرمست است، آدمیان به تغلا آمدند. بیش جهان آنان در چنگال جهان او در آمده است. او نشان میدهد و اینان می بینند. او میخواند و اینان میشنند او میگوید و اینان میکنند راستی او فرمانده اینان است یا اینان فرمانده بر او به راستی او ابزار دست اینان است یا اینان ابزار دست او کلافم. هیچ نمیدانم این همه نزدیکی را درک نمیکنم اشق و یار و همکار به کنار نشیده است و باز سطح نورانی پادشاه میانداران آنهاست همه هستند لیک به کنار هم دور و دورتر شده اند. همه هستند و از هم هر روز قریب و قریبانه تر شده اند. مادر میخواند سطح نورانی آرام میگیرد به آرامش سطح نورانی فرزند باز می میشود و باز به دریایش مانده است مادر از او اگر فاصله گرفته باز به دستانش سنگینی زنجیران سطر را لمس کرده است شاید باید از هم دور باشند شاید به نزدیک نیستند و اینان آمده تا دنیایشان را بیشتر از پیش دور کنند به نزدیکی و در کنار هم این ابزار هیچ و توخالی است پس باید که دور شد باید آنقدر دور شد که به داشتن این اسباب و ابزار به خیش بالید که حال در کنار یک باید آنقدر دور شد که قدرت سطح نورانی را درک کرد. باید آنقدر دور شد که این عبر ابزار آدمی این ابر ابزار ساخته به دست حیوان ابزار ساز خویشتن را نشان دهد. تجسم کند تبسم کند چهره برآورد ورانچه در آرزوی نزدیکی است را نزدیک و نزدیک تر کند. باز باید دید، باز باید نزدیک شد، آری همه در همین خلاصه نبود و چه سودها رساند نزدیک کرد، بیشتر فهماند و بیشتر آموخت اما ارزش تازه خانده بر اینان آنان را از هم دور کرد و هر روز بر این فاصله ها افسود نمیدانند بر چه طریقتی آمده است بسیار دور شدند از آنچه چه در پیشترها برایشان تعریف شده بود حال ابزار می ساختند اما پس از چندی ابزار اصل می شد و نیاز به فر بدل میگشت. یعنی برای ابزار نیاز می ساختند تا ارزشش را درک کنند همه چیز را دربر می گرفت و پیش میرفت. رفت انقدر در این دالان بزرگ و بزرگ تر شد تا همه چیز جهانشان را محدود کند جهانشان را به دست بگیرد و همه بدانند صدای تبلهای بزرگ این دستاورتها را بشنوند که چه چیز تا چه حد بزرگ و با ارزش است بدانند که انسان به کجا رسیده و کجا را فتح کرده است آرزو و رویا و خیال هزاری پیش را حقیقت ساخته و حال خیشتن مدعی حقیقت است باید به این دستاوردها آنقدر به خود قره شود که عرضش ها را دوباره و از نو سرآغاز کند. باید آنقدر قره شود که عرضش ها را باز آفریند و از نو سر آغاز کند. اما بیش از همه اینها جهان امروز آنان است که مرا به خیشوامی دارد. بیشتر به من فریاد میزند تا جهان آنان را بنگرم. بیشتر از آنچه به دست آورده اند، آنچه از دست دادند و یا فراتر از آن آنچه به دست نیاورده اند، مرا به خود میخواند. باید بیشتر از این به آنان نزدیک شد. باید به آنان یکی شد تا آنان را بیشتر دریافت. برای شناخت جهان آنان نیاز است تا به کالبد آنان نفوذ کرد. اما دریخ که این نیرو در من یافته نیست و برای داشتنش باز هم باید در خود تلاش ها را زنده کنم حال در همین حد که به جهان آنها نزدیک شدم باز هم می توانم چیزهای بیشتری دریابم حال که به آنها نزدیک شدم حال که می بینم چه می کنند صبح ها باید به ساعتی مقرر از خواب برخیزند لباس بپوشند مرتب آراسته راهی را به پیش گیرند که به آنان از کمی پیشتر فرا خوانده شده است باید خیشتن را به راهی برسانند که آنان را فرا میخواند. آنان از خواب برخاست در حیبتی عظیم راه را در می نوردند. آغاز می کنند راهی را که برایشان ساخته شده است آنان باید به پیش روند و باز ابزار تازهی گرد آورند آیا به راستی آنان به ارزش در آمیختند که از کمی پیشتر به آنان فرمان داده شده بود؟ به ارزشی که آنان از آن آن بودند آریجانهایی که ابزار سازند و باید به آخر ابزار بسازند و هر روز در این سیر تکامل از خیشتن دیروزشان پیشی بگیرند شاید از همین روز که در ساعتی معین از خواب برمیخیزند؟ به میادین شهرها و به نزدیکی خانه ها میروند تا حمل کنندگان به پیشوازشان بیایند میروند تا آنان را به قرار برسانند. باز هم سطح نورانی همراه همیشگی آنان است او میخواند و اینان را به راه پیش رو میرساند آنان را به مغرهایی میبرند که از کمی پیشتر برایشان ساخته و پرداخته شده است آنان چشمها را میبند. هیچ نمیشنند. هیچ نمی بینند جز آنچه برایشان لالا و بردیدگان است. آنچه برایشان خوانده و ساخته شده است. آنان را به دورگاهی میبرند تا بسازند تا این حیوان ابزار باز بسازد و باز بیا فریند و باز برایشان هر بار سطح نورانی میخواند. برایشان از ابزار مسرتبار تازه‌ای می‌گوید از پیشرفت و ارزشها ترسیم می‌کند و آنان خیش را به دروازه‌های این دالان خوشبختی می‌رسانند تا شاید بتوانند در آن گوی سبقت را از دیگری بربایند آنان پیش می روند و در این دنیای ساخته در برابرشان از یکی گر پیشی می‌گیرند جهان آنان آنقدر ارزش تو در تو برایشان ساخته که بخواهند در آن ارزشها از هم پیشی بگیرند. بهتر کار کنند بیشتر بسازند و ابزار ساز بزرگی شوند. ابر انسان شوند و در این گوی رقابت به هر آنچه ارزش ساخته به دنیایشان است چنگ زنند. خانه های بزرگ تر مالک شوند، جابجا به جا کنندگان با ارزشتری را تصاحب کنند ابزارهای بیشتری به دست گیرند و خیشتن در این ساختن و پرداختن از دیگران بیشتر شهر شوند توده های بیشمار به پیش می روند در این دالان در برابر باید هر روز به ساعتی معین برخیزند و تا ساعتی معین کار کنند برای رسیدن به ارزشی که کمی پیشتر تعریف شده است و حال در این دنیای تعریف شده در این نظم جهانی تنها شادمانی و تفاوتشان همان ابزارهای ساخته به دست خودشان است. باز وظیفه دارند تا ارزشهای پیشتر را دوباره از نوع باز تعریف کنند. هر بار نمای تازه‌ای به آن دهند و بیشتر در دل خیشتن این ارزش‌ها را مستحکم و قدرتمند کنند و برایش لالا بخوانند. یک روز از پس روز دیگری گذشته است و این گذر آنان را به ماه و گاه سال رسانده است. اما دریغ از درک یک روز متفاوت از روز دیگر هر روز کارهای کمی پیشتر به تکرار خود را باز می آفرینند و چه دردناک که قدرت تفکیک این روزگاران از هم از این حیوان ابزار ساز دریخ شده است حال دیگر او هیچ تمایز بین روزها که هیچ ماهها و سالها نمی بیند هیچ تفاوت از آن در نمییابد و باید هر روز را با همان برنامه پیشترها به پیش برد که در حرکتی جمعی به ارزشی خودساخته جامعه عمل بپوشاند قدرت را بیشتر کند که امروز قدرت بیشتر در داشتن ابزار بیشتر است به ریشه‌ای که برایشان تعریف شده بازگشتند و میدانند که برای تسلط بر این ارزش باید از همه پیشی بگیرند برای داشتن قدرت بیشتر باید در این ارزش سرآمد دیگران باشند و پیروزی از آن جماعتی است که بیشتر خیشتن را به این نظم درآورده است. پس برمیخیزند خیزند، بی کلام و فکر پیش می روند و روزها را پی یکدیگر شب و شبها را پی یکدیگر روز می کنند تا در ابزار و این ارزش ساخته از همه پیشی بگیرند. این جماعت بیشمار از حیوان ابزار ساز که برآمد تا در این رقابت پیشرفت رفت کند محتاج عوامر دیگری نیست هست. آنان باید بستری فراهم سازند تا این ساخته ها، تا این ابزارهای های ابنای بشر بیشتر از پیش مورد وسوق همگان باشد. پس باز دست به ساختن ارزشهای تازه می کنند. این چرخه دوار همواره در حال گردش است. هر بار در خود به فراخور همان نگاه نخستین ارزشی باز تعریف می کند این جماعت می سازد و باید بپروراند تا مصرف شود باید بسازد تا بخواهند باید بخواهند تا بسازند چرخه میچرخد چرخد صبح جماعتی در ساعتی معین به پیشواز آن برایشان مقدر است پیش می روند و می سازند آنچه از کمی پیشتر جماعتی دانستند که نیاز بزرگ زندگانی آنهاست جماعتی می سازند و جماعتی تبهای تازه را باز میآفرینند که این قش به مثال انسان و هوا محتاج یکدیگرند. هربار هر بار نیاز تازهی تعریف می شود و از این ارتش روزمره پاسخ به نیاز باز آفریده خواهد شد آنقدر نیاز و به پاسخش سازند تا همه به این گرداب مبتلا شوند باید نیاز را محکم و قدرتمندتر کرد باید آنقدر به آن بال و پر داد که برای سازنده آن جایگاه و منزلت به بار بنشاند باید پیش از ساختن به فکر فروختنش بود در این چرخه آنقدر مهارت کسب کردند که هر بار با روشی تازه جماعتی را مقموم خود کنند تمام ابزارهای پیشین هم به مدد میآید. آنجا که لازم است ابزار تازه برای این فرایند هم ساخته خواهد شد و باید که همه ابنای بشر را به این مصرف و در مصرف ماندن مبتلا کرد باید جماعتی فکر کنند و برای دیگران فکر بسازند باید جماعتی بسازند و برای دیگران احساس نیاز تولید کنند و هر بار چیز تازه‌ای به میان می آید تا در این رقابت به آرزوهای ساخته شده میان این ارزشهای های جمعی بیشتر نزدیک شود و در این میان چه ارزش از عمرهای جماعت بیشماری که هیچ تفاوت به دل آن نیست و هر روز تکرار سرمخشی در پیش در هاست و روزمرگی میداندار است تابلوها اعلانات، جعبه جادویی، سطح نورانی، همه و همه بیشتر و بیشتر از اینها به مدد میآیند تا در دل این آدمیان احساسی تازه شکل گیرد. ریشه و مستر از همان پیشترهاست از همان جوهره انسانی است، از همان درد پیشتر و از همان نیاز در جان آنهاست. اما باید که بر آن تکی کرد باید که بر این موج سوار شد و جماعت بیشتری را به آن مبتلا کرد؟ نه تنها جماعت بیشتر که همه ابنای بشری را به آن مبتلا کرد؟ آری راستی و حقیقت در همین است انسان ابزارساز است و باید روزی به دانجا دست میافت که همه جهانش بر ساختن و پس از آن به باختن آن باشد او بسازد و جماعتی ببازند که همه در رسیدن به ارزشهای ساخته بر جهان درونی نشانند. این تقلای هزاران ساله این زندگی طول و دراز آنها چه بیشتر از قدرت بود؟ هرچه کردند و هرچه خواستند برای رسیدن به قدرت بود حال هر بار این قدرت به اشکال گوناگونی در آمد. اما نکته مهم کسب همان قدرت بود و حال در این دنیای تازه ساخته ی آنان چه والاتر و قدرتمندتر از آنکه که جماعت بیشتری را به خیش مبتلا کرد. اقوا کرد آنان را به مرداب خیش کشاند و در این باطلاق پای را در آن سفت و بی حرکت گذاشت تا به هران چه ارزش نزد آنان است به هران چه آمال در اختیار آنان است برسند و قدرت از دیروز سوار بر کشتی آرزوها هرچه میخواهند را تصاحب کند می بینم آن بیشماران را می بینم و هر روز بیشتر در می آبم. می بینم چگونه از صبح برمیخیزند به حمل کنندگان میرسند، سخت کار می کنند. هر روز و دیروز یکسان و برابر است. آنقدر می سازند تا در این ساختن و ابزارسازی با ارزش و بزرگ شوند. آنقدر از هم پیشی میگیرند تا یک کتاز شوند اما خیشتن هم میدانند که این کلاف سر دراز دارد و آنان اسباب و بازی چند. اما فقط در همین برخواستن و ساعاتی را به ساختن و پرداختن که نیست فراتر از آن که کار میکنند و میسازند آنگاه ها موقعی که زمان فراغت است، هجوم آغاز خواهد شد سطح نورانی فریاد میزند از عشق آتشینش میگوید از تمع در جهان میگوید جعبه جادو به سخن آمده و درد دل را آغاز میکند فراتر از آنان هر بار در میان اتول حمل کننده در دل خیابان و در میان نور و فروغ تمدن تازهشان هر بار به گوش میشنوند از گوش هم پیشی میگیرد و بر قلب می نشیند باز بارور میشوند. این بار خاست تازهشان همان نیاز گذشته هاست اما بیشتر از گذشته است آنقدر زیاد و قدرتمند که باید او را سیراب کرد. بس باز پیش می روند و هر روز را به سالی پیشتر و به روزگاران پیش پیش می برند. تا نیاز ای را پاسخ گویند هر بار نیاز تازهی سربر می آورد و این جماعت باید به تکاپو آن پاسخ گوید این جان خسته، این ابزارساز قدرتمند، این شاه بی تاج و نشان باز می و باز می شود باز چرخ را به حرکت در میآورد و روزگاران را به مصابهی پیش میگذراند و در انتها خیشتن مصرف کننده آنیس که خیش آفریده است و باز این چرخ دووار در حرکت است اما گهگاه هم از این نظم بر ساخته انسانی هستند آنان که سر برون آورند هستند آنانی که خسته شوند هستند آنانی که این ارزش ها را به سخره گیرند نقد کنند در برابرش بهیستند و برای تغییرش تلاش کنند. این نظم ساخته آنقدر برای جماعتی مقدس است که پاسداشت از آن وظیفه خطیر بر دوش آنهاست آنان نظم تازه ای و برای پاسداشت آن دست به هر کاری خواهند زد اما دیگر جهان دیروز و پیشترها نیست امروز نظم تازهی بر جهان است. نظمی که صاحب آن حیوان ابزار ساز است او برای همه کار ابزار می سازد شاید یکی از همان ابزارها سطح نورانی بود شاید نه از روز نخست که کمی بعدها از آن بهره جست از همه گیر شدنش استفاده کرد و نظم را به کرسی نشاند به واقع از هر ابزار کمک خواست تا هدفش را پیش برد آخرین جماعت که به کسب قدرت شهرند آنان که در سراغاز و بر تخت ها میدانند می دانند که ابزار وسیله است اما می خورانند که ابزار ارزش است می تا تاج و تخت مستحکم کنند و خیش از ابزار بهره می جویند یک بار به سطح نورانی دست میبرند تا آمال و آرزوها، تا باور و کردار، تا همه دنیای آدمیان را دریابند و به فراخور آن خوراک دهند. به فراخور آن نیاز بسازند و به فراخور آن کنترل کنند. یک بار انگ بزنند، یک بار رنگ بزنند و باری خاموش کنند. همگان را به ارزشی که به آن مبتلا اند. اگر صدایی آمد، اگر فریادی شنیده شد، راه تازه بسیار است آنقدر بسیار که به دستآویز هر کدام بتوان جماعتی را تا ابد خاموش کرد و حافظ این نظم تازه بود بازی آنان را به انگ دیوانگی، به رنگ تحجر، به سنگ تمرد و باری، به نظم، خاموشی و سکوت به تنهایی و دور از میدان به در اند. این جماعت دانستند که پیش از فقوع باید بر فریاد فائق آمد پس بیشتر حواس را جمع کردهاند، همگان را رسد می کنند زندگی در خفا و در عیانشان را همه چیز دنیای آنان را باید که شناخت و باید از پیشترها آماده ی هر حرکت آنان بود آنان اگر خواستند کاری کنند باید که به آنان پاسخ گفت و این نظم را حافظ بود پس این بار نه به شهر تنها شرطب و پاسبان که آنان هم خواهند بود. نه در خفا به معمور و معذور بودن که در دل و به ذهن آنان باید ترتیب داد. باید ساخت و دنیایشان را یک رنگ و یک صدا کرد. باید ابزار ساخت تا جهان درون آنان را نیز در بر گرفت. باید آنقدر آنان را مورد نظر داشت تا هرچه اگر خواستند را پیش بینی کرد. نظم دنیای تازه انسانها پیچیده و بزرگ بود، آنقدر بزرگ که همه جهانشان را در گرفته بود و هر ابزار رامی شد تغییر به راهی برای تسلط بر آنان قلم داد کرد. همه میدیدند و باز به روی خویش نمیآوردند. آنقدر از ارزش برای آنان گفته بودند که نسبت به هر چه فرایان ارزش ها بود ایزله بودند. آنان باید هر آنچه کردند که بر دنیای آنان آمرانه فرمان داده شده بود. آنان باید آن می کردند تا در این چرخه پیش پیشرفت گوی سمقت از یکدیگر را برو بایند و در این حیوان عبزار ساز بودند به بهترین آن بدل شوند. این نظم تازه جهان آنان بود و برای پاسداشتش همه ابزار در اختیار تا قدرتمندان آن چه می خواهند را به پیش برند. در میان این نظم ساخته انسانی پسرکی آرام به دور از آن چه در واقع بود واقعیتی بر ساخته را آرام سر می کشید و از آن لذت می برد. آرام به ندای سطح نورانی گوش می داد تا او را به ارزشها نزدیک و نزدیک تر کند در آن حال و در میان خواب و رویا از او ابزار سازی بسازد که از همه پیشی خواهد گرفت به فردا در این ارزش تازه قوته خواهد خورد و سرآمد همگان خواهد شد در همین ابنا محکم سطح نورانی را به آغوش می گرفت و می خوابید امروز در جهان ارزشها تازه و از نو سرآغاز شدند و این تجدد تازه بشری راه های در برابر آدمیان نشانده است کمی پیشتر از این دنیای تازه آنان کلام به میان آفردم و از کمی دور دست دنیای آنان را زیر نظر گرفتم. دیدم که چگونه این رعیت دیرباز ملت شد و بر جای حکومت تمامیتگرا دولت تازهی بنیاد کرد که از آرای این جماعت بیشمار تنفیز شود و بر برمسند قدرت تکه کند. حرکت توده های بیشمار را زیر نظر گرفتم و از این شکوه و تجدد به بخیشتم و دنیای آنان بالیدم اما باید باز هم به اندرون دنیای آنان گام نهاد باید بیشتر از پیش جهان آنان را زیر نظر گرفت و به دنیای آنان نزدیک و نزدیکتر شد باید آنقدر به آنان نزدیک شد تا دردها و آرزوهای آنان را دریافت. امروز قبله ای از آمال و آرزوها در برابر بشریت است رخت رعیت بودن را از انسان و انسانیت برکندند و دیبای تازهی بر تنش نشاندند دنیای از مشارکت و باهم بودن از همه پرسی و در کنار هم ماندن و چه سخت از داشتن و ساختن این دنیا این جاندار ابزارساز به خود میبالد بالد که لایق به بالیدن و با فروغ است اما باید که با هم به آن بیشتر نزدیک شد و آن را بیشتر از پیش دریافت. باید دید که چگونه خوراک بر آنان خورانده شده است. چگونه از هزاری ها عبور داده میشوند تا به آن چه بیاندیشند که باید بر آن اندیشید و بر آن خانده شده اند. باید دانست که در چه هزار تویی درآمدند و دنیا چه راههایی برایشان ساخته است. وای از این جهان تازه ها دیگر هیچ به مسابعه قدیم نیست همه چیز رنگ تازهی به خود گرفته و انسان دانسته که هم چگونه زهر را آرام سر می کشد. دانسته که اگر پیشترها جام شکران به قذب و در جبر خورندند امروز انسان راه تازه می خواهد. باز هم جام شکران سر خواهد کشید اما لطافت بیشتر طالبه است عرضش های دیربازان را باید از نو آغاز کرد باید رنگ و جلاه تازه بران کفت باید چهره عوض کرد و دوباره آن را به جماعت در برابر فروخت اگر طالب بر تحجیم آن بوده اند و آرام این خون سرد را بر جان آنان لقزنده اند چه آرام در رکهایشان جاری و ساری گشته است و از بودنش لذت میبرند. آن کسی که محکوم به بودن و تکرار است در ارزشی شناور است که این بودن در تکرار را باید که به از بودن و تکرارش باید که به خود ببالد و خیشتن را دور از هر پوچی در نهای هدف بینگارد و این سیمای تازه دنیای انسان هاست هر روز بر آنان خوانده می شود از شن و کرامت آنان یاد می شود تا بیشتر بدانند تا بیشتر قدر و منزلت خود را بشناسند تا بیشتر در این جهان تازه قرر شوند این انسان دیگر انسان دیروز و پیشترها نیست او تازه و از نو متولد شده است با سرشت و سرنوشتی در اختیار خویش، حال حق انتخاب در برابرش است چه تواوت بر آن هرجی نیست اگر تمام انتخاب در اختیار او نمانده است بر این پستی در خیش التفاتی نیست که آنان از درک چند گامی پیشترها فاصله گرفتند دیگران ناکجا آباد پیشترها در پیش رو نیست و راه تازه‌ای برایشان همواره است راه تازه‌ای تا در آن به خیشتن ببالند و بر سرنوشت خود سوار شوند باز می بینم و باز در خود تکشیده می مانم غمین و نژند به گوشه آرام گرفتم آخر تا به فراز راه ها رفتم آخر بالای دست ها را دیدم جهان خود ساخته آنان را در نور دیدم. دانستم که چگونه و از راهی به پیش می آیند. چگونه انان قدرت را بر دست میگیرند، چگونه به جایگاه انتخاب شدن می رسند و چگونه تمام پالایه ها را پشت سر میگذارند؟ گذارند وای که همه را دیدم از قدرت لاینفک زر باخبرم خبرم کاش دیدگان نمیدید و برای چند سباهی آرام می ماند. آرام می ماند تا دل و دنیایم برای چند سباهی به آرامش درآید هر آنچه گفته اند و بیشتر از گفته هایشان نشان داده اند را قبول می کردم. از حرکت با شکوه توده ها لذت میبردم بردم و میدانستم که آنان عامل تغییرند. نه هیچ قدرتی فراتر از آن. اما دریغ و افسوس، حیحات که دنیا آنچه می نماید نیست و امروز را ساختند و آنچنان نمایان می کنند که می خواهند تو ببینی. راز دانستن این دنیا در یافتن راه های آنان است راه در یافتن این واقعیت در درست دیدن است در امیخ شدن و ماندن است در فریب نخوردن و خواندن است باید بود و دید و بیشتر نزدیک شد باید از فقر این توده ها گفت بر آنان نزدیک شد باید دید که این قول هزار سر ثروت چه ها که نمی کند چگونه از دونان فرمان روا برون داده است و وامصیبت ها که باز هم داستان گذشته هاست دوباره فرمان و فرماندهان دوباره حکم حاکمان چرا آنگاه که بنیان این زشتی قدرت را دریافتند بر تغییرش جان نفشانند چرا خواستند تا دوباره آن را باز بیافرینند چرا دریچه را باز گشودند تا باز فاسدان به میانش لانه کنند ایوا که هر طریقتی پاک را به انجاز کشندند و در آن سرمست و شادمان به پیش رفتند دوباره همان داستان پیشترها از نو سرآغاز شد باز دوباره همان لالای پیشترها خانده شد خانده شد تا جماعتی را مست و مقموم به راه بخواند. باز ثروت به میان بود، باز قدرت همه را از پیش برد و جایگاه خود را نشاند باز آمدند و از هرچه در پیش رویشان بود بهره بردند تا جماعتی را اقوا کنند. وای که باز همان داستانهای های کهن در پیش روست گذشته جهانشان دوباره در برابر دیدگانم است، خلیفگان، سلاتین و پادشاهان نام عوض کردند و این بار به سیاست پای نهادند. سیاست آمد تا بازی کند، آمد تا تطهیر کند، آمد تا دوباره و از نو سرآغاز کند. اما همه چیز یکسان بود، قدرت بود و تاج در میان بود. همت بود، خواب در کمین بود، سکون بود و فعل را رو بودند. همه را مسکوت داشتند به هزاری از داستانهای خوش پیشترها باز دیدم و همه دنیای پیشترها در برابرم بود چه از آن دیر بازان کم شده است قدرت به تقصید درآمده است در کدامین راه و به کدامین مخصود وای باز هم همان پیش پیشترهاست باز هم همان داستانهای دیر و دور باز به ناله افتادند باز انسان را بدل به راه کردند و از آنان پیش رفتند تا قصب کنند تا قدرت را به چنگ آورند تا از همه چیز ابزار برای خیش بسازند دوباره ثروت در میان بود تا راه را هموار کند هر که از دایره داشتن این نعمت دور بود قدرت از جانش غریبه بود در سوی انتخاب جای نداشت و فراتر از آن اگر برخلاف راه معمور کز می کرد اگر راه به راهی دور دستر از نظم موجود داشت در هیته انتخاب نبود بیچاره آدمیان که باز به لعاب تازهی به میدان بودند تا انتخاب کنند و فرای این انتخاب که تغییر را کشته بود که پیشرفت را برده بود و هر بار تکرار راه پیشترها بود چه سرانجام در برابر آنان بود باز قدرت در اختیار یکی و باز بیداری سلاتین از قبرها باز همه چیز را به پیشواز خود بردند و باز تکه بر تخت ها زدند تا آنچه را می خواهند در اختیار داشته باشند و از تحمانده ها ببخشند به جماعت فرمان بردار در پیش رو صحف ها به پیش بود، همه در امتداد یک دیگر پیش می رفتند، هر روز از تغییر برایشان قصه ها می خاندند، به آنان کرامت می بخشیدند، آنان دارای حق و حقوق خانده می شدند و مالک بر سرنوشت خیش، هر روز بر این مسق شدگی پا می و جماعت بیشتری را در این اقواب دستان اغما می و این صفه طویل خوشرخص مسانه به پیش رفت تا از انتخاب آنان انتخاب کند تا از قدرتمندان و ثروتمندان انتخاب کند تا از آن سفره که برایشان گستردند بخورند و بیاشامند لیک اصراف نکنند تا به نظم آنان بازی کند و سراخر انتخاب شود آنکه به راه انتخاب بود او صاحب و مالک و پادشاه بود نه به تندی پیشترها که امروز جام شکران به هزاری رنگ و تم و بوی خوش مزیم بود و آرام سر میکشیدند. از مرگ لذت می بردند آنان که محکومین جهان نام داشتند چه بسیار که فریاد داشتند که خلاف جریان دریا شنا کردند و چه بسیار که آرام جام شوکران بردست سر کشیدند و از حرکت آرامشان جماعت بیشتری مرد آنان زنده بودند و اینان مرده کس دیگری جام را نوشید و کس دیگری آرام گرفت یک بار مردند و یک بار خابیدند یک بار اغوا شدند و یک بار به اغما رفتند و هر بار به چهره در آمدند فریاد را مسکوت داشتند که جهان تجدد ما جای این پرخاش نخواهد داشت این نظم نوین جهانی است این آن تمامیت و انتهاست و تخطی از آن سنگ حماقت در پیش خواهد داشت آرام بگیروان چه از آزادی برای تعریف شده را به جان بخر لذت به برکه ما همه چیز را از کمی پیشتر دانسته و به تو خواهیم داناند تو باید بدانی و در این برهوت لب نگشایی که هرچه در جهان است بر این نظم نوپای جهان سر خواهد سایید چه بسیار که فریاد داشتند چه بسیار که این آزادی را قول و زنجیر خواندند و باز چوب تکفیر در برابر بود فکر همان فکر پیشتر هاست اصل بی تغییر است راه ها عوض شدهاند؟ میدانی هیچ مخالفتی با ارزش قدرت در میان نیست باز هم همان درد پیشتر هاست که این بار رنگ تازه‌ای گرفته است همه چیز در حال نو شدن است پس باید ارزش‌های های پیشتر را به رنگ تازه به جماعت بیشمار خوراند باید جامع شکران را جلا داد باید عطر مست کننده آن نشاند باید آنچنان مدپوش کرد که مستانه سر بکشند که چوب دیروز نوازش امروز است اما همه چیز همان درد پیشترهاست. هیچ رنگ نباخته و باز تکفیر و انگ و ننگ در میان است اما نه سنگ که به تصویر و تفسیر تازه در ذهن های انسان ها. در آسمان قدرت گهگاه از پیش درها هم پیشی خواهند گرفت. دیگر نه فقط مردمان سرای خیش، نه فقط آدمیان در حصار بیش که جهان را میخواهند. صحبت از نظم جهان است صحبت از تسخیر جهانیان است میخواهند همه را به زیر پرچمی واحد درآورند سلطگران بر سر کارند قدرت را ربودند همه چیز را به دست گرفته و بر دیگران خواهند تازید. هر که قدرت بیشتری در اختیارش است خواهد توانست که مالک بر جهان باشد همه را به تسخیر خود درآورد، استثمار کند، مالک و صاحب شود، قصف کند و چهره تازه تری به خود گیرد پیشترها اهداف در پیش رو بود، رنگها یکسان و در برابر بود می غارت میکردند و می بردند. همه میدانستند که دشمن در برابر در برابر روست میدانستند اشغال شدند و جهان را می بلند لیک امروز دیگران روزگار پیشترها نیست امروز نقاب ها را یک به یک تغییر میدهند. پوستین تازه بتن میکنند دیگر لعاب تازه بر جان کشیدند دیوها را سرخاب میزنند و چهره دلبر بر آنان نشاندند. نمی نمیتوان بین آنان تفکیک کرد نمیتوان درک کرد کدامین دیو و کدامین دلبر پیش روست همه چیز را در خویش میبرند و میبلند برای آزادی پیش میآیند و همه را به اسارت درند و بیچاره اسیر که در تجسمی از آزادی اسیر و در بند مانده است برای حقوق و احقاق حقوق ابنای بشر به میان آمدهاند و وامصیبتا و که یک دیروز هزار امروز است یکی مرد و امروز هزاری به شکنجه درآمدند آمدن تا ریشه ظلمت کنده شود ولی دریغا که ظلم ریشه دواند و جای ظالم و مظلوم عوض شد دنیای امروز آدمیان جهان تغییر تمام صورتکاست همه چهره میبازند و از نو معنی خواهند شد تا بدرند و در حیبت آرام جانی چنگ و دندان بنشانند بر جان مست و مسخ شده پیشرو اقواشدگان طالب اقواگر نشسته آرام گاه قداره ظالم را تیز می کنند خود در این تکاپو راه می سازند تا او به قربانگاه در آید قربانی آرام در حالی که ربخند بر لب دارد به چشمان جلاد چشم دوخته و او را خویش خواهد خواند. منجیس یا جلاد هرچه هست آرام می درد و سرستن جدا خواهد کرد اما تا لحظه واپسین و حتی پس از مرگ هم قربانی در تشخیص جلاد و ناجی آجز است برای این سلطگری و برای این بازی شوم و پرنی رنج با سازمان تازه بنا خواهد شد اینان آمده تا در تشخیص جلاد و ناجی بیشتر همگان را به شک اندازند آمدن تا این جماعت را به مسخ نزدیکتر کنند و آرام برای قربانیان به لحظه آخر نجوا و لالای سرده اند آنان میخوانند و اینان مست به کام مرگ میروند و تا سرآخر بر این راه تازه پیش نهاده پای خواهند کوفت و از داشتنش به خود خواهند بالید حتی هم آنان که به تیغ سپرده شدند همه چیز چهره عوض کرده است همه چیز هر بار به چهره تازه‌ای بدل خواهد شد تفاوت‌ها از میان برداشته شده است این ماهیت جهان تازه آدمی است هر بار بر گوش ها خواهند خواند که همه چیز نسبی و هیچ مطلق نیست هر روز به گوش ها ندا خواهند داد که جهان در برابر ما متفاوت و کثیر است هر بار ندای پرداختن به سطح در گوش ها خواهد شد تا عمر را به فراموشی سپارند و هر بار های تازه به های گوناگون در برابر دیدگان به رقص در خواهد آمد هر بار هر کس که بخواهد در حیبت تازه‌ای به پیش خواهد آمد بیان که کسی از هویت واقع آن با خبر باشد جهان مجاز روبرو جای تبدیل است می توان به هر صورتک بدل شد می توان هیچ نبود و همه چیز شد همه چیز در برابر دیدگان است. همه چیز برای بدل شدن در پیش روست تا به هر آنچه میخواهی بدل شوی و هر آنچه میخواهی را به کذب واقع کنی در این دنیای وانفسای تازه هست آن سازمان که دافع از حقوق همگان باشد اما او هم چهره بدل می کند. گاه در برابر چیزی است و در باطن چیز دیگری است هر بار به شکل تازهی رونم آیان خواهد شد تا حرف تازهی بزند و فرای تمام اینها اگر روزگاری یک رنگ شد اگر خواست تا داد مظلومان ستاند چه در چنت خواهد داشت چه قدرت در برابرش است جز قدرت قدرتمندان تا دندان مسلح که همه چیز را به کام خود خواهند خواست پس هیچ راه در برابرش نیست جز ذکر مصیبت جز دادن خبر و هوشدار، گاه بازی خواهد شد گاه از او استفاده خواهند کرد و گاه خود با فراغ بال از استفاده شدن شادمان خواهد شد اما آنجا که فریادش داد مظلومانه است جماعتی را به دنبال جمع خواهد کرد تا برایشان ذکر مصیبت کند تا بیشتر آنان را به گریه وادارد و هر کدام این تشکلها که در عشق گرفتن و محکوم کردن ید طولایی داشت سرآمد همگان است همه چیز از آن او و برای اوست به بازی تازه آدمیان خوش آمدم خوش آمدم و هر بار بیشتر بر این دنیای آنان نزدیک شدم نزدیک شدم تا بیشتر دریابم در این حال و هوای دیگر برایم هیچ مهم نیست تا کسی مرا بر این کار واگذاشته باشد یا کسی انتظار گرفتن گزارشی از دیده هایم کند حال بیشتر از آن میخوام تا همگان را از این دنیای تازه ساخته بشری آگاه سازم شاید بخواهم تا آنان را به خود بخوانم به خیشتنشان امید بخشم و برایشان از روزگاران آرمانی سخن برانم باز شنیدم آنکه آرمان دارد چگونه به سنگ و ننگ و انگ رانده خواهد شد دنیای تازه آدمیان دنیای دور از هرچه آرمان است جهان تصفیه اندیشیدن هاست است که چارچوبی در برابر خواهد ساخت تا بران چه در برابر رویت است، بی اندیشی و فراتر از آن را به ننگ و انگ از خیش برانی که آرمان یعنی دور شدن از واقع یعنی رویا و خیال یعنی دیوانگی و جنون بر جهان اینان ارزشها تعریف شده اند و باید به پاسداشت این ارزشها رقابت کنی هر که از این تعریف ذرهی خیش را دور بینگارت متحجر است دور از تجدد و در هر بار که سخن از آرمان به میان بیاید خواهند بود بیشمارانی که به چوب تکفیر این تحجر مانده در دلها را دور کنند که بخوانند این راه مهم است آنچه واقع است همین جهان پیش روست و حال که اینان را میبینم و بیشتر به دنیایشان نزدیک شدم بیشتر دلم هوای آرمان و ایمان کرده است جهانشان مدفن هرچه چه فعل و خواستن هاست آمده تا مفعول به جای در آنچه حریم و حرمته است گام بردارند و از آن تخطی کردن چوب حماقت است انگ ندانستن و تجر است و باید در خیش و در گوشه‌ای گوشه ازلت را طلبید ارزشها ساخته شده و همه باید پاسدار ارزش های در برابر باشند همه باید آن را بدانند و برای پیشبرد همان تلاش کنند اما این ارزش ها چیست؟ چه خواسته و نخواسته ای دارد؟ بیشترش وام گرفته از روزگاران پیشتر است همان درسهای دیروز که رنگ و لعاب تازه برخیش دیدند و ارزش بعدی همان جاندار ابزار ساز است همان دلیل بقا و بودن آدمی همان که باید بر آن اشنه آن را بزرگ و بزرگ تر کرد و این ارزش تا همه جای دنیا آنان رسوخ کرده و همه چیز را به اسارت درآورده است آنقدر به اسارت خیش درآورده آورده که علم را مجذوب خود کند آنقدر به پیش رفته که علم خیش را در این وادی بیابد و برتری خود را در این راه متعالی ببیند علم میآید پیش می رود و همه دروازه های سعادت در این ارزش بشری را پیموده است آنقدر پیموده که جایگاه والای عالمان جایگاه قدوست دیر بازان باشد آمده تا هر آنچه قابل مصرف است را باز آفریند. آمده تا بی آفریند و خلق کند برای شرزش ساختن است و نه چه ساختن آنجا که باید بوم ساخت می سازد. که بیشمارانی در آرزوی داشتن آن چشم بستند بازار مصرف میفهماند که باید در این وانفسا بر این اصل پاف شرد و ارزش در برابر رو است انسان ابزارساز می سازد تا سعادت پیدا کند تا کام روا و رستگار شود پس علم جریبان درید آمده تا با تمام قوا بسازد بیافریند چه مهم این بین که فرجام آن بمب ساخته بشری مرگ هزار است که در این آفرینش و ساختن نهفته است شاید به دیربازی توانستند انسان تازهی بی بیافرینند و دیگر بودن و نبودن آنان از آن خود آنهاست مهم داشتن و ساختن است هر چه طالب داشت هرچه خواستند و هرچه چه می‌خواهند پس می سازند و ها با پیش می روند مالکانه بر جهان فخر خواهند فروخت که یک کتاز جهان هستی همین نوع از حیوان پیشتر هاست که راز تکامل خیش را دریافته است دانسته است که بقای او به واسطه ساختن ابزار هاست پس همه چیز را خواهد ساخت آنقدر خواهد ساخت تا در همه امور سرآمد جهان باشد ها ساخته شدند، پیش رفتند و جهان را دریدند، سوختند و آتش زدند، هر بار انفجار تازه‌ای در میان بود، و به فرجام شایدان آن پدید میآمد که با ضربتی تمام جهان هستی را به نابودی بکشانند. هر بار ساختند و هر بار به واسطه ساختنشان به ثروت و قدرت بیشتری چنگ انداختند. و ارزشها ها دوباره از میان همین داشته ها و نداشته ها ساخته و باز آفریده شد تنها به ساخت همینان اکتفا نکردند همه چیز ساختند هر روز بر ساختنش پافشاری بیشتر کردند آنقدر ساختند که در مخیله نادان ها نبود انگ حماقت و تکفیر تهجر در پیش بود و همه محکوم به عقب ماندگی که پیش رفت بر ساختن استوار بود بر بیشتر داشتن و بیشتر خواستن در گوشم ناله های بیشمار زوزه میکشند صدای ناله های حیوان را شنیدم در رنج عمر به سر میبرند و دردهایشان را کشیدم صدای ناله های کودکان به گوشم سنگین و دردناک است باز میشنوم و باز فریاد ها در گوشم تنین انداز است باید شنید باید درد برد که انسان آمده در این ارزش تازه والا و والا شود اما میشنوَم جماعتی را که از کمی پیشتر ارزش‌های دیگر را به پیش خواندند از مهر گفت از عشق گفت فداکاری و ایثار ترسیم کرد از هزاری گفت و هیچ نشنیدند تا به پیش برند که دلیل بقا را دانسته و خواستند تا همه چیز را از آن خود کنند قدرت باز همین نفرین انسانی در میان است باز برای کسبش از همه چیز خواهند گذشت و همه چیز را به چنگ خواهند آورد و برای بقاش جهان را به آتش خواهند کشاند و این نفرین به جان آنان و در کنار آنان زاده و پرورش یافته است و هر روز از جهانشان می مکت و هیچ از این بودن باقی نخواهد گذاشت در پی این هزار توی پردرد که هر بار در میان جان کسیری سر برآورد است، باید که جماعت بیشمار را بیشتر از پیش اغوا کرد. باید آنان را آرام و مسکوت نشاند. باید به آنان خوراند آنچه میخواهند. باید این ارزش تازه را به آنان فهماند و از آنان سربازهایی بازهایی برآورد که پاسار جهانشان باشد. فرای اینان این جماعت پردرد مانده در ماشین ها دور شده از هرچه عالم واقع در جان آنهاست باید که به احساس مزین و معطوف شود پس فرای هرچه در چنته دارند باز به دامان هنر چنگ انداختند باز از او طالب به میان آمدن و میانداری هستند باید آن را هم به کالا بدل کرد باید آن را هم فروخت و خرید، باید از آن هم ابزار ساخت و به جماعت بیشمار خوراند. باید آن را هم برای کامیابی ارزش تازه انسانی و ارزش های کههن ریشه دوانده به عصر خرج کرد و فروخت. پس قدرتمندان آنان که همه چیز را میدانند به پیش میروند و از هیچ فروگذار نخواهند بود. تا باز به واسطه داشتن این ارزش بشری هنر را به آنچه میخواهند بدل کنند و آنچه میخواهند را از او طلب کنند. هر روز یکی از هنرها به میانه بود، هر روز یکی برای بس ایده به میانداری می پرداخت، باری میآد تا تنها سرگرم کند. تا آنان را مست و اقوا کند، تا آنان را از جهان واقع در برابرشان دور کند و جماعت بیشماری که همه چیز جهانشان گره در این هنر تازه ساخته بشری داشت این اغوا و مست کنندگی را می خاندند، می و که شاد بر آن زنده بودند و برای دانستن سرشت و سرنوشت هنرمندی جام می داریدند. او به سحن روزگار می و جماعتی به رقصش مسخ آرام سر به پایین جهان می گذراندند او سردمدار می شد و خیش را مست دیده بود و جماعت دنبال روی او به مستی او مست میشدند و آنچه باید را می کردند گاه هنر را به ابزاری برای تحمیق ارزشها ها بدل کردند و هنرمند آمد تا آنچه گفتهاند گفتند را به تهییج احساسات در برابر بفهماند میگفت و چه آرام در خون و گوشت آنان می و به جانشان لانه می کرد می گفت و آرام آنان را مستخیش می ساخت که این هنرمندان همه چیز هنر را دریافتند و دانستند چگونه احساس را تهییج و ذهن را تحمیق کنند به ابزار بودن این هنر واقف شدند و آن چه باید را از دل آن برون جستند و چه سرامدانه به هرچه خواستند رسیدند هنر هر روز به رنگ و اشکال خاص در می و آنچه در برابرش خانده بودند را به پیش می بود. این حرکت حرکت دنبالداری بود که نه هماره به زور و زر و قدرت که گهگاه به باور و ایمان و ارزش خوانده به دل هنرمند پیش می رفت. او هم از دل همین جماعت هزار توی آدمی بود و آنگاه که از این تهیج تحمیق می شد خیشتن به بستان مبادرت می و هر روز به شکل تازه آن را میخواند خاند که بران ایمان داشت. ایمان خوانده را میخواند و همه میدانستند. در این نگاه و ارزش تازه جهان آدمیان هنر هم ابزار ساخته دست بشر بود و آنان که همه چیز را میدانستند میدانستند که چگونه باید از آن مدد بگیرند و جهان را به آن چه میخواهند بدل سازند. پس آنقدر در این هربه پیشی گرفتند تا صاحب و مالک بر همه چیز جهان شوند و همه چیز این جهان را به مدد خیش بردند و در بس این هنر تازه به میان آمده بران آن کوشیدند خیابان‌ها گاه شلوغ و گاه خلوت می‌شد گاه همه برای دیدن هنری در خانه آرام بودند و گاه در میان خیابان به شور می‌رقصیدند گاه از ارزشی دور و گاه به ارزشی نزدیک می شدند. گاه چیزی را فراموش و گاه چیزی را به خاطر می آوردند. و چه بسیار از اینان دیدم و به دیده ها این گونه سخت برآشفتم که این روزگار تازه آدمیان است باز در این سفر که در پیش روی من است در کنار آدمیان بودم و جهانشان را رسد کردم انقدر به آنان نزدیک شدم که دانسته هایم از آنان به گام تازهتری از جهانشان برسد اما حقا که باید بر آنان نزدیک و نزدیکتر شد باید به درون و بر جانشان لانه کرد باید از دنیای درونشان باخبر شد باید صدا و ندا و نجوای آنان را شنید که به چه ریسمان چنگ میزنند و بر چه آینده ایدل دل خوش گرده باید به گام بعدی بیشتری از سطح دو و به امق چنگ زنم وای که چه مصیبت جانگو جریبان این آدمیان را دریده است چگونه به طول این سالهای تازه برآمده از دنیای آدمیان هر بار و به طریقتی آنان را از عمق دو رو به سطح مبتلا کردن و چه دردناکانان هر بار از واقعیات به مجاز در آمدند و در این سرخوشی به اقوای اقواگرشان مستانه خندیدند اما من نباید به این مرداب جردایم باید از هرچه در برابر است دورتر و دورتر شوم. باید هر چه پرده و هجاب در برابرمان است را بدرم باید به روح و جان آنان رسوخ خونم و هرچه بر عمق آنان نوشته است را باز بخوانم که رسیدن به هر تغییر در دل همین تلاش ها است حال که شب تاریک و است دوست دارم به نزدیکی و در کنار یکی از همین آدمیان قرار گیرم دوست دارم برای چند سباهی به کنارش آرام جهانش را مرور کنم او دختریست نوجوان که آرام بر تخت خود لمیده است با سطح نورانی را به آغوش کشیده و مدام او را آرام لمس می کند آرام روی ماهش را نوازش کرده است و هر از چند گاهی آرام به گوشش چیزی می خاند. او هر روز مادر و پدر را می بیند که چگونه ساعتهای مدید را طی می کنند و هر روز از او و دنیایش دورتر و دورتر شدند همه را می و باز آرام به سطح نورانی چنگ میبرد. گویی گوی او طالب همه دنیا در دل همین سطح نورانی است از دل نور او می که همه چیز را دریابد هرچه را نمی تنها به اشارتی خواهد دانست و پاسخش در برابر دیدگانش خواهد بود آنچه باید را به او دانستند و عمق پیشکش همان جماعت همه چیز دانست میداند که پدر و مادرش سخت کار میکنند تا او هرچه میخواهد را در اختیار بگیرد هر بار و در هر ثانیه طالب چیز تازه است و میخواهد هر روز بر شمار داشتههایش افزون کند پس جماعتی میسازند جماعتی میگویند و سرآخر با سطح نورانی در دست چیز تازه ای را دخترک خواهد خواست برایش همه چیز جز گفته های آنان به جهان دور است هیچ مهم نخواهد بود اگر همه را یک رنگ به دنباله هم کشانده تا از انتخاب همه دانان کسی برگزینند. برایش بیهوده و بتالت است اگر به ساختن ابزار دریدند و جانها را بی سر انجام رها کردند ارزش باز بتالت جهان امروز است اگر صاحبان و مالکان و قدرتمندان هر روز بیشتر و بیشتر شدند و به فقر دیگران پربارتر شدند باز هم بیهوده و بتالت است که همه اینها و فرایان در برابر او هیچ نخواهد بود و یا او هیچ نخواهد دید حال هر بار سطح نورانی برای دختر آرام از سردمداری میخواند که چه زیبا آواز خوانده است چه دلبرانه رخصیده است، چه زیبا و با فروخ نشسته است و حال همه دنیای دخترک رسیدن به همان آمال آرزو در سینه سطح نورانی است که چهره را هر بار به چشمان او با نور خیش متساعد خواهد کرد میبیند و آرام در دل هزاری آرزوی بودن او را خواهد کرد و جهان و هرچه چه آن است برای سانیهی قدرت تلق زدن بر جان او را نخواهد داشت که ایمان پیش درها که آرمان جانها همه اگر به انگ و ننگ و سنگ رانده شدند چهرهای تازه برساختند و همه را به دل جماعت بیشمار زنده کردند اما به کام و به جان برای خیش که آرام بخوابد و آنچه آرزو کند که آنان از پیشترها خواسته و آرزو کردهاند کتاب اقوا اثر نیما شاه سواری بخش سوم باید بسازمش باید بتوانم با ساختنش جهان را به منزلگاهی تازه بدل کنم این حق در اختیار من است من توان ساختنش را خواهم داشت مگر نه اینکه برای همین کار پای بر جهان گذاشتم مگر نه اینکه این, این وظیفه را به دوش من نهاده‌اند مگر نه اینکه من جاندار عبزار ساز هستم پس باید در این ساختن‌ها از همه پیشی بگیرم و یکتاز این رقابت باشم باید مبدل به ابرجاندار سرای خود شوم وای که از تکرار این واژگان بر سرم آسی شدم لیک باید هر روز همه اینها را در ذهنم دوره کنم تا بتوانم موفق باشم باز باید به تعداد کسیر کتاب های خوشبختی و این راه کارهای بزرگ رسیدم به آرزوها خود را برسانم و از راهکارهای بیبدیلش مدد برم باید هرچه در برابرم است را ببلم و در این شور زار یک سوار باشم و بتازم ساختن این دستگاه جدید معنای بسیار در خود خواهد داشت خواهد توانست کار بسیاری را به جای انسان ها انجام دهد خواهد توانست تا کار بیشتری تولید کند باز در این چرخه تولید چرخها را به حرکت در خواهد آورد و باز همگان را به تشویق وا خواهد داشت از چندی پیش که در آن کارخانه وقت صرف کردم همه دل و دنیایم ساختن چنین ابزاری شد ساعتهای مدید انجام کاری به تکرار مرا به این راه واداش تا بیشتر فکر کنم تا بدانم که انسان جاندار ابزار ساز است کار او در ساخت ابزارهای تازه خلاصه شده است بیشتر از که بخواهد از بازو و قدرت خیش مدد بگیرد باید از قوه تعقلش مدد گرفته و ابزار تازه‌ای بسازد انگاه که برای ساعتی طولانی مجبور به انجام کاری دنبال دار و در تکرار بودم آنجا دانستم که زندگی برای است که این بهانه از حیات این دلیل بقا را بهتر درک کرده باشد گر نباید به دامن این زندگی رقتبار سرکچ کند و تابع آن باشد ما انسانی و در این انسان بودن باید که از همه پیشی بگیریم و سبقت ما از هم به ساختن میسر است پس باید دستگاهی بسازم که به ازای من هزاری کار کند. آنقدر بهتر و دقیقتر کارها را به پیش برد که هر صاحب کاری به داشتن آن مبادرت کند. این دستگاه تازه ساخته به دست من دیگر نه نیاز به خلا خواهد داشت نه خوراک می خواهد، نه از حقوق کم شکایت خواهد کرد نه سندیکا به وجود خواهد آورد و نه در پی حقوق از دست رفته خود خواهد بود. او هم به سیل بیشمار این ماشین های بشری در خواهد آمد و می‌تواند هر کار را به سادگی پیش برد و آنگاه است که از یک تای آن که من پدید آوردم هزار و میلیون به بازار خواهد آمد و من به جای همه آنها به ثروت و شهرت و منزلت دست خواهم یافت این وظیفه من است من هم راز بقای آدمی را دریافتم من هم دانستم که چگونه این دو پای کمتوان مالک به جهان شده است و حال نوبت من است تا این تاج را برای چند سباهی هم که شده به سر بگذارم و از داشتنش لذت ببرم باید بسازم من می توانم آن را به وجود آورم با ساختنش عمر ای خواهم جست و همه ناکامی ها را به فراموشی خواهم سپرد آری عمر دوباره من در میان همین ساختن هاست من مالک و صاحب خواهم شد و در این دریای بیکران انسانی خواهم توانست تا سری برون آورم و برای مدتی هرچند کوتاه و گذرا پادشاهی کنم امروز هر که در این سیر دوار ادعای پادشاهی کرده است از این ساختن ها به منزلت و مقام رسیده است از کوچک تا بزرگ خود را در این ورطه خواهند دید و من باید این ابر انسان ابزارساز ساز شوم و گوی سبغت را از همه برو بایم. پس جهان ندیده های در برابر از آن من است. آنقدر خواستم تا سرآخر توانستم به دنیای اینان رخنه کنم. به جانشان حلول کنم و دنیایشان را بیش از پیش بشناسم. من باید به جهان درون اینها ها رخ نمی باید جهانشان را در می نوردیدم تا بیشتر آنان را بشناسم و این گام پایانی به دیدن دنیای آنان بود نزدیک به جانشان، در دلشان، در میان افکار و باورشان و حال به آنچه میخواستم دست یافتم و زمان آن بود که به درون هر کدام از اینان که در برابرم بود حلول می کردم و کلام و فکر و باورشان را به زبان خیش پیوند می زدم تا بیشتر جهانشان را دریابم. باز هم همان روزهای تکراری و باز هم همان آسمان آبی. همه چیز از آن دیروز است و باز من محکوم به این بودن و ماندن تا چه زمان باید این گونه روزگار سپری کرد. من هم از ابنای همین موجود دو پای ناطق هستم آیا من هم از میان آنان غربال شدم؟ من هم جاندار ابزار ساز هستم؟ اما در من که هنر اینان نیست من کهتر و کوچکتر از اینان به دنیا آمدم اینان راز بقا را دانستند و توانستند هر روز ابزار تازهی بیافرینند و با ساخته هایشان هزاری از من و این جماعت کهتر از خود را از میدان بدر کنند آری اینها جانداران ابزارساز ساز هستند و من یکی از دنیای اینان لیک کمتر و بی ارزشتر از آنان چرا که در این راز بقا نتوانست خیش را تسبیت کند نتوانستم با اینان به رقابت بپردازم و گوی سبغت را از جهانشان برو بایم. و این گونه من و هزاری از من محکوم به شکست و نابودی خواهیم بود این جاندار تازه هر روز جهان و ابنای خود را غربال خواهد کرد و هر روز هزاری بیشتر از ما را به کام نابودی خواهد فرستاد تا آن کس که از همه لایقتر است به دنیایشان باقی بمانند و جهان را جماعتی مالک شوند که بهترین ابزار سازانند آری به جهان آنان دیگر جایی برای ما نیست ما از دل همینان بوده ایم اما به مثال دیگر جانداران که راز بقا را دانسته یا ندانسته نتوانسته اند پاسخی آن بگویند محکوم به مرگ و نابودی شده اند و ما نیز حال و در دنیایشان محکوم به نابودی و فلاکت خواهیم بود چه ارزش در برابر این جاندار تازه پای بر جهان گذاشته که ما گرسنه و اسیریم چه در برابر جان اینان که من و فرزندان و همسرم خانه و سامان نداشته و هر شب گوشهی بیغول کرده ایم. جهان اینان جهای ما را نخواهد داشت در این رقابت هر که توان مقابله را نداشت محکوم به مرگ و فلاکت است اگر کارهای ما را رو بودند همش از ارزه آنان بود اگر کارخانه ها پر شد از ماشین های تازه که همه جای انسان های دیروز را گرفت چه خیال همه چیز جهانشان بهتر شد و در میان آن چه ملال که چندی هم در میان جوی ها جان سپارند و بیمدد بمیرند اینها برای تصفیه ابنای بشر است اینها را کردن تا بهترین انسان ها به جهان باقی بمانند و جهانی پیشرفتهتر تر از دیروز به میان آورند دیگر هیچ ارزش جز اینان و دنیایشان بر جهان نیست چه درد که سینم پردرده است از دیدن گرسنگی فرزندانم چه ملال که هیچ جای کار برای این نادانان کمخرد و در جای ماندگان نیست همه چیز از آن آن ای خواهد بود که در این ساختن پیشی گرفته و یا به زرب آنان خوش رخصیدند اما دریغ من که راضی به رخصیدن هم بودم اما باز هم باید دوره کرد و دانست که زرب اینان همیشه و همواره نیست برای همه و در اختیار همه نیست آنانی را میخواهد خواهد که نبی میل به میل برای شنیدن صدای زربشان روزها ماهها و سالها جهان را در نوردند و به کام آنان خیشتن را فرو گزینند. همه دنیا بر درک و پوچی و نیستی که طفل از جان آمدم امشب نالان است امشب بی بی‌سرپناه و گرسنه است چه بر جهانم خواهد بود آنجا که او را به غم ببینم آنجا که او را به درد ببینم ای کاش مدید سالیانی در پی زربشان بر آمده بودم ای کاش همه عمر به ساختن بر آمدم و از آن شانه خالی نمیکردم و ای کاش به دل هزاری از این ای کاش ها مانده و حال هیچ به دنیای واقع هم نیست همه در مجاز است هیچ از واقع دنیایمان من به جایی نمانده و باز باید در خود و گریست با این دریای کاش ها جهانم را احاطه کرده است و کاش توان آن بود که همه را پرپر پر می کردم کاش می توانستم تا دوباره از جای برخیزم و دوباره از نو سرآغاز شوم اما دریغ و افسوس که همه دنیایم را بلیدند این جماعت هزار رنگ هزار روش همه جهانم را خورده و از پسماندش زرهی مهمانم کردند. باز باید به پشت شیشه های پرتم تراخ برای ذره منزل کنم تا ببینم چه آرام و بیگ آن کاری را می کند که من هیچگاه قادر به انجام آن نبودم. این ابزار ساخته به دست وشر چه آرام کارها را بینقص انجام میدهد و دم بر نیاورده است. نبیاد چشمان کودکش است نناله های همسرش در گوشش تنین انداخته هیچ به دل نیست و آرام و دقیق کار خواهد کرد خسته نیست و حال من به دستانش به عضلاتش، به افکارش به دنیایش چشم دوختم و در این چشم دوختنها خواستم تا لاغل او باشم تا حداقل دقل او زنده باشم اما من از این ابنای بزرگ جاندارها زاده شده و حال محکوم واماندم باز باید شبی را به سرما صبح کرد و به زیر برف و بوران زنده ماند که اینان راز بقایشان در ابزار ساختن بود و شاید بقای ما در ماندن و ایستادگی هر بار که به جان کسی خلول کردم هر بار که جهانش را در نوردیدم باز شمع تازه از جهان آدمیان در برابرم نقش بست باز آنچه از پیشترها دانسته بودم افزون شد و باز خواستم بیشتر ببینم من آمده بودم تا جهان آنان را زیر و زبر کنم من آمده بودم تا همه جهانشان را بشناسم و حال با این نیروی برجانم بهتر و ملموستر همه جهانشان را درک خواهم کرد پس باز پیش رفتم و باز به چهره تازه بدل شدم این بار سیمایی که با شکوه و عیان همچون مالکان گام بر می داشت باید برای به سامان رساندن این کارها باز هم کارگران ای استخدام کنم اما وا مسیبت از این مردمان بی وجود که هیچ نمی فهمند و ادعایشان گوش هفت آسمان را پر کرده است وای به جانشان که هیچ برای انجام ندارند و در عوض دریای از مدعا به چنگال گرفتند ای کاش از این ماشینهای های بیشمار که نابغه های کشور ساختند برای ما هم آبی گرم می کاش دستگاه های تازه پدید میآمد تا از شر این موجودات لاجان خلاصی آبم باز هزاری مشکل و موزل خواهند داشت باز برایم شکفای خواهند کرد که چرا غذای من کم نمک است چرا کرایه راه ما را نمی دهید؟ چرا حقوق افزایش نمی آبد؟ چرا به من کمکی نمی کنید؟ باز مرخصی میخواهند؟ باز جیر و مواجب میخواهند که برای مدتی کار را لنگ بگذارند؟ ای نفرین به آنها که قوانین کار را نگاشتند؟ هیچ به فکر آزادی ما نبودند اگر کاری انجام نشود من از کجا پول خواهم آورد که شکم این درماندگان را پر کنم آری اینان با شکم‌های سیر قانون مینگارند هی کاش هر چه زودتر از شر این نابخردان خلاصیابم باز هم نیاز به تولید است باید تولید کرد و باید بازاری برای فروشش فراهم کرد باید آنقدر تولید کرد و ساخت و فروخت که همه چیز را مالک شد. باید باز هم کارگر جذب کرد. باید هر روز در پیش بردن دنیایم همت کنم. در این چند سال گذشته اینجا را چند برابر کردم. اما حال نیاز است تا های بیشتری پدید آورم. باید آن را در سطح کشور و نه در سطح جهان پیش ببرم. آنجاست که خواهم توانست با خیالی راحت و به دور از هیاهو چند سباهی آرام گیرم باز فرزندان و همسرم از من طلب خواهند کرد باز چیزهای تازه خواهند خواست هر روز چیز تازهی نقل مجالس است نشانه برتری است. باید همه را برایشان فراهم کنم باید هر آنچه به فکر دارند در اختیارشان باشد باید بیشتر و فراتر از خواسته را در اختیارشان بگذارم و برای فراهم کردن تمام خواسته های آنان هم نیاز است تا چرخه این ساختن تونتر و روانتر بگردد ای دریغ و صد افسوس از این اقبال کوتاه و بخت سیاه من اگر برای این ساختمانگاه ما هم ماشین ها ساخته بودند من مجبور به پرداخت این پول های هنگفت به این نابخردان لاجان نبودم و می پول بیشتری پس انداس کنم می توانستم با سرعت بیشتری تولید کنم و سراخر این امارت را چند پاره کنم ای ننگ بر این بخت سیاه من این لاجانان هم پول می خواهند و هزار خواسته خواهند داشت و هر روز در طلب چیز تازهی خواهند بود این نابخردان چرخ حرکت این ماشین پیشرفت مرا کند و آرام خواهند کرد باید بر این چرخی تولید افسود باید آنقدر آن را زیاد کرد که همه چیز را از وجودش اشبا ساخت. باید آنقدر پس داد که همه را در داشتنش سیراب کرد. باید تشنه گذاشت و باز برون داد. باید آنقدر با این جماعت بازی کرد تا سرآخر پیروز شد و این است تفاوت دنیای این نابخردان با آن میداند و میتواند و حال باید به قضاوت نشاست. که آیات حق با این لاجانان است که ادعای برابری می کنند و یا حق در اختیار آنانیست که راز بقا را در و در آن از همه پیشی گرفتند باز صدای دنبال دار همسرم به گوشم زنگ خواهد زد باز از من خواهد خواست تا برایش جواهر تازهای بخرم آری باید برای او آن لباس حریر و آن شال ابریشم را تهیه کنم او با دیدن آنان به وشت خواهد آمد و شاید اگر بتوانم امشب از آن نان جو هم بخرم و شب خوشی را پیش ببریم چند روزی است که مدام دخترم در تمنای آن نان جو قصه ها گفته است فکر می کنم آن را در دستان یکی از هم هایش دیده بود امشب باید آن را هر جور که شده بخرم برای رسیدن به آن مغازه چند کیلومتری راه است او از آن مغازه خاص دوست داشت تا تحییش کنم آری باید خود را به آن مغازه برسانم درست است که خیلی ها از آن نان دارند اما او طالب آن نان به خصوص است برای رسیدن به آن مغازه باید دو اتوبوس عوض کنند و آن نان خاصه را باید به مبلغ چند برگرد جان انسان دریابم اما آیا داراییم برای داشتن آن نان و کرایه راه تا آنجا بس است؟ باز باید دوباره دوره کنم چقدر از آب در میآید؟ خریدن آن نانجو آه که چقدر از صدای زنندهاش بیزارم باشد کار را به اتمام خواهم رساند حال چند ثانیه می خواهم که فکر کنم وای که این جماعت مفتخارگان به خیال خود با دادن چند تکه از جان آدمی همه دنیای ما را مالک خواهند شد حتی فکر کردن اما خوب راستم همین است آنان چند تکه از جان آدمی را هدیه می دهند و شاید همین تکه ها آنان را مالک بر جان ما کرده است آنان مالک شدند و باید که بتازند آنان در این صاحب شدن گوی ها را از هم خواهند رو بود این تکه های جان انسان در اختیار هر که که باشد همو مالک و صاحب است و حال که این مردک مفتخار شکنبار مالک هست. پس آنگاه که امر می کند هیچ در برابر نیست جز درماندگی ما او می و ما باید به رخص در تا اگر شده تکنان جوی به پیش منزل بریم و آرزوی کوچک کودکان را اجابت کنیم آنان میزنند و ما می رخصیم. اگر نرخسیم جهانشان آنقدر دریده است که جهانمان را ببلد و از آن هیچ باقی نگذارد حتی همان نان و یا فراتر از آن آرزوی داشتن آن نان جوه. حال که آرزو در جان فرزندم نمرده است حال که او آرزو میکند من هرچه در توان دارم را به خرج خواهم داد تا برای او به دست آورم پس باید برخسم و آرام گیرم باید هر روز را مثال یک روز پیشترها بگذرانم باید از همه آرزوها و دنیای خود دست بکشم باید برده شوم تا شاید فرزندم در دیر سباهی آزاد بود باید رد تازیانه را به جان بخرم باید داغدار شوم و همه بدانند که بردم تا شاید در دیر سباهی به قدرت همان نان جوه دخترم پاره تنم دیگر برده به مثال من زنده نبود این دنیای انسان هاست باید در آن به یاد خیشتن بود باید خیشتن و خانواده را دریافت و حال که من آنان را و بیشتر از آنان جهان را دریافتم می دانم که دخترم باید ابزارساز قهاری شود باید به بازی بقای اینان در باید همه چیز را در اختیار خیش بگیرد تا به جهان در پیش روح مالک و صاحب شود باید او بر انسانی ابزار ساز شود تا دیگر این خفت را به جان نخرد با صدای کشتار مردک مفتخار به گوشم تنین اندازه است باز آمرانه به صدا آمده و طالب رخصیدن من است باز دوره می کند هر روز و تکرار گذشته راه و برای من هیچ راه به پیش نمانده جز خاز به رخص در آمدن این راه در برابر دیدگان من است باید برایش آرام به رخص سرایم تا او به آنچه در دور دست ها به دل پرورانده است، دست یابد یک تای این امارت راه به ده بدل کند و جامع را از ده به هزار و همینگونه به دریای آرزوهای خیش غرق بماند و لذت جوید و من باز همان تکنان جو در برابرم است که باید دوباره به دل هزاریان را دوره کنم که اگر امشب از تکه جان آدمی چند تکهی خرج کنم و خود را به دانجا برسانم آیا خواهم توانست تا آخر این ماه دوباره کل خانواده را بی و بی روی شرمسار به پایان راه برسانم آری خواهم توانست باید که بتوانم باید آن چرا به دل کوچک خود پرورانده است به او و در برابرش نقش ببندم اما ای کاش به میان آن تکه از نان جوه هزاری درس نهفته نه بود ای کاش هزاری سه و جادو مانده بود که اگر او از آن اکسیر میخورد همه جهان اینان را در میافت میدانست که جهان امروز آدمیان و راز بقایش در چه نهفته نه است ای کاش به او آنچنان توانی میداد تا در این رقابت همه را به کناری زند و به فردایی در دوردست دست به جایی بنشیند که این مفت خارگان نشستند آری دوست خواهم داشت که تخت اینان به چنگال جماعتی از همدردان خیش درآید. این جهان امروزی انسان هاست نه باز هم هم انسان بوده و هر بار در این چرخ دوار رنگ ها عوض کرده ایم و به اشکال تازه در آمدیم. اما به بنیان هیچ تفاوت به دنیای ما نماند که از همان دیرباز هم طالب قدرت بودیم و تنها خواستیم جایگاه قدرتدار را عوض کنی وگرنه ما را چه به کار ریشه قدرت و برکندن آن از زمین و زمان که امروز اگر موفخاره شکمباری بر آن تخت قدرت تکه زده است فردا دختر من هم خواهد توانست آن جایگاه را قبضه کند که اصل ماندن و بقای ما در همین بودن و خواستنهای ماست دل به گوش دادن اینان سپردم و هر بار همه چیز دنیایشان را شنیدم حال دیگر از جهان خود هم غریبم حال دیگر هیچ از جهان خود نمی دانم و شاید به چند سباهی بیشتر و در برابر دیگر هیچ از دنیای خودم باقی نماند به شکل همینان در آمدم اما هرچه که در پیش رو باشد هیچ توان نخواهد داشت که مرا از دیدن و لمس جهان اینان برای چند سانگهی هم دور کند من باید به جهان اینان بیشتر از قبل هم که شده نزدیک شوم و باز باید به سیمای بیشتری از اینان رخ نکنم تا حقیقت جهانشان را دریابم و با سیمای تازهی در برابر من است او که مشکوک و مرموز راه می رود به دل و در اعماق فکرش هزاری نگفته ها خواهد داشت که همه را برای من به اعماق ذهن سپرده است تا یک جاه جهان او را بشناسم هر کدامین این آدمیان خواهند توانست است که این نظم ساخته را به تباهی و جنون برسانند اینان همه توانایی این کار را خواهند داشت پس باید بیشتر و بیشتر به آنان نزدیک شد باید همه اینان را در نظر و از زیر نظر گذراند. باید آنقدر به آنها نزدیک بود که اگر کوچکترین اشتباهی کردند قبل از حاد شدن غذایه آن را چاره کرد. این نظام مقدس بدین سادگی سربر نیاورده و هزاری سال جانفشانی انسانها را به خویشتن یدک کشیده است. پس نباید در برابر این شکت و جلال مسکوت ماند و حال که این وظیفه به دوش من است باید که جهان را در نوردم باید هر زشتی در برابر را به پیش و روی گیرم تا کسی از جایگاه داشته یا نداشتهش برای تخطی و از میان برداشتن این نظم مدد نگیرد چه وظیفه‌ای در جهان امروز از این وظیفه خطیر شاید آدمیان به طول تمام این سالها از بودن من، از دیدن من، جانشان پرنفرت شده است شاید از شنیدن من و کارهایم دیوانه شده باشند اما آنان به دل و در اعماق جانشان و فراتر از آن در حقانیت جهان به من مدیونند. آنان در برابر من خرد و حقیرند که من دافع از جهان و نظم در آن هستم. من آمده هم تا ریشه هر خرابکاری را برکنم و نگذارم این ستونهای پرقدرت این نظم نساخته بشری به ذلت فرو افتد. پس آنان دانسته و ندانسته به وجود من مدیونند و در برابر من باید که سر تعظیم از خشوع و خضوع را پایین بیاورند. حقا هزاری از اینان به هزار ابنا در حال خرابکاری خواهند بود. هر کس در لباس و چهره‌ای می که این نظم را برهم زند، می‌خواهد تا نظم تازه‌ای برون آورد و مخل این آسایش تازه انسانی باشد، باید آنان را دریافت باید آنان را از این جهان دور کرد که اینان مخل روزگار ما هستند اما جهان به مصابه و به مثال کمی پیشترها نیست دیگر نمی توان آنان را عذاب کرد شکنجه داد ساعتها به کار اجباری مشغول داشت اعدام کرد و گردنشان را زد که نظم تازه ما عبور از تمام این زشتی هاست این دربوغ و کرنا کردن ها زشتی است نباید همه را مطلع ساخت نباید به همه گفت که باید تنها پاسبان نظم تازه بود باید از میان برداشت اما در خفا آنجا که نه کسی بداند و نه تواند که بداند اگر زهره چش پیشترها گرفتند و به گردن زدند جماعتی را خاموش داشتند این نظم تازه محتاج چنین نمایش ها نخواهد بود حال آنقدر نمایش و ساز و آواز در میان است که همه را بتوان اقوا کرد حال ابزار اقوار را هم جاندار ابزارساز ساخته است و دیگر چه نیاز به این دستاویز های پردهشت و دیوانوار. حال شناخت ارزش است. باید از دل این هزاری آدمیان آنان را دریافت. از آنان آنچه میخواهیم را بشنویم، بشناسیم و باز به راه روی هزار توی شناخت پرسزنیم و سرآخر به ریشه ها، شکوفه ها و میوه ها برسیم و آنان را دریابیم. و آنگاه جانان را دریافتیم زمان کندن است، زمان حرس است، این باغچه بزرگ جهان برای روحیدن بهتر نیاز به حرس خواهد داشت. باید هرز بارگان را دریافت و از ریشه خوشکاند، باید این هرزها را از میدان بدر کرد تا دوباره و از نو جان بگیرد شکووف انقلاب تازهمان. اما امروز روزگاران پیشتر نیست. امروز در خفا و مسکوت میشناسیم، آرام به پیشوازشان می رویم و آرام آنان را از جهان و بودن ساقت کرده ایم از آنان هیچ به میان نخواهد آمد شاید گاهی به ابزاری آنان را بزرگ کنیم و در بزرگی و شکوه این علف های حرز را بچینیم شاید نیاز به بازی تازهی بود تا باز از آنان مدد بجوییم و هرچه راه و طریقت در پیش باشد را در و از هیچ ملالی نیست که باید به با آن که بنظم به نظم این جهان دست یابی. هر هر زباره که در برابر است محکوم به نیستی و فناست این نظم مقدس است برای این نظم هزاری جانبازی کردند و برای ماندنش ما باید جانبازی کنیم برای رسیدن به دروازهای تازه بیروز از تمام این زشتی ها برای دور شدن از این نظم جهانی باید جانبازی کرد و از هیچ حراس نداشت باید همه جای جهان را درنوردید و به همه هشدار داد باید گفت و هزاری به آنها خواند که چه کردند با دنیای بیجان جان و رنجور ما وای که چه بلای بی شماری به جان این جهان آوردند وای که چگونه تمام جانهای آن را به خودخواهی و خودکامی در خود کشتند و به لاشههایشان رقص شادی کردهند وای که از جان مادر و پدر بزرگمان از طبیعت هیچ باقی نگذاشتند و آن را به لجنزاری بدل کردهند همه کار کردند و جهان را به کام خود فرو بردند ای ننگ بر این ریشه افکار پوسیده و پوچ که هر بار به لباس تازه دوباره نشخار همان دردهای پیشتر بود وا مصیبت‌ها که هیچ از جان و جاندار بودن باقی نگذاشتند همه را به انقراض و نابودی به تباهی و فنا پردند که خیشتن مالک شوند این اشرف پیشتر، این خلیفگان دورترها همه ی پیش را دوره کردند تا دوباره در لباسی تازه به مدد از ابزار نوین دریای در برابر را غنیمت ببینند و شنا کنند شنا کنند و همه را به اعماق دریا و دل اقیانوس غرق کنند مالک همه شوند و هر چه جان را هست از میان بدرند وای چه به تاز ارباب پیش بود برده در ما سرا مانده بود باز همه چیز بوی گذشته را میداد این نظم تازه ساخته از دل همان قبرستان های پوسیده گذشتگان است و باید که در برابر این زشتی جانگوداز ایستاد و برابری کرد باید ایستاد و جنگید باید تا آخرین قطره خون در برابرش ماند حال که هزاری پاسبان در لباسهای گوناگون در نزدیکی خیش آوردهاند، حال که به هزاری ابزار ما را در خیش نگه داشتند، حال که همه جهان ما را غبزه کردند، حال که بر همه دنیای ما سایه انداختند، نباید در خود ماند و در برابر آنان نیستاد و تسلیم شد، با همه ی آن چه کردند و کنند جان من یگان منجی من دست نخوردنی خواهد بود او باکره ی زمان است آزادی بی همتا در دلهای من لانه می کند می و به دور از هر زشتی باز فریاد میزند و باز او را در می آبی. آخر آزادی با ما زاده شده است و به جان من زیسته به طول ایام با ما مانده است حال من در اتاقی که همه جایش سپید رنگ است در آمدم. هزاری برایم آوازها خواندند نه چون پیشترها شلاق نزدند شاید صدای درد و شلاق را پخش کردند شاید سوزاندند لیکن آنجا که دیده نشود شاید درد دادند حتی بیشتر از پیشترها اما کبود نکردند شاید سوزن منو که انگوشتانم بردند که دردش همه جانم را در نوردید اما با انور ناخونهایم را نکندند آخر دستان بیناخون را دیگران هم خواهند دید. هر چه کرده و نکرده اند سبب خاموشی فریاد بدل نشد و هیچ توان خاموش کردن آن را نخواهد داشت که این یگان منجی به طول هزاری سال به قلب یکاییک انسانها زنده و بیدار است فریاد میزند و باز می خواهد که برخی زند. باز می خواهد که برخیزند باز میخواهد که هرچه به زشتی ساختهاند را فرو ریزد و باز یگان منجی در حال خواندن نجوا به دل هزاری آشق آرام مانده است تا روز پرواز این جماعت بیشمار را به نظاره بنشیند او میخواند و ما به ندای آن پرواز میکنیم بال در میآوریم، آنجا که شکنجه می کنند همه دردها را برای داشتنش از یاد بردهیم آنجا که از جهان دورمان می کنند باز به جهان می آییم. آنجا که می کشند، باز زنده می شویم و باز به میدان آمدهیم آنها آمدن تا بکشند و بدرند و از میان بردارند و ما آمده این که و مقاومت کنیم آمده ایم که بجنگیم و به میدان بمانیم آمده ایم تا هر ناب را از میان برداریم و جهان در رویا را زنده کنیم آمده ایم تا آرمان بسازیم در این جهان مرده به آرمان ها در این جهان کجی و زشتی دوباره آرمان بسازیم به آرمان زنده شویم و برای آرمان و هدف و آرزوهای من بجنگیم و جهان را بدل به ایده ها کنیم باز می خانند. مدام به گوش همگان از یأس و نامیدی خاندند باز گفتند بحث را زمینی کن از زمین به خیال و آرزو را بکش و از جهان و نظم واقعش به آنان میگویند و دوباره ناله ها برای یأس به دل آدمیان زنده خواهند کرد لیکن ما زنده این تا باز آرام به گوش همگان بیدار کنیم آن احساس والای درونمان را آمده این تا به حس رهایی جانشان تلنگور بزنیم آمده این تا آنان را به این معرفت بر جانشان نزدیک و نزدیکتر کنیم که جهان در دل آرمان پیش روی ماست وای که تا حد یک پارچه و بیدریغ و مدام تکرار میکرد آنقدر به دل و جان سخن داشت که هزاری ساعت نیاز به بماندن در جانش بود به بودن در دنیایش بود لیک او را آرام چیدند او را آرام بردند به دریا انداختند شاید غرقش کردند شاید به سوزنی آرام آرامش کردند شاید به مایه جانکاه به فنا رساندنش هرچه کردند دیگر او نبود و صدایش نمیآمد. یکتا نبود و جهانی به مثالش آرام چیده شد و کسی ندانست که چه سرانجامی داشته است گلی که به عطرش جهان را می تراوید چیده شد وای که داشتن این حق من است من باید آن را تصاحب کنم باید آن را به دست گیرم باید آن را در کنار هزاری از دیگر داشتهایم داشته باشم باید مالک آن هم باشم و باید صاحب بر آن بر جهان فخر بفروشم چه چیز فراتر از داشتن آن چه چیز با اهمیت از بودن آن این دیگر نصدای یکتن که هزاری از انسانها بود به جان بسیاری از آنان لانه میکردم و هر بار در سیمای تازهی باز میشنیدم آن نقل تکراری را یک بار جوان بود و باری پیر یک بار زن بود و باری مرد یک بار کودک بود و یک بار هرچی که بود تفاوت چندان به دنیایش نبود و با حرص و ولع به پشت یکی از آن ویترین های پرتم ایستاده همه دنیایش کسب یکی از آن ابزارها و کالاها بود گاه پشت ویترین بودند گاه با نگاه به آگهینماها نماها گاه آنجا که در برابر جعبه جادو مات مانده بودند مدام همین جملات را به دل تکرار می کردند و گاه در آغوش سطح نورانی مدام با زجه و لابه همان داستان کمی پیشتر را دوره می کردند نه به جنسشان بسته بود و نه به سالشان نه به جایگاهشان و نه به پیشگاه و برابرشان همه مدام تکرار می کردند. آن حق من است باید آن را به دست آورم و مدام خیش را به حق تازه در برابر نزدیک و نزدیکتر می کردند در طول مسیری که از کمی پیشتر برایشان هموار شده بود خود را به پیش می بردند و در آرزوی رسیدن به آخر این مسیر پر پیچ و خم به راه می افتادند. گاه لازم بود تا خیشتن را به ذلت و خاری بکشانند که میکشاندند. گاه لازم بود تا طلب مدد از دیگری کنند که میکردند. گاه نیاز بود تا کار کنند که با جان و دل می کردند گاه تا نیاز به دو زیدن بود که باز هم سر به پایین میانداختند و میکردند راه رسیدن مهم نبود که این مسیر از کمی پیشتر هموار شده تا اینان در آن گام بگذارند و به پیش روند آنان راه میرفتند و در این مسیر در برابر از یکدیگر پیشی میگرفتند تا بیشتر در اختیار داشته باشند و آنچه حق به آنان نمایان شده است را در آغوش بگیرند گاه سطح نورانی تازه‌ای بود گاه ابزار تازه‌ای که کسی ندیده بود گاه چیز ای که سالیان آرزویش را داشتند اما رسیدن به آن هرچه که بود رسیدن به تمام آرزوها بود آرزوهای تازه ساخته شده آنچه از کمی پیشترها گفته بودند که مبدل به آرزو شود ساعتها به آن فکر کرده بودند تا این آرزوی تازه را بنا کنند بنا شد به آرزوی بیبدیل حقی در برابر و خواسته همیشگی اینان حال که در این راه پرپیچ و خم درگیر به پیش می رفتند, می رفتند تا آرزوی در برابر به آن چه احساس خوانده بود دست یابند و باز کمی دورتر خواستن تازهی گریبانشان را بگیرد و این قوه محرکه خوبی بود که بیشتر آنان را به این سیر دوار عادتمند و اسیر سازد و از آنان آنچه بدل کند که در سر و به ذهن آن بالان است نه تنها این خواستنها فکر و حرف مشترک هزاری از آدمیان که به جانشان حلول کردم نبود که باز بیشماران دیگری در آرزوی ساختن، در آرزوی بیشتر فروختن و بازار کسب کردن از یکدیگر سبقت گرفتند این فکر اصلی و ورد زبانشان بود. مدام میخواستند، باز بسازند، باز بفروشند، باز در آرزوهای خیش قوطه بخورند. باز همه چیز به تکرار کمی پیشترها به جریان درآید. آدمیان بیشماری که در آرزوی داشتن میسوختند و هرچه به دوششان محول بود را میکردند و آدمیانی که آرزو برای اینان ساخته و می آنچه نیاز برای گردش این چرخ دوار بود اینان به تحریک هم هر بار به چرخاندن این چرخ پولادین پیشرفت رفت مبادرت کردند و هر بار در این وانفسای رفتن و در جاماندن تکرار همان لابه های پیش در را کردند در جای نماندند پیشرفت رفت کردند و باز هم گوی سبغت را از یکدیگر ربودند به هر قیمت که بود سبغت در هر چیز که برایشان ترسیم شده بود آنان پیشرفت کردن که باز هر روز و هر بار همان تکرار گذشته را تلاوت کنند آنان پیشرفت کردن که هر بار و در جسم هر کدامشان که رسوخ کردم باز همان قصه های به تکرار را ندامت کنند آنان هر بار همان حرف های پیشتر را گفتند و فکر در دنیای همان گذشته ها و تکرارها داشتند باز فروختند و باز خریدند باز آرزو ساختند و باز آرزو کردند به دست آوردند و از دست بردند و همه چیز به ندای آنان به هول خیش چرخید و ادامه کرد لیک من باید که میدیدم و دوباره به جانشان حلول می کردم من برای چنین کاری برگزیده شده‌ام مرا از خیلی پیشترها به چنین وظیفه‌ای گماردند و این وظیفه است بر دوش من آری من برگزیده هستم حال که این برگزیده شدن را از سوی آدمیان تنفیز شده می دریایی از کارها در برابر رویم است. سالیان مدید برای رسیدن به چنین جایگاهی رنج بردم و تلاش کردم تا سرآخر در چنین روزی چنین جایگاهی را تصاحب کنم. حال که به این مهم دست یافتم باید هرچه در تواندارم را به کار بندم تا هر آنچه از پیشترها در آرزویش ام را تصاحب کنم. این آدمیان درمانده نیاز به صاحب و پیشرو خواهند داشت. آنان که قوه تمیز دادن خیر و شر در خیش ندارند و من این قوه را در خود پروراندم پس باید آنان را به دنیای خیر و خوبی راهبر باشم. چه هزینه های هنگفت برای به دست آوردن این جایگاه کردم. چه هزینه ها که لازمه رسیدن به این جایگاه بود؟ چه سخنرانی ها چه تبلیغات ریز و درشتی تا اینان را یک پارچه کنم به صف دوستاران راه خود درآورم و حال که با هر هربه به این مهم فائق آمدم روز روز تغییر است باید دگرگونی ایجاد کنم این تغییر چهارچوبی خواهد داشت درست است که توان من برای تغییر ها محدود است درست است که نمیتوانم تغییرات بنیادیم به وجود آورم درست است که اگر ثروت اما شده در اختیار معدود کسانی است و بیشمارانی به اسارت در قدرت تغییر آن را ندارم اما من هم به همین نظم مدیونم باید حافظ چنین نظم بر باشم من به این نظم نوین جهانی مدیونم و باید در پاس داشت این نظم مقدس کوشا باشم باید برای به سر و سامان رساندنش و همه گیر کردن آن تلاش بیشتری کنم باید آنچرا صلاح این جماعت بیشمار است به کار ببندم آنان صلاح خیش را نمی دانند و نیاز دارند تا رهبرشان آنان را به این مهم برساند آری این وظیفه خطیر رساندن آنان به خیر و راستی بر دستان من است باید جهان را یک پارچه به چنین نظم تازهی آشنا کنم باید در بست آن بر سراسر جهان کوشا باشم و این نظم چند صد ساله را به کرسی بنشانم جهان ما نیازمند داشتن چنین نظمی است. وای که بیزارم از این همه بر ساخته های تازه جهانی از این بازی ها و چند رنگی ها. چرا باید برای تصاحب جایگاهی که از خیلی پیشترها برای من ساخته شده بود برای به کردن این جامعی که برای من دوخته شده بود تا این حد تلاش می کردم تا این حد دست به دامان ریا و نگرنگ می شدم این گونه وعده به دروغ و ریا می دادم من در این بازی خود را غرق دیدم تا چیزی که از آن خودم هست را تصاحب کنم چه کسی لایقتر از من در جهان برای رسیدم به چنین مسندی؟ اما باز هم دلمشغولی نیست. حال دیگر هیچ دقدقه ای بر جای نیست که هر آنچه برای من بود را یک جا تصاحب کردم. حال دیگر در کنار ثروت هنگفتی که داشتم قدرت را نیز تصاحب کردم. هران کس که صاحب بر قدرت و ثروت شود صاحب بر جهان است و فراتر از آن من امروز صاحب جانهای بیشمار هستم. صاحب بر سرنوشت بیشمارانی که همه چشم به دستان من دوختند آنان هیچ نمیدانند و باید در رسیدن به این کمال و خوشبختی به آنها مدد رسانده شود باز باید با آنان صحبت کرد باز باید به آنان از آن عراجیفی که دوست دارند تحویل داد و باز باید در نقاب نقش تازهی فرو روم که آنان طالب شنیدن همین سخنان هستند اما باید خیشتن را تا همان حدی که خبرگان میدانستند در این وادی درگیر کنم و آنچه فراتر از آن است را به کار بندم تا اهداف بزرگتری را سامان بخشم. در جهانی کردن این نظم تازه بکوشم و جهان را از داشتن این نعمات از داشتن این نظم تازه برکت بخشم. ای مردمان دانا و همه چیزدان، شما نیز می‌دانید که ما همه مدیون به بزرگی این نظم تازه جهانمان هستیم ما همه مدیون همه خواهی و این نگاه به جمع انسان ها هستیم پس سوگند می‌خورم بر این نظم مقدس تازه جهانمان که جهان را در این نعمت بزرگ غرق کنم او گفت و جماعتی در دل آرزوها کردند نه تنها در همین حوالی و در نزدیک آن سخنرانی که خیلی دور دست ها آنجا که از این نظم کمتر دانسته بود و یا از آن چیزی نداشت و مردمانی که آرزوی داشتن چنین نظمی را بر دل پروراندند از آن روز و از آن سخنان چقدر گذشت سالی، ماهی و یا حتی شاید روزی که مردمان آرزومند در دور دست ها و در همین نزدیکی پذیرای توپ های آتشین شدند بوم ها خانه هایشان را میهمان آتش و درد کرد تا از نظم تازه به آنان نیز خورانده شود و همه از داشتن این برکت تازه بهرهمند شوند او در بالای این قلعه ایستاد و فرمان به نظم و همه گیر شدنش در جهان داد و مردمان آرزومند با نگاهی به آسمان جرقه ای از نور دیدند که کمی بعدتر به جهانشان بتابد و دنیای آنان را نیز از داشتن این نظم تازه روشن کند اما دریغا که این نور آنچنان تابید که بیشمارانی کور شدند و دیگر نتوانستند ببینند یا آنان که بودند دیگر نبودند تا ببینند مهم نبود که کسی ببیند یا نبیند مهمان بود که جهان دید و فهمید که نظم نوین جهانی در حال بلعیدن همه جهان در خود است باز زمان انتخاب پرارسیده است باز باید خوب را از بد شناخت باز باید یکی را برگزید که شایستگی بیشتری دارد اما کجا توان تمیز دادن این دو از هم در اختیار ماست به سخنان پرلابه آنانی گوش فراده هم که به کل این بازی مشکوک اند آنان که سخن از انتخاب میان بد و بدتر کرده اند و یا باید دل را به دریای آنانی بسپارم که با همه خوشبینی و شادی و شعف در آرزوی رسیدن به چنین نظم تازه ای از جان و دل و دنیایشان گذشته اند باید گوش به کدام این ناله ها بسپارم. اما حقیقت عیان در پیش روست، هر روز و مدام در حال تکرار شدن است مگر میتوان به حقانیت که در اختیار اکثریت است گوشت فرانه داد. آنگاه که هزاری در پی راهی افتادند مگر میتوان بر خلاف جهت حرکت آنان به حرکت در مگر نه اینکه باید هماره همرنگ جماعت شد. این رنگ خوشی است که آنان به هزاری آزمون و خطا تشخیص دادند. داشتن رنگی به رنگ همه برکت دانستن است این جماعت بیشمارگان مگر نه این که بسیار می‌دانند. آری راه شناخت راستی و حقیقت در پی بیشتر دیدن هاست در پی بیشتر شنیدن هاست باز زمین و زمان بران شدند تا نام تازهی را برایم باز خوانند و من باید به تکرار آن را به دل فراده هم من که می‌دانم؟ من که از دل همین جماعت همه چیزدان هستم آنان هم از کمی پیشترها دانستند حال که در دیوار شهر یک صدا نام کسی را فریاد میزند. حال که در خواب و بیداری، در پسو، در آشکار و نهان مدام نام منجی تکرار می شود. حال که رنگ همه آدمیان همه چیزدان همان نام منجی است مگر می به این حقیقت واقع در برابر دیدگان پشت پازد همه و همه نام همان منجی را فریاد میزنند. آنگاه انگاه که در خلوت نشستم باز شمایلی از منجی تازه جهانمان در برابر دیدگانم است درایت در ایستادنش از سخن گفتنش کمالات از همه دنیایش سرازیر است. باز به سخن ایستاده و مدام سخنانش به رنگ ها و تب مختلف به گوشم آشناست از دل هر چه جهان امروزه است لب به سخنگو شده و با کلامش سهر خواهد کرد نام او را خواهم شنید آن بیشمار دیگران خیشتن هم به کهتر بودن خود رضا داده اند حتی آنبار را به خاطر دارم که یکی از رقیبان ناجی چگونه خود از درایت و بزرگی او سخن راند مگر ممکن است از دل این جماعت بیشمار که همه چیز را می حقیقت را در نیافت نه تنها همینان نبودند از معشوقه قلب تا هنرمندی که آمده تا جهان را به جای زیباتری بدل کند تا آنکه هزاری نقش و تصویر به جای نهاده همه و همه نام منجی لقلقه زبانشان است آنان ما را بشارت می دهند هزاری آمدند و هر بار و هر روز روزی هزاران بار نام این یگان منجی را ذکر می کنند و حال زمان ذکر اوست برای رهایی از هرچه درماندگی است چگونه بی تصویر می کند ناب سامانی ها و دردهای دنیایمان را چگونه هر بار تلنگر می‌زند به این جانهای خسته که مرهم در اختیار هموست او میگوید و ما چه آرام به لالاهای امید بخشت زنده می و چه راهی جز همین که در برابر دیدگان است او می او می خواهد و خواستش به معنی رهایی ما از چنگال همه درت هاست اما نمگر کمی پیشتر آن ناجی دورترها هم از دردها گفت هر بار راه کار داد و به سراخر هیچ از پیش به پیش نبرد و امروز روزگار فلاکت ماست اما این جماعت همه چیزان حتی خود ناجی که از کارهای کثیف او گفتند گفتند که او خود را در رش تازه رنگ داد و این رقابت میان آنها که علنی و قابل رویت است هویدایان است که آنان گفتند. اما چرا در آن پیشترها آنجا که او از دردها گفت مثل همین امروز و چه بسا بیشتر پس از چندی همه دردها به فراموشی سپرده شد؟ و دیگر حتی یک بار هم از آن سخنی به میان نیامد باید تمام این رخت های کهنه را به دور انداخت باید از نو دوباره سرآغاز شد مگر ما مثال نادانان در گذشته وامانده ایم. امروز روز تازه است و این بار ناجی تازه ای سر برون آورده تا این جماعت درمانده را نجات دهد این تعداد بیشمار که هر روز از او می‌گویند، این در و دیوارها این صدا و سخنان از او این حمایتهای بیشائبه بیشماران که بیشتر از ما می‌دانند، از او و این هزارتوی توی بیپایان همه و همه به ما فرمان داده است که خیر را از شر تمیز دهیم و به دامان منشی تازه چنگ بزنیم که راهکار برون رفت ما از همه مصیبت‌ها حقا وجود پربرکت اوست فردا روز انتخاب است روز برگزیدن ناجی که جهان نام او را می‌خواند در این حلول بر جان‌ها هر بار به چهره‌ای برمیآیم و برای چند سباهی به درد و فکر‌های او جان سپرده‌ام و این دالان هزار توی بی رقبت بخواستم هر بار مرا در لباس انسان تازه‌ای درآورده است گویی باید از آنان بشنوم و هیچ دنبر نیاورم باید همه دنیایشان را گوش فراده هم که شاید نزدیک تر شدن به دنیایشان در دل همین گوش ها خلاصه شده باشد خسته و درمانده شدم از این آوارگی از این خانه بدوشی تا که سرنوشت من در این آوارگی رقم خواهد خورد تا که باید این گونه و در این شرایط روزگار گذرانم آیا من محکوم به چنین درماندگی بودم؟ نمگر این دنیای تازه، این نظم نوین برای احقاق حقوق من فریادها برآورده است نمگر هزارانی که هر روز و هر بار از حقوق ابنای من دم زده اند پس آنان و دنیایشان کجاست؟ نمگر من لایق به زندگی خانده شدم و درگاهی از این خانه های امن آمده تا زندگی به من دهند نمگر جان و دنیای من در خطر است از آن سرزمین دورها ها آمدم از آنجا که دور از نظم همینان است از آنجا که هر روز خطر مرگ جهانم را به لرزه می انداخت. آنجا که داغ شلاق تنها نوازشگر جانم بود نمگر مرا و تمامی ابنایی همچون مرا لایق به زندگی دانستند نمگر همینان سخن از نظم ای زدند که در آن کسی زیر بار چنین ظلمی زندگی نگذراند نمگر من به لالاهای شبانه همینان دلخوش گردم ترک دیار گفتم تا از آن حق که آنان گفتند زرهی نصیب و منصب یابم اما حال چه سرنوشتی در انتظار من است چه به دست آوردم جز خفت و خاری جز محکوم بودن، مرا هر بار مجرم خاندند یک بار در آن سرای دور از نظم همینان گفتم که به هزار انگ و سنگ رانده شدم که هر بار به سیاه چالی منزلم دادند هر بار برای زدن زربه ای آماده شدند و آنچنان زدند که دیگر نتوانم بایستم و بر جای بمانم اما حال که از آن سرزمین دورم اینان به نظم تازهشان به حقوق خواندهشان که به روزگارم میهمان کردند به اردوگاه منزلم دادند آنان مرا هر بار از روز نخست مجرم خواندند و خواستند تا خلافش را ثابت کنم باز هم همان داستان پیشترها بود باز هم از همان دردها بر گوش همگان خوانده شده بود همان حرفهای تکراری کمی پیشترها هیچ تغییر نکرده بود در سرزمین دور و در نظم نوین هر بار من متهم بودم نه فراتر از آن من مجرم بودم و باید در این بیدادگاه ها خلاف آن که مرتکب نشده را ثابت میکردم آری باید انسان بودنم را ثابت میکردم چه تلخ و اسفناک میخواهند ثابت کنم که در روز روشن بر آسمان خورشید است شاید من لایق به حق خوانده اینا نیستم اما نه این یکتایی بر جهان نیست در این اردوگاه بر اردوگاه های هزار بر جهان هزاری چومن هر روز در این دردها و فراتر از آن سوخته و مجبور به ساختنند انگار همین چند روز پیش بود با دردش به جانم لانه کرده است باز برایم ذکر مصیبت می کند با چشمان آرزومندشان در برابرم است و به جانم چنگ می زنند چگونه تومه دریا شدهاند. چگونه دل و دنیا و امید و آرزویشان را سوار بر قایقی کردند و به آب زدند رفتند تا زندگی را در کمی دور دست ها در نظم تازه آدمیان بجویند و وا تا که سهمشان مرگ بود و ناکامی چند کودک تلف شدند و باز هم همان سؤال در هاست باز هم اثبات کردن خورشید در آسمان هاست چه فراتر از این که این جماعت به تنگ آمده از سرای خود کوچ کرده اند حال باز باید از نوع خود را بگویند بگویند که در آسمان خورشید است و آن را با دست به جماعت نشان دهند باید به پیش روند در آسمان چرخ زنند و سرآخر در آتش خورشید بسوزند تا شاید از این جماعت نظم دهنده از این جماعت حق را خواننده کسی دید که خورشید بر آسمان است شاید از طلوع آتش جان یکی دید که خورشید بر آسمان است شاید جان مشتعل او نشان داد آن خورشید در آسمان ها را باز هم لابه ها همان لابه های است باز زمین و آسمان به تنگ آمده یک بار چه ذکر مصیبت می کنند باز دریا تومه تازه دیده است و باز اینان دریا را فرا خوندند تا از این بیشماران ببلد که به نظم تازهشان جای برای همگان نیست این نظم برای جماعتی است دستچین شده و باقی محکوم به نظم در دورترها خواهند بود باید چشم آسمان بدوزند به همان خورشید که کسی بودنش را در نیافته چشم دوزند و به دل هزاری آرزو کنند. طالب جهان تازه و نظم نوین باشند و سرآخر کسی که فرمانده این جهان و نظم تازه است خوش ای از سعادت خواهد فرستاد که همه ببینند و با خورشید آن را اشتباه بگیرند. و سرانجام انگاه که آرزو به دل می آرام چشم ببندند و دیگر نبینند دیگر نباشند و به نظم در دور دست هاده یابند. باز خورشید بر آسمان است باز خوشه های بیشمار در آسمان به سر بیشمارانی در حال فرود است اما آیا این خوشه های آتشزاه جانگ و داز، اینان واقعند؟ آیا خورشید در آسمان واقع است؟ نکند ما به جهان مجاز زندگی. باز هم همان اخبار بیشمار از دردها و رنچای هزاری آدمیان بیشمار. باز هم هزاری از همان خوشه ها و به آتش کشیده شدن جانها. باز هم همان نقل به تکرار پیش ولی واموسی و سیبه تا که این بار رخت دوست کردند. این بار در لباسی آراسته آمده تا سرها را بدرند این بار برای بس هزار عناوین قدسی آمده اند تا به سبب آزادی و برابری اصارت و تبعیض بنشانند و حال کار من در این سازمان چند پاره چیست در این سازمان هزار توی که هزاران اناوین را به دوش می کشد هزاری بر خود نهاده است و گویی راه گوشای کل جهان هستی خواهد بود وظیفه من در این سازمان چند باره به عنوان بخش کوچکی از آن و یا فراتر از آن چیست حتی اگر رئیس و بزرگان بودم چه اختیار داشتم هر روز برایم از جنگ های تازه می‌گفتند. از هزاری خوشه ها که به سر بیشماران ریخته است مرگ داده است و به نام نظم تازه جهانی به نام آزادی و برابری هزاری را به کام مرگ نشانده است به صودای ثروت و به استثمار آمدند با لباس آزادی مهمان شدند و خونابه می دوشند. باز خبر رسید هزاری را کشتند سر بریدند جنگ کردند نسکشی به راه انداختند و باز ادامه داشت بیخانمانان، دردمندان آوارگان جنگ زدگان و همه آمدند تا پناه بجویند و همه در آب و فلاکت و درد و خون مردند باز هم گفتند آنقدر گفتند و ادامه دادند که خون گریه کردند و به آخر این دردها چه خواهد بود چه اختیار به جان ما که جهان در دست قدرتمندان و نظمداران است آنان میکشند بعد به خون تهارت میدهند به مرگ قوس و باز تیه و طاهر بر عرش نشستند و ما باید باز هم زکر مصیبت کنیم باز باید ناله و لا به سر باز باید جماعت بیشتری را به گریه درآوریم و برایشان از دردهای بیشمار جهان بگوییم. باز دلم هوای گریه کرده است در این بدبختی و مصیبت در برابر. باز میخواهم گریه کنم، اشک بریزم و برای بیشمارانی از دردها و اشک‌ها بگویم. اما هم همه که این گونه درد ندارند. چه بسیاری از آنان که به نام آزادی اسیر از کرده از همان دیف سفتان در محفل و جایگاه ما لانه کرده برای خیش از این نمد کلاه ها بافتند و چه آرام بر جنازه های آنان دیباب تن می کنند از تمپوش دردمند آنان برای خود لباس سوک تهیه کرده و با خون آنان تنشان خونی شده ذکر مصیبت می کنند به سراخرش دیبای ساخت از همان قاتلان که از کمی پیشتر به آنان فدیه داده شده بود بر تن می کنند و دوباره نقش تازه‌ای خواهند کشید وای بر این ریا و که بازی امروز جهان آدمیان است چه تفاوت به دنیایشان همان کارهای پیشتر است و شاید که شنیتر و زشتتر از آن روزگاران دیر اما این بار آدمی بران شده تا در این هزار توی مخوف خیشتن را به هزاری رنگ درآورد. هر روز بازی تازه‌ای به راه بیندازد و هر روز در خاموشی و مخفی نگاه داشتنش از زیگران پیشی بگیرد. این بخش تازه جهان آنان است. اینان آمده تا تطهیر کنند هرچه در جهان است به مثال دیربازان پیش برند و بدتر از آنان کنند اما این بار با رویه خوش و تازه با تمی مطبوع و دلچسب غذای متفن را مطبوع می کنند و به خرد بیشماران خواهند داد تا از تمان لذت برند و حال وظیفه من در این جهان زشتی ها چه خواهد بود آری شاید باید آرام برای این بیشماران ناله سردهم و ذکر مصیبت کنم بیشمارانی را محکوم کنم که دست بر صفره همانان دارم و آنان هم به این بازی ها سرمستند که ممری قدرت و ثروتشان همین بازی هاست. پس باید آرام گیرم و باز ناله ای بیاموزم که دردهای این روزهای جهان هر روز بیشتر است نوح سرای تازهی میخواهد آنکه بیبدیل بتواند هر روز نوحه تازهی بخواند، باید در این حرفه بزرگ و بزرگتر شوم که امروز وظیفم همین مدیه سرایی و روزخانی هاست در این وانفسای حلول بر جان آدمیان توانستم به جانی فراتر از انسانها نیز دست شابم در این جهان تازه آدمیان که مالک و صاحب بر جهان آدم بود از دیگر جانداران خبر بسیار در دست نبود و نمی توانستم بسیار از جهان آنان ببینم باید ریزوی می شدی تا از آنان می جستی. باید بسیار به جهان نزدیک و نزدیک تر می شدی تا از آنان در می آفدی. حال دیگر صاحب همین انسان بود و همه جای این کره خاکی را تصاحب کرده بود اما برای دریافتن این سیل بی از جانداران بیشتر به جهان نزدیک شدم تا سر آخر یکی از آنان را دریافتم و توانستم به جان او هم حلول کنم او در جای دور از زادگاه و طبیعتش منزل داشت او در چنگال آدمیان بود در فضای سرد و بیروح در مکانی سفید و بی جان که بی هر بار بر جان او دقیق می تا شاید چیز تازه ای از او دریابند بالاخره توانستم تا به جهان جاندار دیگری فرای انسانها دست یابم و به آنان نیز رسوخ کنم. حال روزگاران بسیار است که در این اسارتگاه به بند درآمده‌ام. این جماعت بیشمار از جانهای دو دوپا هر روز مرا به مدخلی برده تا بر من آن کنند که میخواهند. نمیدانم چه دورانی است. که اینان یک کتاز جهان حسی شده اند. به خاطرم نیست که چند سباهی است اینان تاج بر سر نهادند و مالک این جهان شدند. اما با آمدن همینان به جهان و در دست گرفتن قدرت بود که جهان ما رو به افول و تباهی رفت. اینان آمدند و هرچه به دنیا بود را مالک شدند. این بزرگترین خصلت ها به جهان همینان بود. اینان از همان روزگار نخوص به صدای تصاحب زنده بودند. آن چیز که به جهان دیگران فرای این جان دو راه نداشت. اینان تمام خاصه را در مالک شدن نهادند و هر روز مالک بر جانی به پیرامون خود شدند. هرچه نزدیک و سهل بود را نخوص بار مالک شدند. حیوان تومه راحتی در برابرشان بود پس او را صاحب شدند. مالک بر اون نشستند و از گرده های بیتوان او تا هر آنچه خواستند کار کشیدند آنقدر کشیدند و بردند تا این جان دردمند از پای در آمد. روزی خواستند تا بارها را به پیش برد پس گرده بیتوان حیوان منزلگاه بارهای بیشمار آنان بود روزی خواستند تا از جان و تنشان بدرند و بنوشند پس جانبی ارزش حیوان جایگاه دشن داره بود روزی خواستند تا پوست و تنشان را دیبای جان خود کنند پس پوست حیوان کنده و آویزان در برابرشان بود باز خواستند و باز کردند و هر بار بر این مالک شدند پای ها کوفتند و مالکان در جای دورتر از جانها نشستند و بر همگان فخ فروختند آنان تشنه بر صاحب شدن بودند هر بار مالک بر جانی در پیش رو یک بار مالک حمله خود شدند از او بردگی و اسارت کشیدند و به طول همه عمر از دیر کنون هر بار به چهره ای از این مالک شدن لذت ها آنان دیوانه این احساس درونشان بودند. آنان مستانه در پی جستن رودی بودند تا این اتش مالک بودن را سیراب کند. به سرچشمه آن رسیدند و هر روز از آن نوشیدند تا بیشتر و بیشتر مالک شوند. مالک بر جان زخم دار طبیعت آنان خیش را مالک پنداشتند. تفاوت جهان ما با این جان دو پا در همین مالک بودن بود. ما خیشتن را بخشی از جهان دیدیم و خواستیم تا بران زندگی کنیم اما این دو پایان خواستند تا مالک بران آن شوند بس درخت‌ها را بریدند طبیعت را آتش زدند مالک بر زمین شدند و هر آنچه خواستند پیش بردند حال که به دنیای این دیوانگان سر و رو بردم چه کوچک و ناچیز است مالک بر جان من شدنشان آنان به همین احساس زندند و هر بار آن را در چهره تازه می‌پرورانند. آنان برای مالک شدن حاضر به هر کار خواهند بود جان خویشتن را هم خواهند درید هم نو هم جان و هرچه در برابر است را به خاک و خون خواهند کشید تا مالک باشند و حال در این وانفزای مرا هم به بند درآوردند تا هرچه خواهند بکنند و مالک شوند تا سوزن بزنند تا آزمایش کنند تا رفتار مرا زیر نظر بگیرند توجیهشان عمر بیشتر بشر بود زندگی بی دردسر بود و یا هرچه که هزاری نام و آوازه آن است اما هم همه میدانستند و خیشتن همان را تکرار کرده بودند که آنان خود را مالک جهان و جهانیان پنداشتند پس چه سود و ارزش جانهای بیشمار دیگر که مالک بر جهان خواهد خواست و هر چرا که بخواهد بر پیشگاه و بر پای او خواهد بود. در برابرش به خاک خواهد نشست که او مالک است او خود را مالک پنداش و جهان در برابرش به خاک نشست تا او مالکانه به هر که می خواهد دست یابد در این جهان مالکانه ی آدمی چه ارزش و اعتبار این جان که هزاری از این جان و جان بخش بر جهان را دریدند برای پیشبرد زندگی آدمی نیاز است تا از این جانهای بی وجود بهره برد باید که از آنان مدد گرفت تا این جان با ارزش، این جاندار ابزارساز به جایگاه والای خود دست یابد، عمر بهتر و یا بیشتری داشته باشد هر درد و رنج، هر بیماری و عذاب از جان او دور باشد که او اشرف و مالک بر جهان پیرامون خیش است او کرامت دارد وجود او دارای ارزش و اعتبار است و این جانهای خرد و بیمایه که جهان را پوشاندهاند باید شاد باشند و بر خود ببالند که بر این اشرف و بزرگ جهان جان خود را تسلیم کرده و به او مدد می رسانند آنان که به خودی خود هیچ ندارند و نتوانند هیچ بر جهان بیافزایند. زندگی سراسر تکرار و بیمانی را ادامه میدهند، بی بیان که چیزی بر جهان افسون شود این هزاری از حیوانها هر روز می آیند و میروند و وجود ناجودشان هیچ بهره به جهان نیست چه از این با ارزشتر و والاتر که این جانهای بیوجود توان آن را داشته باشد که در این چرخه دوار زندگی آدمی به طول و کیفیت عمر بشر مدد برسانند و بر آن افسون کنند حال که جان خودشان بی اهمیت و پوچه است بگذار تا با همان جان بی ارزش جان با ارزش تازه‌ای، چو انسان این اشرف جهان را بهبود ببخشند تا او بسازد و جهان را در نوردد من باید به این مهم جامعه عمل بپوشانم این یک حیوان و هزاری دیگر از آنان چه سود که اگر من عمر تازه‌ای به جهانیان عطا کنم شاید از دلش یک تا جهان را دید که موجب فایده بر جهان شد جهان را بیشتر به تسخیر آدمی درآورد و قدرت او را بیشتر به اثبات رساند آنجا شاید جانبی ارزش این حیوانهای بیشمارم ارزش پیدا کرد حال که زهرهی کشنده به جان این حیوان بیفایده و ارزش داده ام، حال که او درد می کشد و با زج پس از چند سباهی جان خواهد داد شاید بتوانم این درد را از وجود آدمی دور کنم و برای او جهان تازهی بسازم این وظیفه خطیر من است و این حیوانات باید که از این سرنوشت حتی به خود ببالند به بودنشان در کنار انسان، به مدد رساندن بر آدمی، بر خویشتن به و خیشتن و وجودشان را منشأ فایده بی هرچند که وجود و ناوجودشان بی فایده و بی مناست. با تمام بیمنایی و بیفایده بودن حال که سم تمام وجودم را در نوردیده است حال که با هر نفس کشیدن درد را بیشتر بر تمام جانم اطراک می کنم حال که نفسم تنگ و همه دنیا بر سرم یکسره فرو ریخته است حال که میدانم آدمی خیشان را مالک بر جهان و جهانیان می پندارد، تنها طالب لحظه در آغوش کشیدن جفت و همسرم خواهم بود حال تنها طالب لحظه‌ای در کنار فرزند بودنم خواهم بود. حال میخواهم تا حتی شده برای یک بار دیگر نوازش‌های مادرانه را به جان بخرم. حال میخواهم از نفس معشوق برای ثانیه‌ای سیراب شوم. اینان مالکند و صاحب بر جهان، به قدرت ادراک و خرد بر جهان صاحب شدند و وا که همه چیز جهان را از یاد بردهند. عطر عاشقانه دوست داشتن را استشمام هوای بودن را پرواز در آغوش یار را نگاه بر چشمان فرزند را قد کشیدن و راه رفتن دلبند را همه را از خاطر بردند نفس کشیدن و زندگی را هم از خاطر بردند اترگل های بهاری را از یاد بردند سرمستی حاصل از دیدن درختان را از یاد بردند پرواز و دویدن را از یاد بردند یاد گرفتن و آموختن را همه و همه زیبایی جهان را از یاد بردند هیچ برایشان از دنیا باقی نمانده است جز همان زندگی در خفت و تکرار همان ساختن و صاحب شدن به سرانجامی نامعلوم و گنگ، حال که درد همیه جانم را در است حال که میبینم این جماعت دوپا چگونه از زیدن رنج من به سر زوغ می آیند. شاید از آن که دریافتند درد کدامین بود و یا درد دادن جان من دریافتند چگونه علاج کنند درد دیگری را اما از یاد بردند درد بر ها را همه را کالا دیدند پس خریدند و فروختند شاید چند سباهی دیگر شاید هم همین امروز کسانی پیدا شدند تا خیشتن را بفروشند تا درد ببینند و این طالبان این خریداران آن کنند که در دل دارند با جماعتی که خیشتن دانسته خود را فروخته و در کمین دردند باز هم هزار توی بی کران دیگری، با سری بی انتها, با پایانی نامعلوم و باز تکرار همه دردهای پشت سر. باز هم همان لالاهای دردالود پیش درها، حال که درد از اولانم راه بی حرکت و منفعل بر جای گذاشته است. شاید برای چند سباهی آنجایی که چشمانم را بستم آنجا که دیگر درد از جانم رخت برکند و مرگ به خانم میهمان شد چشمان او را دوباره دیدم نوازش هایش را دوباره لمس کردم شاید باز هم به جانم زبان کشید و رخت تمام دردها را از جانم برد و شاید برای چند سباهی دور از تمام دنیای مالکان و صاحبان کالاها و فروشندگان آرام ماندم و دیگر هیچ نشنیدم شاید این بار به جای رخنه کردم و حلول بر جان دیگری که جهان تازهی را برایم بکشاید باید به میان هزاری مجلد از کتاب این آدمیان از معرفت دانسته و داشتههایشان باید که سرک میکشیدم. باید این دریای از معرفت آنان را زیر و رو می کردم تا بیشتر به جهانشان پرکشم باید به این دنیای از آنان هم نزدیک می شدم باید آنقدر در این ها و ها دقیق می شدم تا بدانم که این جان دوپا به چه می اندیشد. چه در سر پرورانده است و به داشتن چه چیزها دل کرده است شاید باید برای درازی سالیان بسیار در میان اوراق نگاشته‌ها از فکرهایشان گام برمیداشتم. هربار هر بار با عناوین تازهی روبرون شدم هر بار چیز تازهی می که هر کدام از آن نوشته ها بخشی از داستان زندگی و بودن این انسان‌ها بود آنجا که در نگاشته‌هایشان از این احساس مالک بودن به سراحت می‌گفتند. آنجا که از اشرف بودن دم میزدند آنجا که به آن افتخار میکردند و فخر میفروختند آنجا که این ارزش مایه مباهات را به سر دیگران میکوفتند آنجا که آرام و پچش پچ کنان میگفتند و جواب میگرفتند. شاید باید بیشتر از آنان می خاندم تا بیشتر این سیر کالا شدن آنان را در میافتند از چگونگی پیدایش این افکار مطلع می شدم؟ جرقده های آنان را درمی از کجا نشأت گرفته بود شاید باید بیشتر نزدیک می‌شدم تا به هزاری فلسفه و استدلال درمی یافتم که اینان جاندار ابزارساز هستند و شاید باید به این هزار توی سالیان غرق میماندم. اما شاید نزدیکی به یکی از آن که برای اینان فکر می‌ساخت آنکه مینوشت و به این نوشتن آنان می‌آموخت مهمتر و مفیدتر بود پس باز حلول کردم اما شاید این بار به جان هزاری مجلد و کاغذ شاید به میان هزاری نوشته ها به جان هر که در میانه بود زیاد می و زیاد می دانست. آری، میدانم می دانم که می دانم. هر چیز این جهان برای دانستن است و چه کس والاتر از این دو پای با کرامت که همه چیز را دانسته است همه چیز را دریافته است و هر چه در نیافته هم در چنگال اوست باید دانست و من میدانم اما نه همه چیز به همین هم ختم نخواهد شد این دانستن از دیرباز گفته شد و تکرار کردنش ما را باز به فلاکت خواهد سپرد باز گفتند و باز ما را به این فلاکت غرق کردند از دیرباز هزاری گفتند و ما همه را دریافتیم ما دریافتیم که چگونه اینان بدین گفته ها ما را به اماغ جهالت و حماقت بردند ما دریافتیم که اینان با همین دانسته ها ما را به چنگال این هماغت ها بردهاند. نه خیلی فراتر از آن پیشتر و والاتر از آن آنان هرچه از دیر باز کردند باعث حماقت بود باعث افتادن به این چنگال از بلاحت ها بود پس چاره در رفتن بلعکس این مسیر خواهد بود باید پشت پا زد به هر آنچه آنان ساختند باید هر آنچه در برابرمان ما نهادهند را به کناری زد باید در برابر شیستات، باید هرچه در پیش است را زیر و رو کرد، باید از نو ساخت، اما اصل مهم در این ساختن برعکس هر آنچه آنان ساختند است. آری، باید این بار بسازیم، اما آن را بسازیم که خلاف حرکت آنان است. آن را بسازیم که هیچ شباهت به دنیای آنان نداشته است. اگر آنان گفتند که ما همه چیز را می دانیم، ما می گوییم که هیچ را نمی دانیم. اصلا قدرت دانستن چیزی را نداریم. باید خرد کنیم کوچک کنیم آنقدر کوچک و اندک کنیم تا چیزی از آن قابل درک نباشد. نه فراتر از آن. اگر گفتند هماره از کلیات و بزرگی ها گفتند، ما میدانیم که گفتن از عمق ناممکن است. به اصل پرداختن دروغ و فریب است. پس باید به صحت آمد، در صحت ماند و صحت گفت. آری هر آنچه گفتند و بافتند، محتاج تغییر است. نه تغییر، دگرگونی دگرگونی به معنای زیروزه برکردن آن باید از نو هرچه آنان ساختند را برعکس به پیش برد باید عمر را به چاه حماقت ها سپرد باید در سطح حیران بود باید از هرچه ریشه است فاصله گرفت کتاب در دست میخواند و هر بار با راهکار تازهی دست به گریبان است همه چیز را ساده و ملموس برایش ساختند هزاری راه و چاه هزاری راه برای خوشبختی پنجاه راه برای از بین بردن ترس چهل و پنج راه برای مقابله با دروغ و اله آخر به سعت رسیده و همه چیز را دانسته ایم. اما باز هم هیچ نمیدانیم به هیچ عنوان قدرت ادراک هیچ در اختیار ما نیست ما باید سر به پایین در پی گذران روزگار بنشینیم و بر نیاوریم که داشتن فکر و ایده و آرمان اوج هماغت هاست در کاهلی ماندن است و رویاداران را میتوان مجنون خطاب کرد باز از کلیات گفتند و تبل حماقت خود را پر ضرب به صدا در آوردند باز تبل بیسوادی و نادانی به همگان بردند تا همه بدانند آنکه از آرمان و ایده آنکه از هدف و کلیات سخن برآورده است معنای حماقت است باز باید خواند و دانست که اینان جز حماقت هیچ نکردند باید به کرات گفت که اینان در تهجر و واپسماندگی گیر اند و همه چیز را به سرایی از نادانی و جهالت اند. باید به چوب تکفیر هر کس که می دانست را راند که همین دانایان ما را به اعماق جهالت اند. همین گفتن از عمق ما را در این کارزار واگذاشته است باید گفت و به هزاری راه بیان کرد که باید به سطح پرداخت و هر چیز را تقلیل و پیش در از پیش کوچک کرد انقدر خرد و بیارزش که هیچ از آن باقی نماند تا همگان آن را درک کنند پس باز کتاب در اختیار بیشمارانی بود به هزاری زبان گفتند و هر بار ارزش تازه را تکرار کردند همه چیز در سطح خلاصه شده است از امغ باید که دوری کرد و نشان دادند، نشان گذاری کردند، هر که به نگری نگریست، هر که از امغ گفت، هر که یک پارچه از ایمان و آرمان به میان آورد، محکوم به نادانیست. سنگ و چوب تکفیر در برابر روی اوست و او از این نظم تازه ساخته جهانی دور است که در بلاحت و نادانی روزگار سپری خواهد کرد. پس ریشه ها را به فراموشی و هر بار ساغه ها رنگ تازه و نوعی به خود گرفتند تا دوباره به جماعت بیشماری ارزش شوند تا آنان در این ساغه ها آرام همه چیز را فراموش کنند حتی آن ریشهی که به دور که گریبان زندگیشان را در چشبر برهم زدنی در خود بلعید و از آن هیچ باقی نگذاشت در این لانه بیکس و تنهای باید که هزاری پادشاهی کنند باید که هزاری تاج بر سر بر پیشگاه دیگران فخر بپوشند و طالب بزرگی و اسمت شوند هزاری از آنان در دل یک به فریاد می آیند. از آن جایگاه در خیش لذت جویانه در پی جستن بیشتر قنیمت هاست او می تازد و با خیش میخواند یک که هنرمند این جهان من خواهم بود من مالک به جهان آنان خواهم شد و یک که تاز این رقابت ها خواهم ماند به صدای خوش آوایم گوش فرا خواهند داد و هرانچه که در دل پروراندم را به آنان خواهم آموخت هرچند که آموخته هایم را کسی از پیشترها به من آموخته است هرچند چند که به زر و زهر به گوشم خواندند و یا به تصویر آن را آموختند. اما خوش از این بازی که صدای خوش آوای من م کننده این جماعت بیشمار است، من می نوازم و آنان معست به صدای آوای من حقوا شدهاند. هر آنچه خواهم در چنگال من است، غنیمت بیشتر از آن من است. از دختران باکره که آرام خیشتن را به جانم ارزانی خواهند داد برای دریافتن این صدای خوش به سر و صورت خود خواهند زد این بار هم حمله کردم این بار هم قشون بیشمار به شهر آوردم تا کنیزکان بیشمار به چنگ آورم اما صلاح امروز من خوش من است. این بار نه به ضرب خنجر و دشنه که به آوای خوش و دلفریب چه کنیزکان بیشمار که برایم به بند در آمدند در برابرم خیشتن راه به آتش خواهند کشاند آنجا که امر آمده تا آنان را به اقوا در راه تازه‌ای بنشانم چه آرام همه سر به سکوت به دنبالم خواهند آمد و در این وادی به من خواهند پیوست هرچه در مخیل از دیربازی پروراندم را مالک خواهم شد شهوت، ثروت قدرت همه از آن من است کافی است تا مهره بازی را درست بنشانم و در جای درست از هر کدام استفاده کنم این نظم تازه خواهد گذاشت تا من بیشتر و بیشتر مالک باشم اگر خواستم ملکم دل اینان بود که با ندای عاشقانم مالک گشتم اگر خواستم تا به فکرهایشان بنشینم که سخنان اقواگرم منزلگاه فکرانان است اگر خواستم مالک بر جان و وجودشان شوم که غنیمت بی جنگ در برابر است و اگر در دیر سباهی طالب حکومت شدم باز هم صحنه در برابر است ثروت در دست است و شهرت در پیشگاه حال قدرت به پیش آمده تا کنیزی کند باید به قاعده اینان بازی کرد تا این خلوتگاه را نیز به من عطا کنند باید به قاعده پیشرفت و آنگاه که جایگاه برایم هموار بود باید به تازانم و به این نظم مقدس که همه چیز را برایم درست چیده است باید که وفادار باشم به راستی که چه نظمی والاتر از این که این گونه مراه به این وادی بزرگ نامی و شکو رسانده است چه نظمی والاتر از آن که توانسته از چومنی تا اینسان بی همتا و بزرگ جا به آورد این نزم مقدس است و من طالب و حافظان باید که برای استمرار و بزرگ داشتنش هر آنچه راه در برابر است به خرج دهم که همه مکنت و شوکت من از همین خواستن هاست جایگاه رفیق در برابرت هرچه از ثروت و شهفت و قدرت که میخواهی برویت حال باید به پیش آیی و از این جام و در برابر زرهی سر بکشی تا آرام به آن جایگاه که طالبش هستی دست یابی باید به این شراب پاسخ دهی و آن را به کام گیری تا در دور سباهی هر چه آمال به دل پروراندهی در برابرت باشد این نظام نیازمند داشتن کسی است که آن را علمدارانه به پیش برد پس تو کالای هستی که آنان به وجود آورده تا مصرف شوی اگر به جان بخری این کالا شدن را شاید در دیربازی توانستی این کالا بودن را از جان بدری و دیگران را به کالا بدل سازی هرچند که حقا هماره وفادار بوده ای و هر آنچه گفتند را خواهی کرد که تو مدیون به آنانی این ندا را هر بار به گوش زمزمه می کنم. آنگاه که در حیبت زیبایان یک سوار سحنه ها چشم دوخدم آنجا که او بر صحنه پرشوکت روزگار ایستاده و آواز از بزرگی و بزرگ مرتبیش می خاند. آرام آرام به صدای خوش او که به ندای قلبم گوش فرادادم که هر بار هر نفس ملتمسانه در پی جایگاه اوست نشستنش بران کرسی و آن جایگاه نه به دل یک تنچمنی که به دل هزاری و میلیون از انسانها لانه کرده است به دل هر روز می پرورانند آن جایگاه رفی را که هرانچه که به دل آرزو کرده است بر چنگ خواهد داشت و هر بار این ارزش به امری لایزال از زندگی او بدل خواهد شد چهری آن تن که به صحنه آرزوها گام نهاده و دلیرانه سرود ستایش خیشتن را خوانده است در این شوکت و جلال همگان را به ستایش فرا خواهد خاند مسان همه در برابرش سر به سجود خواهند گذاشت و او یک سوار میدان ها خواهد بود و چه آرزویی فراتر از این که بر جایگاه رفیع او رخنه کرد حال که او سربه راه و سلوحه است سخنش مگر جز حق خواهد بود تا اگر کسی به او بی احترامی کرد چه باید سینه ها شکافت و لباس ها درید که او بی و مقدس عالمیان است او با اسمت است اسمت از آن اوست و با او زاده خواهد شد جایگاه رفیعش آرزوی در کنارش بودن و به دستارش چنگ زدن تمام معنی و هدف بیشمارانی خواهد گشت که یک از میلیونشان من خاکی خواهم بود من که رسیدم به جایگاه او به معنای رسیدن به همه آمال آرزوهایم است هرچه قبل و بعد از او بود سراب است هرچه در برابرم ببینم بی ارزش و توخالی است که رسیدم به جایگاه رفیع او تمام ارزش هاست. و باید که بدان دست یاف پس هرچه در برابر است را یک به دور خواهم ریخت تا شاید در روزگاری چه دور و چه نزدیک به جایگاه او چنگ بزنم اگر روزی چیزی گفت و یا خطایی کرد اگر کاری کرد که بر خلاف میل من بود چه؟ باز ندایی به آرامی در زیر گوش زمزمه خواهد کرد که قدیسان بی اشکالند. آنان محسوم و دور از هر خبت و گناه آن خواهند کرد که به دوش آنان است پس این قدیسان زمان بر سهنها آرام میدرخشند. اگر در چند گامیشان هزاری به درد جان سپارند آنان آرام می و جماعتی از خاندنشان سرمست خواهد شد من هم آرام به سرمستی آنان سرمست خواهم شد چرا که برایم خانده روزگاری پیشتر او هم یکی از آنان بود او هم خیشتن را از جایگاهی پست و در دالوت تا بدین حد از قدیسگی رساند او مقدس است آنچنان که بر هر مشکل در برابرش فائق آمد و هر زشتی را از پیش روی برداشت آری او در نهای کمال است. پس باز به خود خواهم خواند که او چگونه از زیر دستان پیش رفت همه پله ها را در نوردید و بالا و بالاتر رفت آنقدر پیش رفت تا به آسمان رسید آنجا بود که تاهرش کردند آنجا بود که او را قدیسه خاندند و آنجا بود که به هر جایگاه رفیعی دست یافت و حال این معصوم بر زمان ما هرچه بگوید حق است حقیقت است و هرچه که لیاقتش را داشت تصاحب کرد و حال اوست که مالکانه بر تخت شاهی نشسته است اگر هزاری در گوشه نزدیک بانجا که او میخاند و سرود خود خودستایی و ستایش خیش میگفت از درد به خود ماندند باید بدانند که او هم یکی از آنان بود و به جایگاهی رسید که برایش تلاش کرده بود پس او یگان قدسی عالم ماست و ما به داشتنش، به بودنش، به شبیل شدنش و به این هدف والا اعتماد کرده او را خواهیم پرستید و در ستایش به مرتبه هایی والاتر از او هم خواهیم رسید او والا مرتبه بر جهان ماست و ما در رسیدن بر مرتبت او باید فراتر از اینها را هر بار و هر ثانیه به خود دوره کرد و با خود خواند که در دور دستی به جایگاه والای او چنگ برد و آن را تصاحب کرد و اینگونه است که هزاری از کوچک و بزرگ از جوان و پیر در آرزوی بودن و شبیه به او شدن نه زندگی میگذرانند که در این برهوت بی آرمان و ایمان بی هدف و بی زندگی همه چیز را یک جا به دست آوردند و جهانشان پربار شده است همان گونه که من با این هدف والا آرام چشم می‌بندم و برای رسیدن به این آرمان بزرگ زندم در این هزار توی به نام جهان ساخته شده به نظم تازه انسانی باز هم توانی بر جان خیش دیدم تا به جان یکی از جان بخشان جهان حلول کنم. به قلب درختی پیر لانه کنم که تنها یادگار روزگاران پیشتر بود. حالو را و تنها در جایی به دور دست از هران کس که بخشی از او بود سپرده آرام به حال مرگ رها کردند. و من که بر جان او بودم از سکوت و آرامشش گاه کلافه می شدم نه حرفی میزد نه شکفایی می کرد و نه نالهی داشت هیچ برای گفتن نداشت شاید هم گفت شاید او نگفت و باز هم ساکت ماند اما هزاری از همین آدمیان به جایش سخنها راندند شاید حیوان زخمی از روزگار به جای پدرش سخن گفت و شاید این مادر نالان آرام به گوش زندگان به گوش انسان این اشرف و مالک و صاحب ندا کرد آنجا باید فریاد میزد هیچ از آن روزگار پیشتر به جای نمانده است نه دیگر هوایی است تا آن را استشمام کنی نه سایهی تا آن آرام بیارامی آری دگر هیچ از آن روزگاران پیش به جای نمانده تا در آغوش پر محبت جان عالمیان آرام گیریم او را زدند و از ریشه خشکاندند به جای هر زشتی که به جهانشان بود او را از ریشه درآوردند و آتش زدند کاغذ کردند به اشیاء بدلش ساختند هرچه خواستند کردند که باز هم از دور دست های شنیده شد که انسان مالک بر جان هاست ایوای که هر بار از آن دورها این سخن به کرات خانده شد هر بار گفته شد و هر بار دوره شد که انسان مالک و اشرف خلیفه و صاحب بر جان هاست هر بار به شکل تازهی خوانده می شد اما باز هم تکرار همان روزگاران پیشتر بود از جان درخت برکندند و به کاغذ بدلش ساختند تا باز بگویند و بنویسند که انسان اشرف و صاحب است آه که یک بار آرام آنگاه که جان درختی را می گفت فرزندم بر جانم بنویس که همه یکتا و برابرین او گفت و انسان بران شد تا این بار نه اشرف که از کرامت انسانها سخن براند باز هم همان داستان کهنه بود هر بار شمعی تازه‌ای به خود می‌گرفت اما در اصل و بنیان هیچ تفاوت به دل نداشت باز هم همان دردهای پیشترها را نوشخوار می‌کرد و همان را تکرار می‌گفت حال که جماعت بیشماری به گرد درخت پیر جمع شدهاند آرام می‌گویند برایمان حرف بزن راه و چاره ای در برابرمان بگذار که امروز جهان من جرم است در حال سوختن است نفسی نداریم همه چیز جهان را باخته ایم در چند گامی بیشتر به زباله خود مدفون خواهیم شد ما پر عذاب و به درد نشسته ایم هی مادر مهربان من تو راهی به ما بده مادر که دل پردردی داشت به طول همه عمر نفس بخشید و به جانش تبر زدند نای سخن نداشت او که به طول عمر در دل این عمر طویلش دید انسان هیچ تفاوت نکرده است هماره همان دیو دورتر هاست او همه را دیده بود دیده بود که چگونه از آن دیربازان تا به امروز هر بار انسان خیش را مالک انگاشت و به جان طبیعت حجوم برد و حال در این نظم تازه ساختش دیوان و ننگینتر هجوم حجوم برده است تا بدرد تا چشم کار خواهد کرد خواهد دید که جنازه ها بر زمین است نفس زه را میکشند و می سوزانند به جایش هزاری زشتی بنا کردند هر بار می بینند که چه به روز آسمان آبی آوردند هربار بار می بینند که زشتی را به زیبایی نشان نشاندند نفس را رو بودند و این تصنع ساخته به دستشان هیچ در وجود خود نداشت تا عرض می کند آری همه را درخت پیر می دید و باز های کودکان را میشنید شنید که چه مستحصل در برابر او به خاک افتاده بودند و طالب راه چارهای به دنیایشان می گشتند باز گفتند و باز مادر پیر چیزی نگفت سرآخر به درد آنان دردمند شد، عشق ریخت باران کرد در میان همه ناله ها، در میان لابه ها، در میان شیون و اشک و زاری انسان ها، مادر آرام گفت همه را برابر بینگارید، به جان براور شوید و به جان زنده بمانید او این را گفت و باز فرزندش نشنید، شاید شنید و شاید خواست که بشنود اما حال چه بشنود و چه نشنود میبیند که چگونه به لتمه زدن بر جانها جان خیش را به مرگ خوانده است به سوختن سوخته است و به جان بخشیدن جان خواهد گرفت اما چه تلخ و زشت این انسان که پاسخ جانبخشی مادر روزگاران را به تیغ و تیر داد تا باز به همه بفهماند که مالک بر جان هاست که قصاوت بر خان که زشتی دوران هاست و پایان خوشباز هم آرزوی مادر جان ها بود او که آرام جان میداد و باز جان می بخشی. او که جان بخشانه جهان بود که بودنش به جان دیگری جان بود و نبودنش بیجانی همه جانها باز هم آرزو کرد تا همه جان شوند و جهان را جان بپندارند به حلول جانم به جان هزاری از انسانها به جان بیشماران که گفتند و نگفتند که دیدند و ندیدند باز دیدم دیدم که چه آرام باز آدمیزادی برخواست از خواب تا روز را به شام و شام را به سهر و دل کند باز دیدم که چگونه به پیش رفت رفت تا به بازار این بیشماران خریده شود رفت تا او را دریابند و در این دریافتنها او را هم بخرند رفت تا این کالای تازه را دریابند او آمده بود تا به بهای بیشتری خریده شود حال شاید برای همخوابگی او را میخریدند، شاید برای پیشبردن بردن کاری شاید برای دادن رعی شاید برای مصرف شدن به دردی خلاص او آمده بود تا خیشتن را بفروشد و در برابرش هزاری دندان تیز کنندگان بودند که از این لاشه باجان به اهداف در ذهن دست یابند آنان آمده بودند تا از دل اینان جماعتی را گرد آورند تا به دردشان درمان شود درد که نه همان درد دوران بود باز بود و باز نشست باز هر روز صبحگاهان هزاری به پیش رفتند تا فروخته شوند تا خریده شوند همه چیز را بخرند و بفروشند و همه را به کالا بدل کنند و خیشتن هم سرآخر کالا شوند اینان از همه چیز عبور کردند، مالک شدند بر همه چیز جهان صاحب بودند و در هرچه نظم تازه جهان بود از هم پیشی گرفتند. یگان جانداران ابزار ساز شدند و همه چیز را از آن خود کردند و حال آمده بودند تا در این دنیای ساخت شده به جانشان دوباره مبدل به کالا شوند. دوباره اینگونه خیشتن را به کالا بدل سازند و اینگونه در این کالا بودن به کالایی با ارزشتر بدل شوند آریانان در برابرشان راهی را داشتند که نظم تازه جهان برایشان ترسیم کرده بود پس باز دیدم هزاری را دیدم در جسم یک تن به دیدن با یکی همراه شدم و سرنوشت هزاریشان را برایم نقل کرد هر بار به دل گفت و هر بار تصویر بیشتری از جهانشان داد من آمده بودم تا جهان آنان را بیشتر از پیش درک کنم و آنقدر درک کردم که بخشی از جهانشان شدم همانقدر بی امید، همانقدر در یأس و ناامیدی در همان چاه از هماغتهایشان آنقدر به جهانشان نزدیک شدم تا همه جهانشان را دریابم به یکی از آنان بدل شدم تا بیشتر جهانشان را دریابم هر بار که کسی خود را به کالا بدل کرد و به دیگری فروخت من هم با او فروخته شدم با او خریده شدم باری به شکل خریدار در آمدم جان دریدم و باری به فروشنده بدل شدم و دریده شدم گاه خودم را دریدند که خیشتن را می داریدند. دیگر آنقدر به دنیایشان نزدیک بودم که عمر را هم شکافته باشم آنقدر به دنیایشان نزدیک بودم که هر وجود ناوجود از جهانشان را شناخته باشم اما خسته بودن آنقدر خسته که دیوانه می شدم آنقدر خسته که توان گفتن و شنیدن هم نبود به طول این دیدن ها به طول این بودن ها همه جانم خستگی و عذاب بود آنقدر عذاب و درد که از خستگی به خیش پیچیدم از آن روز نخستین حضورم در این دنیا از آن آمدن و با این آدمیان بودن هیچگاه هیچ احساس نیاز از دنیای آنان را درک نکردم اما شاید این دریدنها، این شناختنها مرا به دنیای آنان نزدیک و لمس کرد آنقدر نزدیک که احساس نیاز آنان را دریابم و یا شاید دیدن این دردهای آنان مرا آلوده به چنین نیازی ساخته بود چه که بود و نبود دلم خواب میخواست دلم میخواست تا به خواب بروم آرام گیرم آرام بخوابم که هیچ نبینم که هیچ نشنوم برای چند سباهی هم که شده از دنیای آنان دوری گزینم. نه چند سباه را طلب نمی کردم. حال طالب خواب ابدی بودم حال میخواستم تا از نخستش نبودم و حال که بودم دیگر نباشم. حال تمام خاصه جان من خوابی به طول و درازای ابدیت بود. خستم، آنقدر خسته که میخوام به خواب فرو روم به خوابی عمیق و همیشگی به دنیای از ندانسته ها، از نبودن ها، از ندیدن ها و نشنیدن ها. دلم میخواهد به دنیای دست یابم دورتر از این دنیا به خوابی که در آن هیچ از دنیای آنان نباشد این دردها را نشنوم این خراش ها و زخم ها را نبینم این انفعال و در خودماندن را حس نکنم این خاموشی و سکوت این در خودماندن و ترس این یک شدن این حماقت و دیوانگی هیچ از دنیای اینان را نبینم دلم تنها طالب خوابی است به درازای تمام بودنها تمام ماندنها تمام آمدنها و رفتنها دلم خوابی ابدی میخواهد که دیگر در آن از انسان هیچ به میان نیاید و انسان هیچ در آن منزل نکرده باشد آری دلم جهانی میخواهد دورتر و دورتر از هرچه که نام آدمی و انسان بر آن داشته باشد دلم خوابی دور از انسانیت خواهد خواست پلکا سنگین است و در آرزوی چنین جهانی خواهم خوف کتاب اقوا، اثر نیما شهسواری، بخش چهارم آسمانی نیلگون آبی رنگ، بزیم به صدای خوش آواز پرندگان سپیدی نور خورشید احاتگره است و هوای بوی خوش درختان دارد وای که چه تراوتی وای که چه زیبایی، وای که جهان زیباست و در فروغ گیتی میدرخشد. آسمان آبی همه سطح جهان را پوشانده است و هوای خوش این بودن نفس تراویدن را به همگان عرضه کرده است. خورشید بر فراز آسمان در حال تابیدن است و از نور جانبخشش به همگان میتابد. کمی دورتر از آسمان و بر برزمین کوها مغروران سر بر آسمان کشیدند و هر از چند سباهی سری به میان ابرها خواهند برد که به لالای آرام آنان آرام گیرند و استوار کنند زمین زیر پای جانها را آبی به زلالیت صداقت بر صحن زمین بر جریان است پرخروش در حرکت است وانه می استد و هیچ زشتی به خود راه نمیدهد. میشوید و زمین و زمانه را به جریان واداشته است درختان مغرورانه بر زمین ریشه دواندند بر خاک جا خوش گردند. از جان زمین می نوشند و بر جان زمین نفس ارزانی می کنند. و هر بار بر زمین روینده تازهی سر برون آوردند برون می آید و به همراه خیش دوباره بودن و مانابودن را پیشگش می کند. می تراود از دل خاک، برون می تراود عطر زندار و جان بودنها را. باز زندگی به جریان است و باز زندار می کند هرچه میرایی از جان رفتنی است. گل می تراود و به عطر خوش آهنگش نقمه سر می دهد. به بودن و به جان ماندن را درختان به شاخ ها و به جان خیش میهمان بسیار جان شدند جان به جان پیش دوباره بودن است باز تراوت این زندار بخشیده است به کام زمین جان و بر جان ماندن را باز لانه کردند مرغان اش در لابلای شاخصاران درختان مغرور و افراه آرام چهچهه سر میدهند به صدای خوش آوازشان مرور میکنند زندگی را آمدن تا به نوای آرام دلهایشان دوباره بسازند زمین سال خورده رنجور را به خاک زنده است هزاری که به جان میتراود جان بیشماری را درخت نفس هدیه می داد و باز جانهای برزمین از کام آن میکشند هوای بودن را و باز هدیه این نفس جان می بخشند به بیشماران برزمین آهوان بی همتا به تکاپودر آمدند به دل جنگل جست میزنند و به هوای سربرون آوردند تا به بال بازی به پرواز ذرایند و از دور دستری به زمین چشم دوزند که چه آشغانه جانها به هم آمیختند آمیختند و دوتن یک شدند و به عشق وسلت کردند و به جان مولود گشتند مولود آرام به جان والدان جان میگیرد و از شهد جانشان دوباره به جان زنده خواهد شد باز می تراوت از این آسمان و زمین ندای زندار و جان بودن را که به هم متصلانه میبخشند هربار هر بار زندگی را این ندای زمین و آسمان است، این صدای کهکشان است، این غزل عاشقان است که باش و زندگی کن که به بخشای که جهان بخشنده است، که جان باش و جان ارزانی دار، که این سرای جان ماندن است و به مهر زیستن است وای که زمین باز طالب بودن است که از جان خیش به جان هزاری بخشاینده است هزاری به هزار توی این راه آمده از هر ذره جان میتراود و این چرخ دوار ندا آورده است از یک ذره به هزاری برون داده است که هر بار جان شوید و به ره جان بمانید که هرچه ارزش بر زمین و خاکتانه است به ارزش و کرامت این جان هاست نه دیگر به چنین دنیای جای هیچ ارزش تازه نخواهد بود که هر بار زمین و آسمان به ندای پیشترها قزلهای بکر سرایدند این قطرها از سرشت جان است، همتای و برابر و آزاد رها بر آسمانی که از آن همه است بر زمینی که برای همه است از جانی که به کام همه است. باز میتراود و از دل هم برون میشوند هر بار به هم چشم میدوزند و آرام به گوش هم می خوانند. این جانهای با شکوه را. باز بر آسمان میخواند. مرغان عشق سر میدهند آهوان زیبا به جس و خیز میگویند درخت به غرورش خوانده است گورگ کشان میگوید و هرچه جان بر زمین و آسمان منزل کرده میخواند از شکوه و عظمت جان میگویند و به پاس ساشت بودن حریم و حرمتشان همین جان بخش جان هاست باز جان میتراوند و ریشه میدوانند باز به پیش می روند و در هم یک تا و یک گون به نام باش جان بر می آیند. همه آرام همان ندای پیش درها را خاندند آنچه از دیر بازان دانسته و هزاری خواستند از جانشان برو بایند. هزاری خواستند به زشتی از پیششان بدرند و حال دوباره به قوت درونشان خوانده در جان را انسان هم آرام بر زمین گام نهاده و آرام به جان جاندارگان غزل می سراید. از آنان جان و به جانشان نفس فدیه خواهد داد آرام و با شکوه به گوش همه می خانند این یکتایی شکوه را این برابری و ادالت را این آزادی و شکت را همه را میخوانند و آرام در پی جان به حفظ جان به شکت و جلال و عظمت جان به کرامت جان نقمه می سرایند. همه یکتاب و برابر همه با شکوه و در جلال از آنچه برایشان در برابر است خواهند نوشید از آنچه در برابر است مدد خواهند برد که این دست آرام به آنان جان فدی داده است و طالب تیمار جان هاست. طالب پاساشت از جان هاست، همه از یک ذره و به یک ذره برای بودنشان حرمت نهادند و آرام میخوانند ما جانیم به آسمان آبی به دریای پرخروش به درختان افراه به گلها و تراوتشان به زمین آرام به ابرهای باشکوه، به درخشش خورشید به های محتاب به هرچه بر جهان بود و خواهد بود آرام میخانند همه یکتاو و جانی باز هم می سرایند و باز هم به پاستاشتش می خانند. همه جانیم و همه برابری، همه آزادی و همه یکتای در برین جهان آرام است و زیبای طبیعت پر جان است و با شکوه درختان به جای مانده تا نفس فدیده دهند دریای آبی مانده تا به شویت زشتی را کوه‌ها استوار و بر زمین نگهبان جانها خواهند بود خورشید می و محتاب آشغانه سر می‌دهد همه بر جای خیش ماندند همه بر جان خیش ماندند وای که دیگر جهان صاحب و قدرتمند نخواهد داشت وای که برتر و کهتر به خود نخواهد دید وای که دیگر هیچ نام و قسم نخواهد بود و همه را جان خطاب خواهند کرد جان درختان، جان گیاهان، جان انبات، جان طبیعت پاستاش شده آرام مانده است، مانده تا نفس فدیه دهد مانده تا جان ببخشاید و بر جان خیش و سوار بماند که جانش شوکت جان همه جاندارگان است. به دل این طبیعت با شکوه و زیبا جان حیوان آرام گرفته است به دور از هر زشتی و عذاب، به دور از رنج و تبعیض، حیوان به جان با شکوهش مانده است تا عشق خد دهد تا بیاموزد و بدانند که دنیای و زندگی فراتر از همه چیز به جان نهفته است به آغوش سیراب شده است به عشق میتراود و به بودن زندار است مانا و جاودان به قلب هرچه جان با شکوه مانده است میماند و باز جان میبخشاید و همه را به درس مهر فرا میخواند. پاستاشت جان حیوان جان خیشتن است نز از باغ وحشیگری انسان خبر است نه از و دردها، نه از برده کشی و هماغت ها نه گوشت تنشان را درگیدند نه از پوستشان جامه‌ها ها پوشیدند نه به پیشرفتشان سرها را بریدند نه به رزالتشان کودکان را دریدند نه به کیفشان از آب چشیدند، نه به زشتی خواسته نفس زندان را کشیدند هیچ به جهان نیست جز حرمت جانها هیچ به جهان نیست جز آزادی جانها هیچ به جهان نیست جز برابری خانها همه یک تا و برابر همه به کام جهان به جان خیش محترم و بر خاک خیش مانده آرام جان میگیرند و جان میبخشند کودکان به آغوش میکشند و به مهر میپرورند. باز آرام به گوشی به آغوش کشیدن را خواهند دید. زبان مهر را خواهند شنید. نوازش مام را خواهند چشید و باز به ای عطوفت خواهند رویید باز تا چشم کار کرده است. آغوش مادران باز است. به آغوششان هزاری آرام ماندند آرام خوابیدند هر از چند سباهی مهر مادری زبان می کشد به جان فرزند خفتهی بر آغوشش هر که زشتی ایس را از جان او برده است که جهان را از زشتی خواهند برد باز به مهرشان آرام دیدگان پر خواهد شد باز از دیدن این جان و تراویدن جانها اشکا خواهند ریخت به شوق دیدنشان زنده خواهند شد و به پروازشان پرواز خواهند کرد حیوان به جان طبیعت است و هر دو آرام یکدیگر را به آغوش گرفتند آرام به آغوش هم می و آرام به آغوش هم آرام گرفتند دیگر از آس خبری نخواهد بود دیگر حسد به کام دور رفته است دیگر خودخواهی جامع برخواهد بست و جان بودن به جای باقی خواهد نشست دگر به آز و خودپرستی لانه ها کوفته نخواهد شد خانه‌ها به آتش کشیده نخواهند شد کسی صاحب نخواهد شد و هر کس خیشتن را به همان جان که والا ارزشاست خواهد دید و به شوکت خود شوکت همه را در خواهد یافت جنگل خانه ی حیوان است و طبیعت حرمت همگان به حرمتش به پاستاشتش به این خانه امن همه یک جان شدند و برای بودنش از همه دنیا دست خواهند شست که این بار دانستند جانشان به جان همان جانبخش است بر حرمتش هر روز فزودند، هر روز جایگاهش را والاتر خواهند داشت و از دست رازی مسونش خواهند گفت که نقمه بودن و این جان والای را هزاری شنیدند حال که طبیعت پاستا شده است حال که حیوان به منزلگاهش آرام مانده است حال که هر عذاب و ظلم و زشتی از جان جاندارگان رخت بسته است انسان کجا منزل کرده است؟ او هم به همین مام بزرگ جهان لانه دارد. پاسبان جان همه جانداران است. او دریافته که تکلیف بسیار دارد. او دریافته که مام جهان به او عطا کرد این قوه دانستن را که پاسدار جان همگان باشد. او دریافت که پاسدار جان همجانانش خواهد بود. پس حال در این دنیای والای جایگاه حیوان را آرام بر جای گذاشت و پاسدار جانشان بود به او لطمه نزد به هیچ دلیل نه برای سیر شدن نه برای لذت نه برای پوشیدن نه برای منفعت جستن و نه به هزاری دلیل دیگر که این بار آمد و آرام حافظ جان همجانش بود منزلگهش را حفظ کرد و به جانش قسم خورد که از هر زشتی و عذاب او را دور نگاه دارد طبیعت را شناخت و دانست که مادرش است دانست این نفس بخش عامل ماندن و بودنش است پس جانش را به همتای جان خیش شمرد و به بودنش هر چه بر توان داشت همت گماشت جانش را حافظ بود که جان خیشتن و همه همجانان را پاسبانه است حال به این دنیای زیبایی ها به جهانی که در آن همه جانها حفاظت شده اند، این نگهبان دنیا نیز باید که آرام گیرد باید که زیبا زندگی کند باید که جان باشد و جان عطا کند پس آشغ شد عشق ارزانی داد و به دریای همین عشق بارور شد مولود شد و والد گشت به جهان آمد و در جهان ماند جان شد و همتا شد یک جان شد و عاشق ماند به دریای عشق هر روز بال و پر گرفت و هر روز بارورتر شد که حال دانسته بود ارزش والای زندگی را این جان با ارزش را که از همه چیز جهان والاتر است حال دانسته بود که باید حافظ این جان باشد که یگانه ارزش جهان است حال دانست که آزادی چیست و فهمید که نباید به دیگری آزار رساند همه را دانست و را برای داشتن این ارزش والا هزینه کرد آنقدر هزینه کرد تا جهان جایی برای زندگی باشد به این تکلیف پاسخ گفت تا جهانی لایق به آورد همه بر آن زندگی کنند و از حقوقشان لذت برند حال دیگر انسان هیچ نامی جز جان بر خویش نداشت همتای دیگر جانهای جهان بود او دیگر هیچ تفاوت به درختان و حیوان نداشت که به خویشتنشان تفاوت بینگارد او حال دگر یکتا و همسان دگر جانهای جهان بود و به این برابری زنده ماند به یکتایی بهره برد و به این دریای آرام آشق شد حال دگر ارزش زندگی را دانسته بود پس هیچ ارزش از زشتی به جانش منزل نکرد حال دانسته بود که جان است که همتای دیگران است دانست که پاسبان دیگر جانهای جهان است دانست که آزادی به قانونش به پاستاشت قانونش بر جهان خواهد بود دانست که برابری از آن همه است پس به تمام ایمان و باورش جهان ساخت جهانی ساخت لایق زندگی کردن جهانی که بر آن حقوق همگان پاسداری شود هر که به باور و ایمان خیش زندگی کند تحمیل برچیده شود ریشه جعب کنده شود همگان به آزادی خیش پایبند، بر قانون مکرمش زندگی کنند جهان قسمت شد کوچک شد بزرگ شد هر بار به شکلی در آمد که هدف زندگی راحت و آسوده همه جانها بود کرامت به جان مقدس همه جاندارگان بود پس هر چه که نیاز بود انجام کرد تا همه آرام و در پناه باور خیش زندگی کنند هر بار برای جمعی که خواست منزلگاهی بنا شد تا آنجایی آرام گیرند که بران باور داشتند آنجایی آرام گیرند که هم باورانشان منزل کردند آن کاری را بکنند که بران ایمان دارند چیزی را آزادی بخوانند که خیشتن آن را ساختند، به هرچه خواهند زندگی کنند، به هرچه خواهند باور بدارند و به هرچه میخواهند ارزش هر نهند. از این رو جهان به رنگ های گوناگون بدل شد. جماعتهای بیشمار به رنگهای بسیار به گرد هم درآمدند، هزاری شکل زندگی کردند هزاری قانون نوشتند هزاری کارها کردند لیش شادمانی جهان آنجا بود که هر کدام به باور خیش زنده بودند که تحمیل بر جانشان نبود که درد اجبار زندگیشان را رنگ نزد که خیشتن خواستند و پاستارش ماندند هزاری آدمیان به سرتاسر سر جهان آنگونه زندگی کردند که تصویرش بر ذهنشان بود هر که به هر چه باور داشت بر همان سرالانه کرد که معرفتش در آن نهفته بود اما یک تای جهانشان پاس آزادی بود هر جا که بودند میدانستند که آزادی یه گان منجی جان همگان است پس به کرامتان آن همت گماشتند تا به زشتی فرو نروند به جان دیگری آزاری نرسانند تا آزادی همیشگی و ابدی شود تا نسل ها پشتن در پشت هم بر این ارزش والا لانه کنند و در این سرای امن آرام به جان درآیند همه چیز بر جهان بود همه چیز مثال دیگر بازان بر جهان خانه داشت لیک این بار نیامده بود تا ذهنها ها را بشوید نیامده بود تا به تحمیل مردمان را بدرد نیامده بود تا به جبر به سر جای بنشاند آمده بود تا از آن بحر برند که خیش میخواهند پیش رفت بود آنقدر بود که دیربازان را به سکوت وامی داشت اما به راهی پیش رفتند که جان دیگری آزار نبیند به راهی پا فشردند که جان دیگران حفظ بماند که دافه از جان همگان باشند حال دگر اگر نوای تازه‌ای بر آسمان شنیده میشد، برای مسکوت داشتن آدمیان نبود اگر جسم تازه‌ای بر خانه‌هایشان لانه کرد برای منفعل کردنشان نبود نیامد و هر روز بیشتر به پیش می‌رفت اما آدمیان را به بند خیش در نیاورده بنده نکرده و این عبد دست و پابسته را به قربانگاه نبرد این بار آمد تا جانان از آن بهره برند و بهتر زندگی کنند کار هم بود آدمیان باز هم کار کردند که کار پیشرفت و همت است آمدند تا باز هم بسازند اما این بار حیوان ابزار ساز نبودند جان بودند و جان بخش این بار کار کردند تا جان ببخشند تا مثال درخت افرا نفس هدیه دهند آمدند و ساختند تا جان ببخشایند تا نفس هدیه کنند تا پاسبان جان دیگران شوند تا همگان را به زندگی بهتر میهمان کنند از زندگی رخت نبستند کار کردند خواندند دانستند زندگی کردند عاشق شدند به آغوش کشیدند و به آغوش کشیده شدند کار هم کردند تا بهتر زندگی کنند همه جانهای جهان اگر کسی خواست به گرده بیشمارانی بنشیند و از این جان بیتوان بهره گیرد بیشمارانی به پیش بودند تا جان همجانانشان را از این درد برهانند پس قطار بیشمارانی به راه بود تا برابر هر زشتی سینه ستپ کند و حق خیش را باز ستاند که این بار جهان جای جان بود جای زندگی بود و هیچ بر آن لانه نتوانست که کرد هزاران حسار به پشت هم قطار با سینه های شده برای حفظ جان همگان به پیش بودند این پیش قراولان آمده تا از جان هم بگذرند که همه به جان زنده مانند و به جان بپرورانند و برویانند آرام آرام این حس با هم بودن به جان همگان رخنه کرد و هر روز ارزش‌های والای جای هر چه دیر دیرباز از زشتی بود را گرفت ایثار به پیش آمد فداکاری خانه کرد اتحاد قدرت گرفت مدد رساندن اصل شد هر روز ارزش ها دگرگون شدند باز را آفریدند تا هر روز بهتر و بهتر زندگی کنند همگان زندگی کنند و جان همگان پاستاش شود و همگان به کنار هم بمانند جان یک تا ارزش جهان بود و از میان بردنش محال ممکن چه کسی می توانست این یگان قدسی را از میان بردارد؟ آن ارزش که برای همه یکسان و والا بود هیچ که از توان مقابله با چنین ارزش را در خود ندید و نخواهد که دید یگان ارزش والای جهان جان همگان بود آزار نرساندن بران بود و این آزادی نهایی برای همگان شد پس به هر کوی و برزن به هر خانه و لانه هزاری بودند تا برای پاس داشت آن چه یگان منجی جهانشان است از جان هم بگذرند و برای پاس داشتش تا آخرین قطره خون به پیش آیند ریشه از هر زشتی کنده شود و به قوت این هزاری آدمیان ریشه هرچه چه ظلمت بود خوشک و از میان رفت و از آن هیچ به جایی نماند هر روز بیشماران بیشتری به این پیش قراولان افسوده شد که همه همجان بودند و یک راه در برابر بود آنقدر به پیش رفت تا همه را در خیش گیرد و هیچ از جهان پیشترها باقی نگذارد جز باورمندان به چنین عقیدهی که جان ارزش والای جهان است و آزار نرساندن به آن معنای آزادی ابدی. پس هیچ کس بر جای نماند و هر روز بر پیش رفتن از هم پیشی گرفتند به دریا چشم دوختند و از خروشش به خروش آمدند تا آرام نمانند و بر جای ننشینند به جان خروش در پیش در برابر هر زشتی ایستادند تا جهانشان آن شود که بر آمال آرزوی به سر پروراندند هزاری لانه بر جان هزاری خانه و وطن بر زمان که هرچی خواهند کرد هرچی خواهند انتخاب میکنند، هر طریقتی که باور دارند را به پیش خواهند گرفت از زبان تا قومیت و نجات از اعتقاد به فرای جهان تا اعتقاد به جهان هرچی مادیات بران است از سیاست تا کیاست از حکومت تا امارت از هرچه و هرچه که بر جهان بود به خانه خیش منزل کرد تا پاسدار خیشتنش باشد پس اگر این بار صحفهای طویل به پیش رفتند تا انتخاب کنند دیگر نه به تحمیل که خود این راه را برگزیده بودند نه به زور و شمشیر که خیشتن بر این راه گام نهادند نه به تزویر که باز خیشتنشان به راه آمدند پس جهان آن شد که همه راضی و خشنود بر آن بمانند نه به زر کسی راه برد و نه به زور نه به تزویر کسی لانه کند و نه به تکبیر زورمندان قدرت از میان رفت و به هزار توی درآمد که هیچ از آن باقی نماند که کسی مالک بر آن ننشیند و آنگونه بتازاند که جماعتی برخیش بلغزند آنقدر تکه و پاره شد این دیو هزار سر که از آن هیچ باقی نماند هیچ از قدرت نباشد جز به دست بیشماران به دست همگان که این دیو هزار سر هزار توی دماری از آدمیان به طول هزاری سال درآورده است که این بار باید او را آرام می‌کردند که کردند هزار تکه و کوچک کردند تا از آن هی هیچ باقی نماند تا کسی بر آن قبضه نشود تا کسی بر آن سوار نگردد و بیشماران را پیاده نکند این بار آنقدر او را مهار کردند تا از هیچ بیراهی دوباره سر برون نیاورد آرام به کناری بنشیند تا از او استفاده شود به راه پاک جان‌ها نه کسی قدرت داشت تا به دیگری در و نه کسی جرأت داشت که دیگران را به جنگ بیامیزد برای ماندن بر این جهان باید که طالب صلح بود باید که به جان جانداران حرمت گذاشت باید که کرامت این یگان قدسی جهان را پاسدار بود تا بتوان در این سن آرام و آرام زندگی کرد آری به چنین جهان حامی هم بود از دل همه آدمیان از دل همه پاسداران آزادی به دل این جهان حامی آمد تا دیگر از گوشه و کنار جمعی سر برون نیاورند و به جنگ و جدال به خون و زشتی همه را تسخیر نکنند باید که حامی این جهان را به پیش برد باید که قدرتی انگاش تا پاسبان این آسایش باشد اما به تخصیت هزاران باره قدرت به کوچک و خرد کردن قدرت به هزار پاره کردن این دیو هزار سر باید آن را خرد و کوچک کرد آنقدر که به فرمان همگان درآید برای همگان بیاید این بار قدرت نمی توانست تازاند. که باید آرام برای حفظ جانها به مدد می رسید. سازمانهای های بیشمار به هزاری رنگ و هزاری ناظر بر یکدیگر آنقدر خرد خورد کردند قدرت را که هیچ از خودکامگی بر جای نماند و به قدرت بتواند حافظ جان بود حافظ صدای همگان بود همه را دریافت و همه را پناه گرفت که هیچ ظلمی به هیچ گوشه از جهان سر بر نیاورد که همه از یک جان و برابریم همه لایق به زندگی و همه عاشق به آزادی زاده شده ایم چه گروه های با شکوه که جان بودند و طالب جان که حافظ همه قدوسیت زمین و زمان شدند چه حافظ بر جان همگان ماندند که در برابر هر زشتی ایستادند و پیش از قدرتگیری آنچه نابودی آزادی بود به پیش آمدند تا هیچ از آن باقی نماند و زشتی را نپرورانند آری قدرت تقصید شده بود هزاری پاسبان بر جهان بود که از همجانشان مطلع باشند که حافظ همجانشان شوند و در برابر زشتی بیستند چه آرام و زیبا این رویای بر جان و جهانم ساینداخت آدمیان این حافظان آزادی جهان این پاسبان همجانان خیش باز هم پیشرفت کردند باز هم از علم مدد بردند باز هم در این خرد پیشی گرفتند اما به کام جان و برای همه جانداران این بار هم به این دریای معرفت گام نهادند و با تکیه بر آزادی و برابری چه کارها که نکردند باز آمدند تا این بار به مدد از علم جهان را جای لایق تری بدل سازند و خواندند لایق برای زیستن همه همجانانشان وای که چه زیبا بود آنجا که این آدمیان به جان آمده تا جان همجانانشان را نجات دهند به مدد از علم هرچه که دارند را پیشکش میکنند تا جان حیوانی آرام گیرد درد نکشد و سلامت بماند دیگر علم منزلگاه رهایی و معرفت بود علم به آزادی گره خورد و با او یکتا شد راه شد دریچه شد تا هر زشتی از جهان رخت ببندد تا آنچه به جبر جهان را آلوده کرده است دیگر نباشد دیگر علم طریقتی به راه آدمیان بود که به مدد از آن همه جای جهان را از هر چیز زشتی و نابودی است پاک کنند و چه زیبا و آرام آدمیان در این علم ریشه دواندند تا بیشتر طعم آزادی و برابری را همه بچشند هزاری نگاشتند، دریایی از مطالب گفتند آنقدر حرف زدند و گفتند که همه بدانند ارزش والای جان را، ارزش یگان منجی جهان را آزادی را به همه شناساندند آنقدر خواندند و نوشتند تا همه به این ارزش والا جان بسپارند گفتند از جان و برابری از این یکتایی همه جانهای زمین، از این آزادی والا دیگر دگر بر پیش نبود عمر را شکافتند و به داخل منزل کردند انقدر گفتند تا همه دریابند تا همه بدانند چه والا گوهری بر جهان است انقدر گفتند که میدانستند راه بیداری به گفتن و آموختن است راه بیداری این جهان بیداری انسان هاست شناختن آنان است باید که آنان را از این خواب هزاران ساله بیدار کرد باید به دانش و معرفت آنان را بیدار کرد و به آنان گفت از ارزش جان سخن از این والای و این مقام یکسان همه جانها از این برابری که راه کشای جهان است از آزادی و والایش که اگر قانونش را حفظ کنیم به همه جای جهان دست خواهیم یافت پس باز نوشتند و هزاری نگاشتند تا بیشتر آدمیان بدانند و به جهان والای گام گذارند گفتند از همه جهان گفتند از جهان در برابر از کارهایی که باید کرد آنقدر نوشتند و آنقدر خواندند تا همه بیدار شوند. بعد هزاری رفتند تا بیاموزند آنقدر بخوانند که همگان به این دریای معرفت عاشق شوند. هنر هم بود، او هم آرام به مدد آمد. آمد تا باز بخاند هزاری بگوید شعرها به سراید برخصند آواز بخوانند، موسیقی سردهند داستانها بگویند مجسمه ها بسازند نقاشی ها بکنند همه و همه بگویند از طعم خوش آزادی از زیبایی برابری از وصلت این دو که بی هم هیچ و تو خالی است باز خواندند و باز از آزادی گفتند باز رخصیدند و باز از رهایی گفتند باز جانها به پیش آمدند تا قصه برابری را سر دهند و باز همه چیز از نو سراغاز شد باز جهان به زیبایی هنر به خود ریسه رفت، باز جهانیان به ریسه های زمین عاشق شدند و باز دوباره هر بار به قسم این داستان برای همگان دوره گشت تا به آخر همه فریاد زنند ما همه جان و برابریم و به آزار نرساندن دیگران آزاد خواهیم بود چه نقش چه نگاره ها، چه آوازها، چه فریادها، به دیوار کوفتند به کتاب نوشتند به پرده ها نگاشتند به همه جا خواندند و باز تکرار کردند. آنقدر تکرار شد که همگان بدان ایمان آوردند و جهان به کمال زیبایی به پیش رفت. آسمان هل هل کند زمین برقصد درختان استوار بمانند و باز نفس ببخشایند حیوانات به آغوش هم درآیند و دوباره عاشقی کنند انسان به احتاف و باورهای خیش به دور از هر تحمیل و جبر در آن چه خواهد زندار باشد و زندگی کند مانا باشد و در این بودن و بینهایی جهان جان را پاسمان باشد باز هم زمین و زمان آرام برایم ترانه ها گفت آرام به گوشم لالای عشق سرداد تا بیشتر بر این زیبایی لانه کنم باز چشم دوختم به کودکان در پرواز به آزادگانی که به نهای جهان آزاد بودند به هر جا خواستند منزل کردند به هر جا خواستند پریدند جانها همه پاسبان هم بودند همه رها به پرواز در آمدند آن کردند که دوست داشتند گاه پرواز در آسمان بود گاه در آغوش کشیدن یار گاه به دل طبیعت مسان چرخیدن بود گاه نوشتن و خواندن شد گاه کار کردن و پیشرفت خواند و هر بار به شکل تازه دوباره هجی کرد ما همه جان و برابریم به آزار نرساندن دیگران آزاد خواهیم بود دانستم که همه اش رویاست دانستم بعد از دیدن همه زشتی های جهان آدمیان آنگاه که چشمانم طالب خواب بود رویا دیدم دیدم همه این آرزوها و فراتر از آن را دیدم آن را همه به دل هزاری تکرار کردند را دیدم فریادهای هزاران باره همه جانها را در این رویای دراز دیدم و دانستم همه اش خواب و رویاست اما چه شیرین حال که میدانم بر رویا منزل کرده‌ام نمیخوام برخیزم و دوست دارم به درازای همه عمر به همین رویا بمانم و زندگی کنم اما امیدی به دلم زنده خواهد شد که این رویا دستیافتنی است باید چشم‌ها را گشود باید دوباره برخاست و باز تکرار کرد، ما همه جانیم و برابریم و به آزار ندادن دیگران آزاد خواهیم بود حال که چشمانم را به جهان برای بار دیگر گشودم حال که دوباره این جهان پس آدمیان را میبینم دوباره همه چیز بر جهانم آوار شده است دوباره همه زشتی ها در برابر دیدگانم است همه چیز به تکرار کمی پیشتر در حال گذر است چندی بر این رویای والا چشم فرو بستم شایدان را به دل دیدم شایدان را به اماغ افکارم دریافتم شایدان رویای هزاری از همین آدمیان به طول هزاران سال بوده است خودم هم نمیدانم چه بود و چگونه آن را دیدم اما شیرینی زیبایش هنوز برکام است هنوز با نگاه به آن و یاد تکرار خاطرش جانم آرام می شود اما دریغا که چه بد سرنوشتی بر آدمی افکنده است این چه رویایی بود و چگونه به جهان من پای گذاشت تا چگونه مرا به این فکر تازه جان دهد باز تکرار آن جمله در رویاه آرامش ذهنم خواهد شد دیگر توان دیدن جهان آدمیان را ندارم و تکرار دوباره دنیای آنان جهانم را به آتش خواهد کشید. وای که دوباره دیدن آنان همه جانم را خواهد سوزان این چشما چرا کماکان میبینند؟ چرا باز هم باید جهان آنان را دریابم این چه محکومیتی است چه کسی مرا به این دیدن مجازات کرده است که باز تکراران دردهای پیشتر مرا خواهد کشت کاش دوباره به همان رویای دورترها لانه می کردم. ای کاش دوباره بر همان رویا منزلم بود و می توانستم تا آخرین سانیه هایم همان را تکرار کنم اما دلیل دیدن آن رویا چه بود؟ سرمستی حاصل از دیدنش برای چه بود؟ آیا نمی‌خواست تا فعل خواستن را به وجود بپروراند؟ آیا تمام دیدنها برای برخواستن نیامده است؟ آیا به نهای این دیدنها نباید برخواست و را شکست؟ صدایی مرا به خیش میخواند تکرار جمله‌ای مرا دیوانوار و مستانه به دنبال خود کشیده است جان ما همه جانیم و برابریم به آزار نرساندن هم آزاد خواهیم بود اما این بار این آیت نه از زبان من نه از فکر من که صدای بیگانه ای از اعماق دل بیگانه ای در حال رسیدن است وای که جهان دیوانم کرده است آیا خرد خیش را از کف دادم؟ آیا به جنون رسیدم؟ آیا محکوم به دیوانگی بر جهان آدمیان شدم؟ اما نه باز هم تکرار می شود این بار نه از زبان و فکر خیش نه از فکر و زبان یک تن که هزاری آن را به دل و زبان سرودند و من یکی از کمی پیشترها توانستم به جان آدمیان لانه کنم حال دوباره این جانها مرا به خیش می خانند. این چه جهانی است. به جان هر کدام منزل کردم این جمله را از اعماق جان آنان شنیدم آیا این ندای قلب آنان است آیا این آیت به فکر همه آنان از قلب من لانه کرده است اما نه بیشتر از این هاست همه آن را دیدند همه آدمیان همتای من به همتایی جانمان آن رویای والا را دیدند آن روز که در خواب و بیداری، در سکون و به فیل به چشمان و در ذهن رویا را دیدم همه همتای من به جانشان آن را دیدند آریان را دیدند که این گونه به منزلگاه دل همیشان این سرود خوانده می شود سرود جان و برابری، سرود آزادی و آزار نرساندن آیا باز هم به جهان رویا ماندم؟ آیا این دیدن هم دنباله همان رویاست؟ اما من که حال بیشتر از هر روزگاری احساس واقع بر جانم لانه کرده است حال که بیشتر از هر زمان دیگری به دنیای واقع نزدیک شدم پس چرا مدام همین سرود را از فکر آدمیان میخوانم. آری همه آنان رویا را دیدند همه بر جانمان مشترکان را دیده ایم از آن خانده ایم و بر آن منده ایم و حال رویایی برابر خواهیم داشت حال همه هر بار تمام آن رویای صادقه را مرور می کنیم. همه هر بار از یاد آوردنش سرمست میشویم و حال در برابر ماست آن چیزی که آرزویش را داشته ایم رویایی که همه آرمان و آرزوی ما بران نهفته است حال به هر جانی که از آدمیان منزل کردم ندای آن رویا را شنیدم هر بار همگان در حال تکرار همان رویای به ذهنهایشان هستند از کودکان تا پیرترها از جوانان تا تاجدارها همه آن را دیدند همه ابنای بشر در آن روز یگانه رویای جان را دیدند حال می بینم که چگونه همه در خلوت روزی هزار بار از رویای خیش می گویند به دلان را تکرار می کنند. آن آیت را می و از جان به دل نهیب می زنند اما هیچ کس توان بازگو کردن آن را به دیگران ندارد وای که چه بیتاغت شدم ای کاش صدایم را می شنیدند ای کاش فریادهایم آنان کارگر بود می دیدند که چگونه برایشان فریاد می زنم. از این رویای مشترک می گویم می گویم که به همه بگویید و فریاد بزنید آن راهبر جهان را تکرار کنید از جان بودن به سرایید. از برابری و آزادی بگویید که یک منجی جهان ما نست حیحات هی که هیچ از من نمی شنوند هیچ از من نمی بینند و تنها من به جانهای آنها منزل کردم تنها من از آنان می شنوم و وای که جهانشان را ترس در نبردیده است به ترس خاموش میمانند که مبادا دیگران از آن چیزی بدانند. آنان از سنگ و انگ و ننگهای بسیار شنیدند آنان دانستند که آرمان و ایمان تباهی است، نادانست، بی است حماقت است و حال خاموش باید چرا دیگران بر آنان خواندند هجی کنند. خاموش به جان از ترس و انگ و ننگ آرام میمانند و هیچ بر نمی آورند. وای که خودخامگان هم از آن رویا دیدند به دل ترسیدند و بیشتر بران شدند تا بر تبل نادانی و حماقت از آرمان و ایمان بکوبند بیشتر به آدمیان بفهمانند شده بر زر، شده بر زور، شده بر تزویر همه را به خموشی راه دارند که همه چیز از آن آنان است کدامین تاجداران خواهد خواست که تاجش را به دیگری پیشکش کند؟ چه کسی از قدرت به پایین آمده تا دیگران بر آن بنشینند و حال کرویای رویای آزادی به جان آدمیان لانه کرده است همه دنیایشان بر ترس لانه کرد بر ترس نشست که مبادا در روزگارانی شوکت و جلال از کف دهند پس ترس بر جان را به جان بیشمار آدمیان میهمان کردند بر آنان از ترس خیش فدیه دادند تا خاموش باشند و منفعل آن کنند که آنان میخواهند هنوز سخنی به میان نیامده و حرفها بر دل مانده است که هزاری را به جوخه های آتش سپردند باز هم در خفا باز هم به نهان اما گاه به میدان و علان سوزاندند آتش زدند و خاک سر به میان آدمیان لانه دادند تا بیشتر به حراسند و بترسند هزاری از دانشمندان و دانایان هنرمندان و خبرنگاران به پیش فرستادند تا در رد این اباطیل قصه بخوانند. بگویند از کرامت و والایی انسان ها بگویند از بزرگی و جلال آدمیان بگویند از شکوه این روزها، بگویند از ترس ها و از هماغت ها. از نادانی ها و از ایمان ها از همه گفتند و به خیال خیش همه را خاک سر کردند باز هم آرام نماندند آمدند تا بیشتر بر مردمان پیشکش دهند از هر آن چه از آنان بود بخشیدند تحفه دادند نعمت کردند تا فرو بنشانند ساعت کار کم شد آرام شدند، حق دادند، آزادی بخشیدند و همه چیز را تحفه و فدیه کردند و باز به خیال خیش همه را خاکستر کردند اما رویا بیدار بود، زنده بود، بال و پر می به ذهنها پرورانده می هر روز و هر ثانیه به دل کسی بارور می شود. لانه میکرد ریشه می و باز به ذهنها هجی می شد می از جان و برابری و آزادی از بودن و ماندن از فریاد و از تغییر به دل می و عاشق می شدند هرچان تاجداران کردند که همه خاموش بمانند و در خیش برانند به فراموش سپارند و بر جای نشانند هیچ نشد و باز کودکی آرام به گوش پدر گفت آزادی چیست؟ آزادی ریشه کرد ریشه دواند ساقه کرد برد داد و گنچه زد از لبان کودک گفت و به لبان ماکان جوانان ریشه دواند آزادی لقلقه ی زبانها شد برابری به جانشان لانه کرد و جان به وجودشان زنده شد رویا هر بار بیشتر از پیش لانه کرد و خیشتن را پروراند و به واقع چنگ انداخت و خیش را به واقع بدل کرد که راه تمامی حقیقتها از دالان رویاها گذشته است به رویا نگاه کردند و آرام شدند رویا را به ذهن ها خواندند و فریاد شدند آرام به زیر گوش هم خاندند همجان جانت سلامت باد چه تنین گوش نوازی بود این جان والای همگان چه آرام تلاوت می کرد برابری را چه فریادی میزد از آزادی و شروع همه ها از آن تن دیوار شهرها بود آنجا که دیوارهای سر به آسمان کشیده از ساختمان گاه های آدمی لانه فریاد رویاها شد آنجا که جان بر جان ساخت های آدمی لانه کرد، آنجا که برابری فریاد زد، آنجا که بر سطح نورانی بر جان طوفانی بر خواب همگانی رویای منزل کرد و فریاد برآورد. ما همه جانیم و بران برابریم، به آزار ندادن یکدیگر آزاد خواهیم بود. وای که باز جهان برایم رویای تازه بود. وای که دیدن هزاری از آدمیان که به تنگ آمده به ننگ و انگ و سنگ به لانه نخفتند و فریاد برآوردند مرا به شور واداشت به جان آورد تا به جانشان باشم. از آنشان باشم به کنارشان باشم و از آنان باشم. آمدم و به جانشان منزل کردم و دیدم چه فریادها برآوردند، چه بیپروا در برابر ظالمان ایستادند به خیابان آمدند در برابر زورگویان خواستند در برابر زشتویان سفارایی کردند و باز به پیش می روند و فریاد می زنند جان را فریاد می زنند برابری را برابری نهفته بر جان همه جانداران را از آزادی میگویند از فریاد دم میزنند و باز به پیش می روند به زیر چوب و شکنجه و شلاق ایستادند در رویایشان باز میخوانند دوباره سر میدهند همان رویای والای بر جان را به همتای جان به آزادی خان هم قسم شدند از جان گذشتند تا همه جان جهان آرام گیرد تا همگان به آزادی دست یابند و چرشادت ها کردند وای که من هم به جانشان آمدم همتای آنان شدم به دردهایشان درد کشیدم و با فریادشان زنده شدم وای که این نهای بودن است نهای تقیان و زندگی است این رشادت و ایستادگی است این ماندن و پایکوبی است این پیروزی و دگرگونی است این نهای رویای جان است باز خواندند باز به پیش رفتند هزاری نوشتند هزاری به دست گرفته برای دیگران گفتند تصویر کردند هزاری معنا بر رویای نهادند تا هزاری را بیدار کنند به خیابان آمدند و فریاد زدند از برابری گفتند از آزادی گفتند از رویای بزرگشان خواندند بر دیوارهای شهر و سطح نورانی بر جان خیشتن بر زبان و بر زین ها بر خون خیشتن نگاشتند جان برابری و آزادی را و باز تکرار کردند همه رویایشان را به امید آن روز که در دور دستها ها همه آدمیان فریاد بزنند ما همه جانیم و بران برابریم به آزار ندادن یک آزاد خواهیم بود به رویای رسیدن بر جهان تا آخرین قطره خون ماندند و فریاد زدند آمدند و بی از جان گذشتند تا همه جانها از حیوان و انبات تا انسان به زندگی آرام گیرند به صلح باشد و برابری را منزلگه خیش کنند به هوای آزادی نفس بکشند و بی آزار روزگاران را سپری کنند پس آرام ننشستند و برای تغییر جهان یک جان شدند به پیش رفتند و جنگیدند و من به جانشان به وجودشان منزل کردم همه را دیدم از روزگاران پیشتر از خیلی دور ها. آری حال میدانم همه را دیدم از همه آنان شنیدم حال خوب میدانم که به طول عمر همگان بودم و دنیای آنان را دیدم فراتر از دنیای پیشترها همه جهان را در نوردیدم تا جان شوم تا ای از این قدسی عالم باشم تا به این والا مقام دست یابم که به جان آرام ننشینم و بر جای نمانم که این ذره قدسی این جان والا همه کرامت هاست همه رسیدن هاست دیدم همه را دیدم از پیشترها همه جهانشان را زیر نظر گرفتم و دنیایشان را از زیر نظر گذراندم تا ببینم این جان والا را ببینم و بدانم که آنان چه هستند چه بوده و چه خواهند شد آری من زرهی از آنان بودم و به دلهایشان به طول همه سالها زندم چه نامها که بر من نهادند هر بار به نامی مرا از خود راندند و به خیش نزدیک کردند یک بار بهره بردند و یک بار نابود کردند یک بار فراموش کردند و یک بار به اسارت کشیدند مرا به هزاری از خود راندند تا نباشم و از رویایم دور بمانند اما من بودم از دیربازان به کنارشان روزگاران را گذر کردم من به لانه به دلهایشان، به قلبهایشان، به مغزهایشان، به فکرهایشان، به جانشان نه بیشتر از آن من به جان جانانشان بودم و مرا چه آرام به فراموشی سپردند چه آرام مدفون کردند تا نبینند و هیچ از من نشنوند اما من باز هم بودم و همه را دیدم همه چیز را زیر نظر گرفتم تا به روزی به آخر روزی سر برآورم و فریاد بزنم جان را بودن و این یگانگی زندگی را این آزادی نهفته در آزار نرساندن ها را هرچه کردند هرچه تلاش در وجودشان بود به کار بستند تا من نباشم و از من هیچ باقی نماند اما ندانستند که من ذره‌ای ای از همانانم نه بیشتر من همه دنیای آنانم من جانشان بودم همه قدوسیت و وجودشان بودم همه دردها را بردم بیشتر از درد دیدن درد درد دادن دردم داد دیوانم کرد کلافه و بی کرد خاموشم کرد قصا دهانم دهانم را بست و به جایم نشاند تا دیگر هیچ نگویم و خاموش بمانم پس هزاری سال لب بر نیاوردم تا دوباره به رویایی برایم و همه را بیدار کنم همه را به خیش صدا زنم و دوباره جهان را به جان بسازیم به برابری بیاراییم و به آزادی مزین کنیم در دور دست ها ای بود کوچک که آرام سر برون داد و ریشه دوان. آرام به پیش آمد و بر جهان منزل کرد هیچ نبود و هر چیز بود آرام کوچکیش را بر جهان پهن کرد و ساوه کرد ریشه ها زمین شدند و به آسمان برگها پیش رفتند میوداک، غنچه کرد، جوانه زد و هر روز بارورتر شد به پیش رفت و برج بزرگ و بزرگتر همه جهان را در نوردید بیشتر و فراتر شد همان ذره دیربازان بزرگ و بزرگتر شد تا همه جای جهان را گرفت، آنقدر از آن دیربازان گذشت که هیچ به خاطرش نماند که همه همتای خویشند. آنقدر به شکل های گوناگون درآمد که همه چیز را از خاطر برد، اما به این بودن آنقدر تکه شد تا سرآخر ذره تازه به جهان پدیدار گشت. آن ذره تازه بر جهان را درنوردید همه را در خود فروخورد، همه چیز را در خود بلید بزرگ و بزرگ تر شد چندی نگذشته بود که خیشتن را مالک دیگران خواند و باز به پیش رفت هیچ از دیر بازش به خاطر نماند و باز بزرگ و بزرگ تر شد گاه دیوانه می شد. آتش می زد. به آتش می و قربانی می کرد. گاه خون به دهان می کشید. گاه از گوشت و خون تناول می کرد و گاه بلذت آزار می داد. باز هم به پیش رفت و در این دیوانگی بارورتر شد آنقدر به پیش رفت که هم قامت خیش را به زمین افکند و آن را هم تکه کرد پاره کرد به اسارت برد زنجیر بر دستانش زد و باز دیوانه تر شد هر بار زشتی تازه برون داد هر بار به حماقتی تازه بیشتر آزار کرد و هر بار در زشتی بیشتری فرو رفت آنقدر در این دیوانگی فرو رفت که همه را آسی و بیچاره ساخت آنقدر زشتی روا داشت که همه را بیمار و کلافه کرد اما باز هم به پیش رفت و بر جای نماند همه را مالک شد صاحب بر جان همگان نشست بر تاج و تخت باری از آسمان تنفیز شد و گاه از زمین گاه به اقوا و گاه به تسخیر گاه ترس و گاه به زور به هر چه متوسل شد و باز بیشتر ریش دواند به پیش رفت آنقدر به پیش رفت که جهان را زشتی فرا گره همه جای زشتی بود و جهان مطفون در زشتی به کام مرگ رفت همه در زشتی و مرگ غوته خوردند همه برنای مرگ درود دادند تا ذره همان ذره پیشرها آرام سر برآورد و آرام خاند ما یک تا و برابریم ما به جان برابریم از یک ریشه و یک راه آمده ایم. او گفت و هزاری سرش برون کشیدند بریدند تاراندند به خاک کشیدند به خون بردند و ذره هزاری شد. ریشه دواند دوباره ساغه کرد اما این بار نبی هویت نبی راه نبی ارزش چون علفی هرز که این بار به ریشه دواندنش هزاری تکرار کرد ما به جان برابریم و به مدد از آزار نرساندن به یک آزاد خواهیم بود پس این بار ذره دوباره رشد کرد پیش رفت اما همه جهان را به ارزش خیش یک رنگ ساخت هر کار را به این والایی جان قسم داد و راه را بر این طریقت پاک به پیش برد تا جهان غرق در این پاکی به آنچه لایقش بود دست یابد ذره حال از کمی دورتر به جهان دیده دوخته است او جان است او یکتای همه جانداران است او برابری و آزادی همه بر ازان است و حال که به جهان چشم دوخته آرام می بیند که هم جانانش که هم تای جان او که برابر او که همراه او هستند برای آزادی همگان از جان گذشتند از یگان قدسی جهانشان و این فرای همه ی آنان هم به پیش می روند و جهانشان آن است که دیگر آزار به جهان باقی نماند و هیچ کس به آزار در نیابد آن روز است که همه جانداران که همتاو و برابر و همجانند فریاد خواهند زد. ما همه آزادیم و آزادی از آن ماست. آزادی آرام خواهد بود و از داشتن چنین جانانی به جهان خورسند خواهد شد. شاید آن روز سخن گفت. و چیزی از او را شنیدید که این بار مانا خواهد بود و جاودان تا آخرین روز هستی به کام همگان خواهد ماند و همه از بودنش لذت خواهند برد. آنگاه آرام بر همگان میخواند ما همه جانیم و به جان برابریم و آزاد به آزار نرساندن خواهیم بود.